زادتهم ايمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومن مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و ورزق و رزق کریم سوره مبارکه انفال هست که از سوره مدنی هست از نظر ترتیب هشتاد و سوره هست که بار ان حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد و موضوع این سوره هم جهاد هست مناسبت این سوره با سوره های گذشته سوره که قبل از این ما خاندیم سوره مائده سوره انعام در اون دو سوره نفی شرک بود رد شرک بود هر دو نوع شرک شرک اعتقادی و شرک فعلی و بعد از آن در سوره اعراف خواندیم که نسبت به قباحت و شناعت شرک شما تبلیغ بکنید و اصلا تنگی را در دل خودتون راه ندهید حال در سوره مبارکه انفال این مطلب را می که برای در قدرت مشرکان اونهایی که همیشه مانع ایمان هستند مانع توحید هستند و مزاحم راه خدا هستند برای در قدرت اونها شما مردانه بجنگید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این موضوع این سوره هست که در این سوره الله عزوجل در رابطه با جهاد صحبت می فرماید اما بخش اعظم این سوره در رابطه با جریان بدر هست واقعی بدر که واقعه بدر در همین ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد جریان بدر در سال دوم هجری در هفته رمزان اتفاق افتاد که انشاءالله آیاتش را که ما به اون آیات برسیم در رابطه با این جریان عرض می کنم. اما این سوره را انتخاب کردیم در این ساعت بخانیم که عزیزان از سطح شهر هم هستند نه به دلیل این که در این سوره داستان بدر بیان شده داستان بدر یک داستان فقط نیست یک جریان معمولی نیست ما از نگاه یک داستان و غزوه بهش نگاه نمی کنیم بلکه وقتی که انسان به ابعاد مختلف این جریان نگاه می کند و بررسی می کند به حقانیت اسلام و به اینکه واقعاً واقعا اسلام دین حق هست و به معجزه اسلام و معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیمی برد و به این پی میبرد که خدای تعالی واقعا در بدر نشان داد که حامی این دین هست و هرچی که در مقابل این دین باشد اون باطل هست و خدای تعالی اونها را خار و زبون می کند گرچه از نظر قدرت اونها قدرت بالایی داشته باشند اما خداوند تعالی اونها را نابود می کند همان گونه که در روز بدر کرد روز بدر را در قرآن مجید یوم الفرقان گفتند فرقان یعنی حق و باطل از در اون روز از همدیگه تشخیص داده شدند در این سوره ما متوجه میشیم که حق چیه باطل چیه و حق کدام طرف هست باطل کدام طرف هست به حقانیت دین خودمون به حقانیت آین خودمون ما به وسیله این سوره می رسیم. اما اسم این سوره هست انفال چرا بهش میگن انفال انفال یعنی اموال غنیمت چون که در بخش بزرگی از این سوره هم اول سوره هم وسط سوره در رابطه با غنائم بحث شده غنائم در ملتهای گذشته ادیان گذشته شرایطشون فرق می کرد. در بسیاری از عدیان گذشته هر مالی که به عنوان غنیمت به دست برای اینکه مقبولیت اون غنیمت و مقبولیت اون جنگ نشان داده بشه اون غنیمت یه جایی گذاشته می مثل صدقات آتشی از آسمان میآمد و غنیمت را میخورد و میبرد با خودش لذا نشانی این بود که این جنگ جنگ مقدسی بوده و مالی که به دست آورده شده از کفار از دشمنان این مال مال مقبولی هست خدا قبولش کرد. اما از به خدمت شما که، در دین اسلام خدای از دستور دادند که غنائم بین مجاهدین تقسیم بشه هنوز مجاهدین نمیدونستند احکام هنوز نازل نشده بود در جنگ بد که خدای تعالی مشرکین را شکست مفتزهانی ای داد و خدای تعالی اونها را فراری داد اونها را اسیر کرد از بین برد غنائمی بسیار زیادی به دست مسلمانان افتاد تقسیم مسلمانان طوری بود که بعضی از مسلمانان را خدای عزوجل در مدینه گذاشته بود سه نفر مهاجر و پنج نفر انصاری اینها رسول الله با خود نياوردن گفتن کلا شهر مدینه خارج نشه اینجا زن و بچه من هست اینجا بلاخره نوامیس ما هستن یه وقت دشمن از راه دیگر از مسیر دیگر حمله نکند لذا هشت نفر را اونجا به عنوان محافظ به عنوان نگهبان گذاشت و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم نتوانستند در جنگ بدر شرکت کنند به دلیل اینکه در این روزها سیده رقیه رضی الله تعالی عنها دختر رسول الله مریض بود و حالش ناخوش بود رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم به سیدنا عثمان گفت شما بشینید و از همسر تیمارداری کن و مراقبت کن تا اینکه در همون مریضی بود بعد از اینکه آن حضرت برگشتند رقیه رضی الله تعالی عنها هم وفات کرد لذا عثمان بخاطر این عذر نتونست همراه بشه هشت نفر دیگر از صحابه اینها را آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای محافظت گفته بود شما اینجا بمانید. بقیه وقتی که مجاهدین رفتند تعدادشون اندک بود. سیصد اندی بودند. اما دو گروه بودند. اونهایی که جوان بودند. قدرتمند بودند. اهل جنگ بودند. اونها در صفحه مقدم قرار گرفتند. و اونها با دشمن جانانه جنگیدند. و اونهایی که از نظر سنی بالاتر بودند اونها اطراف رسول الله برای محافظت از رسول الله پشت سر گویا پشت سنگر ماندند خدای تعالی با همون حمله اولی که صحابه داشتند با همون حمله اول دشمن را شکست داد دشمن را نابود کرد دشمن پا به فرار گذاشت هرچی مال بودند گذاشتند لذا اون جوانها گفتن که این حق حق ماست چون در گذشته در بعضی از ملتها رسم این بود و در زمان جاهلیت هم همین بود که هر جنگجو که جنگ کرد و هرچی به دست آورد مال او هست اونا گفتن که ما جنگیدیم این مال ماست و ما باید صاحب اینها بشیم اما گروهی که پشت سر بودند و اونها نتونستن جنگ بکنن اما پشت سنگر اونها گفت ما پشتیمان بودیم ما از رسول الله محافظت کردیم و اگر شما شکست می‌خوردید و دشمن به پیش میامد، قطعا ما دفاع کردیم ما می‌جنگیدیم ولی خدای تعالی مقدر نکرد ما هم با سهمی داشته باشیم لذا در این موضوع اختلاف شد که غنائم مالکی باشد الله عزوجل این آیات را نازل فرمود تکلیف غنائم را مشخص کرد که خلاصهش اینه که چهار پنجم بین تمام مجاهدین تقسیم بشه چه اون مجاهدی که در خط مقدم بوده چه اونی که در خط مؤخر بوده چه در میمنه بوده میسره چپ راست چه اونهایی که اونجا اونم یک سنگر بود اونهایی که در مدینه ماندند و مسئولیت و ماموریتشون حفاظت از مدینه و از خانه های مسلمانان بود همه را خدای عزوجل فرمود که سهم داشته باشند البته چار پنجم یک پنجم دیگه در اختیار رسول الله بود رسول الله اونها را به هر صورتی که تقسیم میکرد بعضی وقتا از همون یک پنجم به همین مجاهدین هم میداد مثلا پیغمبر تشویق میکرد میگفت که من قتل قتیلم فلهو سلبو هر کسی که یکی از دشمنان را بکشد هرچی که از اون دشمن گیر آمد از اسب و زره و اسلحه و غیره مال او خب از همون یک پنجمان حضرت میداد به هر حال الله عزوجل ابتدا تکلیف این را مشخص فرمود این هست علت نامگذاری این سوره به سوره انفال انفال یعنی غنائم یسئلونک عن الانفال از شما سوال میکنن کنند در بدر قل الانفال لله والرسول بگو انفال و غنائم مال خدا و رسول هستند یعنی هرچی که شما بگوید بر اساس گفته شما تقسیم نمیشند هرچی که خداوند و رسول خدا بگند در اختیار آنها هستند و آنها تقسیم میکنند لذا الله تعالی ابتدا فرمود فتق الله این اصل موفقیت است فتق الله از خدا بترسید با تقوی باشید و اصلحو ذات بینکم در میان خودتون اصلاح ذات البین بکنید یعنی حقوق همدیگر را رعایت کنید عزیزان یکی از نسخه های صلح و زندگی آمیز و زندگی که ارز مثل برادر با هم, با هم زندگی بکنیم حقوق همدیگر را رعایت بکنیم به همدیگه محبت کنیم برای هم دیگه خدمت بکنیم نسخه اصلیش تقواست اگر در میان ما مسلمانان خدا ترسی باشد هیچ وقت ما با هم دیگه اختلاف نمی کنیم چون هیچ وقت حقوق همدیگر را تزیه نمی کنیم این همه اختلاف هست جنگ و برادرکشی هست برادر با برادر قوم با قوم قبیله با قبیله همسایه با همسایه مشتری با بایه اینا همه که با هم اختلاف دارن چون تغوی رعایت نشده چون حقی پایمال شده حقی ضایع شده وقتی که حقوق ضایع بشه وقتی که خدا ترسی نباشد اون وقت اختلاف میاد خدای عزوجل نسخه اصلاح ذات البین را و نسخه زندگی مسالمت آمیز و زندگی برادرانه و محبت آمیز را در تقوی تشخیص داده و مارا دستور میده فتقوا الله و ذات بينكم. بینکم این اصل اول هست تقوی اصل دوم صلح سوم و اطیع الله و رسوله اگر ما همه اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنیم چون اطاعت خدا وقتی که میگیم خدای عزوجل برای ما دستوراتی بیان فرموده ما نسبت به زن و بچه من وظیفه داریم زن و بچه نسبت به بزرگ خانه مرد خانه وظایفی دارند ما نسبت به پدر و مادر وظایف داریم ما نسبت به برادرانمون وظایف داریم نسبت به خواهرانمون وظایف داریم نسبت به همه خیشاوندان وظیفه داریم که با اونها محبت کنیم صله رحمی بکنیم به دردشون رسیدگی کنیم به مریض شدن به بی عیادتشون بریم در همه مسائل ما نسبت به همسایه دستوراتی داریم انقدر رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره همسایه تاکید کردن که صحابی میگه من احساس کردم دارند که میگن از این ببعد همسایه از همسایه باید ارث ببرد ما نسبت به مشتری وظیفه داریم ما نسبت به بایه وظیفه داریم ما نسبت به کسی که همسفر ما هست دستور از خدا داریم در تمام موضوعات خدا برای ما فرمان صادر کرده برای ما رسول الله صلی الله علیه و وسلم هدایت و راهنمایی صادر کرده ما که اینها را رعایت بکنیم ما با هم دیگه هیچ مشکل نداریم همه این مشکلات از اون زمانی سرچشمه میگیرد از اونجا آغاز میشه که ما اینها را نادیده بگیریم لذا الله تعالی میفرماید و اطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن واقعی هستید، این ایمان تغاضا می کند. ما مطیع خدا باشیم و مطیع رسول باشیم، مطیع نفس نباشیم، مطیع تغazaها ماحولیمو نباشین، مطیع تغازه بیجای قوم نباشیم مطیع تغازه های بیجای زن و بچه نباشیم و اطیع الله و رسوله این کنتم مؤمنین ایمان تغازه می کند. اگر شما مؤمن هستید اطاعت خدا و رسول بکنید اما مؤمن کیه بیاییم ایمانمون این آیه محک بزنیم که آیا مؤمن واقعی هستیم اگر هستیم مبارکه اگر نیستیم تجدید نظر بکنیم الله تعالی میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمنین واقعی اونهایی هستن هر که هرگاه ذکر خدا میشه وقتی الله گفته میشه دلشون بتکان میاد میترسند از الله میترسند و از نام الله می ترسند خیلی انسان های خدا ناترس هستند که با نام الله خیانت می کنند به سر مردم کلاه می از با اون لباس مقدسی که به تنشون هست در حالی که الله می فرماید هرگاه واسطه خدا را بیاری امید ترسه کسی می خواد کاری بکنه بگی بخاطر خدا نکن اینقدر از خدا میترسه که فورا متوقف میشه از کسی چیزی بخای که به خاطر خدا بده او اینقدر متوقف میشه فورا اگر در توانش باشه دریغ نمیکنه لذا مؤمن کسی هست که هرگاه نام خدا جلوی او گرفته بشه قلبش می لرزد قلبش می تپد موی بلند بدنش بلند میشه آیا ما این چینین هستی؟ آیا دل ما تکان میخورد؟ نیاز به تجدید نظر هست خیلی ها هستن که وقتی که نام الله را جلویشو میگیری میگه دیگه من چنان نامی شما بر جلوی من گرفتی و چنان چیزی گفتی که من بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم لذا این ممن واقعی است. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وصف دوم مؤمن واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا هرگاه آیات الله عزوجل بر اوم مؤمن تلاوت میشه آیات قرآن خانده میشه ایمانش اضافه میشه یعنی هر وقتی که در محفل درس آیات پروردگار نشستیم و این آیات که آیات در باره ایمان است آیات در باره است آیات در خدا ترسیح است، این آیات وقتی که خاند میشه، ایمان اضافه میشه. یکی از خصوصیات قرآن اینه، یکی از ویژگیهای های قرآن و درس قرآن اینه که انسان، انسانی که به اقتضای ایمان عمل میکند، هر وقتی که این آیات را بشنود و این آیات برای تلاوت بشه ایمانش اضافه میشه تقوایش اضافه میشه خدا میفرماید مؤمن این هست و تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانا این آیات در اومی افزاید ایمان را و على ربهم يتوكلون و آنان وصف سوم اخلاقشون توری هست که از نظر توکل به بالاترین درجه توکل رسید و علی ربهم توکلون فقط و فقط بر ربشون توکل میکنن مؤمن باید متوکل باشد البته این مطلب را خدمت شما عرض کنم که بعضی از ما یک مفهوم نادرستی از توکل فهمیدیم ما فکر می کنیمیم توکل یعنی اصلا از اسباب کار نگیریم و کار را برای خدا بسپاریم نه. توکل یعنی اینکه در هر کاری اگر سببی خدای از خلق کرده سببی خدا درست کرده. به اون سبب متواصل بشیم ولی به سبب اعتماد نکنیم به رب سبب اعتماد بکنیم اون رب که این سبب را ایجاد کرده از اینجا شما با ماشینتون سوار میشید فلان شهر میرید خوش میرید شما به این که این ماشین صفر است این ماشین نو است به این اعتماد نکنید. شما به ربی که این را خلق کرده و برای شما قرار داده به اون اعتماد بکن آیات او را بخان به او توکل بکن بگو خدایا من به تو توکل میکنم و توی ای مک که مرا به مقصد میرسانی انسان به اسباب متوسل بشه اما متوکل به رب بی اسباب بشه خیلی ها هستند که بیمار میشن، مریض میشن، در این رابطه افراد و تفریت است. بعضی ها میگن که هرچی خدا بکند، یعنی معنیش اینه که نه به دکتر برن، نه از دوا،, دوا و داروخانه استفاده بکنند، این هم تفریت، این هم کوتاهی هست، و بعضی ها افراد میکنند، و فقط و فقط به دوا و دکتر اعتقاد دارن اصلا به چیزی دیگه فکر نمیکنن یک روزی هم نشده که توجهشون به الله باشه بگه ای الله تو شفا بده لذا توکل اینه که شما هر چی که اسباب خدا فراهم کرده به اونها متوسل بشو ولی بگو ای الله اینها سبب اینها رو تو درست کردی تا که تو فیصلے نکنی تو فیصلے شفاعت و خوب شدن را نکنی خوب نمیشه لذا على ربهم يتوكلون فقط و فقط بربشان توکل میکنند اینا مؤمنین هستند این صفت سوم مؤمن شد و صفت مؤمن و پنجم مؤمن الله می الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون مؤمنین واقعی هستند که نماز را برپا اقامه نماز نما اقامه نماز کی اس نماز هیچ جا خدا نگفته نماز را بخوانند و نماز را بخوانید همه جای قرآن فرموده اقیم الصلاه نماز را اقامه کنید اقامه نماز یعنی نماز را با همه شرایطش با همه آدابش با همه لوازمش یک سری شرایط و آداب ظاهری دارد که بدنت پاک باشه لباست پاک باشه مکانت پاک باشه روب قبله باشی وضو داشته باشی اینها یک سری شرایط اینها هستند و نماز را با جماعت بخوانی نماز را در اول وقت بخوانی و یک سری شرایط باطنی هستن که نماز را با حضور قلب بخوانی نماز را وقتی که می از دنیا ببری میگه الله أكبر. اکبر بعضی این را اینطور توجیه می که دستها را بلند کردن نوعی حافظی کردن است که از این دنیای مادی انسان خودش را جدا می کند منفصل می کند و وارد یک دنیای معنوی میشه. نماز معراج می اس معراج یعنی ملاقات با خدا داری می ری به ملاقات خدای عزوجل لذا اون خدا هم از درونت خبر داره، هم از بیرونت خبر داره، هم از قلبت خبر داره، هم از غالبت خبر داره. چنان دست ببند و چنان در حضور او نماز بخوان که او ظاهر و باطن را چک میکنه میبینه. نه اینکه فکرت قلبت درونت بجای دیگه باشد. اللهینه یقیمون از اقامه نماز به این مناس است اقامه نماز را مفسرین تفسیر میکنند و ترجمه میکنند میگویند یؤدونها بجميع حقوقها یعنی با تمام حقوق و آداب و شرایتی که نماز دارد نماز را ادا میکنند و مما رزقناهم ينفقون و از آنچه که ما بهشون رزق دادیم خرج میکنند خدای تعالی همه نوع ها برای ما مشروع فرموده هم عبادت جانی مثل نماز هم عبادت زبانی مثل ورد و ذکر و هم عبادت مالی مثل صدقه دادن صدقه میدی چرا به خاطر رزای خدا؟ خدای تو راضی باش خدای تو خوشنود باش این بنده اترا فقیر قرار دادی من غنی قرار دادی و به من دستور دادی که به این بدم. منم به خاطر دستور تو و رزای تو میدم خدای تعالی میتونست همه را سرمایدار بکند اما حکمتهایی هست تو قرآن همه حکمت ها بیان شده یکی از حکمت که ما را بیازماید ازماید چی اندازه ما گوش بفرمان او هستیم لذا الله می فرمد و من ما رزقناهم از آنچه که ما به انها رزق دادیم خرج میکنن بعد ازین الله اللہ می فرماید اولئیک هم المؤمنون حقا اینها هستند فقط اینها مؤمنین به حق هستند لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم سبحان الله برای دارندگان این صفات این جا چند صفات شدن مؤمن از خدا می ترسد وجلت قلوبهم مؤمن وقتی که تلاوت بشه ایمانش اضافه میشه و, یک و یکی از علائم تلاوت را بگم اضافه شدن ایمان هرچی تلاوت بیشتر گوش کنی عشقت محبتت بیشتر میشه اما متاسفانه گاهی بعضی از افراد اینقدر موسیقیات و صداهای نامشروع گوشهاشون پر کرده که از, صدا از تلاوت زیاد لذت نمیبرند حال نمیکنند. و از گناه حال میکنه این معلوم میشه که قلبش خیلی زنگار گرفته این قلبش مشکل داره این نیاز به درمان داره نیاز به علاج داره و دیگه الله تعالی فرمود که کسانی هستن که فقط بر ربشون توکل میکنند نماز میخوانند و انفاق میکنند صدقه میدهند یا زکات یا انفاق های دیگر نفلیم الله می فرماید هم المؤمنون حقا انها حسنا فقط إنها مؤمنین به حق لهم درجات عند ربهم برای این گروه درجات حسن نزد پروردگارشون و مغفرت و بخشش درجات جایگاه عزت مقام رتبه و مغفرت است بخشش خدا اعلام میکنه ای بنده تو را بخشیدم خوشابه آل این بنده و رزق کریم و رزق معزز هست دو نوع بهشت ما داریم یکی بهشت جسمانی مادی همین که خدا حور میده خدا غذا میده خدا میوه میده خدا باغ میده کاخ میده و یکی بهشت معنوی خدا میگه بنده من تو را بخشیدم بنده من از تو راضی هستم بنده به دیدار و ملاقات من بیا اینها سبحان الله این بهشت معنوی خیلی ارزشمنتر است از بهشت مادی کما اخراجک ربك من بیتک بالحق الله تعالی از اینجا اشاره می فرماید به جریان بدر جریان بدر اصلش اینطور اتفاق افتاد اصل جریان را انشاءالله در درس بعدی می خانیم اما اش اینجا بیان شده این بود که بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کردند و رفتند این جریان را به صورت مقدمی میخوام این عرض کنم چون بسیاری از این فضاهای مجازی و شبکه های معاند اسلام ضد اسلام این روزا تبلیغات زیاد میکنند و بعضی از جوانان غافل هم گوش میکنند کسانی که اطلاعاتی ندارند کمو بیشی متأثر میشند بعضی از جریانات را دشمنان به عنوان ضعف های اسلام چی می کنند زیاد تبلیغ می کنند میرند. مثلا میگویند که خب در جریان بد عزله مسلمانان و پیامبر خدا و یاران پیامبر بیرون آمدم میخواستند که جلوی کاروانی را بگیرند میخواستند که ال عزول راهزنی بکنند. این عنوان را می کنند لذا وقتی که اصل جریان را ما با خبر باشیم خود به خود میدونیم که بحث بحث چی بوده ببینید بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و مدینه طیبه تشریف بردند اونجا به خاطر اینکه پناهگاهی دیگه نبود این معوار این پناهگاه را الله عز و جل درست کرد اونجا آن حضرت رفتند، اونجا گرفتند رفتند، مشریکین مکه همیشه برای اهل مدینه پیغام می دادند که شما اینها را جای دادید، فردا اگر حمله ای شد، اگر ما کاری کردیم، ما برای شما هم رحم نمی کنیم و گاهی یک سری حمله های تو راها می کردند. و داشتند آمادگی میکردند کردند، آمادگی می کردند که مسلمانان را اونجا هم آرام آرامش بیشون ندن، نگذاره آرام بمانند. همون طوری که حبش مسلمانان رفتن، مشرکین حیاتی فرستادن، پیش شاه نجاشی که اینها را به ما تحویل بده، اینها فرار کردن، اینها فراریان ما هستند. لذا اینجا هم میخواستن به مسلمانان تعرض بکنند. اون کاری که مسلمانان کردن در واقع دفاعی بود. یه روز ابو جهل که سردار اصلی مکه در زمان خودش بود، ابوجهل در کنار خانه خدا اعلام کرد به مردم گفت مردم اگر می با اینها مبارزه بکنید باید ما پول جمع بکنیم و یک سپاهی یک لشکر خوب ما مجهز بکنیم که اسلحه خوب شمشیر خوب تیر خوب کمان خوب از جاهای دیگه برای خودمون بیاریم تا این ما مجهز بشیم و یک باره حمله بکنیم کار اینها رو یک سر بکنیم لذا گفتن که شما کاروانی تشکیل بدید که این کاروان در واقع اقتصاد شما را تأمین بکند وزی مالی شما خوب بشه تا ما بتونیم اسلحه جمعوری بکنیم لذا کاروانی به سرکردگی ابو سفیان که اون روزها جز مشرکین بود و یکی اثرانی اونها بود فرستاده شد به طرف شام افراد این کاروان چهل نفر بودن بعضی میگه 80 نفر بودند اینها انواع اجناس تجاری از اونجا خریدند و معلوم نبود دیگه چی چی خریدند خب قطعاً این کاروان داشت تقویت میشد در راستای مبارزه با رسول الله با اسلام و مسلمین وقتی رسول الله با خبر شدند که کاروان مشکی دار داره میره واز یک طرف اینها کم شکنجه نبود، نداده بودن صحابه را، کم اذیت و آزار نرسونده بودند. رسول الله با خبر شدن گفتند ما می‌ریم و جلوی این کاروان را می‌گیریم. جلوی کاروان را گرفتن یعنی جلوی فساد را گرفتن. اینها داشتن برای یک فساد بزرگ آماده می‌شودند. اینن مثل این هست که گاهی در گذشته مجاهدین که در افغانستان می جنگیدند دشمن چیکار میکرد؟ برای سپاه خودش سوخت میفرستاد، برای سربازان خودش و برای ماشینالات خودش سوخت میفرستاد. مجاهدین در مسیر میزدن این ها را. هرچی آزوجه خوراکی برایشون میرفت جلویشون را میگرفتند. یکی از هایی که دشمن را زبون کرد، دخار کرد، و زمینگیر کرد همین بود که از هر طرف راههایشون را بسته بودند. لذا وقتی که رسول الله قصد کرد که جلوی این کاروان بره خبر به ابو سفیان رسید فورا او کسی را فرستاد یک تند سواری را فرستاد به مکه به ابو جهل بگه که اینها دارن جلوی ای ما را گیرند و دارن جلوی ما می آیند شما به فکر حفاظت از ما باشید ابو جهل بسیار عصبانی شد فورا مردم را جمع کرد اطراف خانه خدا و گفت که اینها اینقدر جسور شدند که الان میخواهند جلوی کاروان ما را بگیرند میریم به طرف اینها و جنگ اینها لذا گفتند جم بکنی، جمع شدند هرچی خوراکی داشتند سواری داشتند شمشیر و اسلحه داشتند جوانانشون حدودا هزار نفر نه نفر جمع شدند و با خودشون زنهای مغنیه و آوازخان هم آوردن که هر جا براشون می آواز می تشجیعشون تشجیعیشون تحریکشون کردن به جنگ لذا اینها داشته میآمدن ابو سفیان هم راهش را کج کرد و از مسیر دیگر از کنار ساحل رفت تا اینکه خودش را به مکه برساند اما زمانی که ابو سفیان از خطر رفت شد به ابو جهل هم پیغام فرستاد که ما از خطر گذشتیم شما هم برگردید اینجا وقتی که رسول الله خارج شدند خارج شدند با خبر شدند بیرون مدینه که سپاه کفر دار میاد آنها دار میان به طرف ما آن حضرت صلی اللہ علیہ و پریشان شدن صحابه پریشان شدن طبیعی بود اما خدا عزوجل تسکین داد فرمود از این دو گروه یکی را انتخاب کنید هر کدوم را انتخاب کنید خداوند عزوجل شکستشون میده مال شماست خب صحابه را وقتی که گفتند رسول الله مشوره کردن بیشتر نظرشون این بود که همین گروه کاروان باشد که انها تعدادشون کم بود جنگی قطعا نخواهد بود اصله آنچنانی هم نخواهند داشت لذا اینجا بی خطر تر خواهد بود اینجا آسیبش کمتر خواهد بود لذا اونها این را انتخاب کردند اما آن حضرت صلی عليه و سلم وقتی که دیدن وعده خداوند عز و جل هست و وعده خدا حق هست آن حضرت صلی الله علیہ و پسند دیدن که وقتی که خدا از بهم میبره شکست میده بالاخره همون سپاهشون همون جنگجویانشون همون افرادشون تا حق و باطل برای همگان مشخص میشه تا اینکه خدای عزواجل اسبابی فراهم آورد که هم اینها برم به طرفی همونها که از اون طرف کاروان نجات یافت لذا اونها آمدند ابو سفیان وقتی که پیغام داد به ابو جل که شما برگردید ما برگردید از خطر رد شدیم و به مکه داریم نزدیک میشیم ابو جهل فرعون چرا این گفته شده فرعون این امت ابو جهل است گفت امکان نداره اینایی که اینقدر گستاخ شدن ما باید کار اینها رو یک سر بکنیم شما برید به مکه ما کار اینها رو تمام میکنیم میاییم آمدن تا که به بدر رسیدند رسول الله صلی الله علیه و با خبر شدند که اینها در بدر چادر انداختند اونها آمدن جاهای خوب را جاهای استراتژیک را تصرف کردند زمینهایی که زمین های ملک بودن به اصطلاح زمین که اونجا راحت بود چادر زدن و راه رفتن و تردد و چاہی اونجا بود. ابرا هم اینها ابسر را به اصطلاح اینها تصرف کردند مسلمانان بعد رفتن و جای خوبی برای مسلمانان نماند لذا اینجا اشاره به همین مطلب است الله می فرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق همانگونه که شما را رب شما از خانه‌تان به حق بیرون کرد به حق یعنی اینجا به به حکمت است الله تعالی حکمتی در نظر داشت شما را الله تعالی بنا اون کاروان بیرون کرد و این فریقا من المؤمنین لکارهون همان گروهی از مؤمنان این را نمی پسندیدند نمی پسندیدند که بالاخره برای جنگ بریم به همین خاطر با ان حضرت صلی الله علیه صحبت کردم بحث کردند یجادلونک فی الحق اما با شما جدل می می‌کردند به طور مشوره مشوره میداد یا رسول به این طرف نریم من بعد, بعد ما تبین بعد از این کمی چیز واضح شد ولی اونها کعنما یساقون الی الموت گویا اونها به سوی مرگ برده می شدن، سوق داده می‌شدن و هم می‌نگرون و اونها اسباب مرگ را می دیدن. چرا اسباب مرگ را چون سپاه دشمن سه برابرشون بود و همچنین تجهیزات دشمن چندین برابر بود میگن صحابه اول و آخر دو تا اسب داشتند و چند تا شطور داشتند چند تا شمشیر بود همهشون امکانات هم نداشتند الله می فرماید اما خدا وعده کرد وعده خدا به حق و اذ يعدكم الله احد الطائفتين زمانی که الله با شما وعده کرد یکی از دو طایفه یکی از دو گروه که انها لکم که اموال شماست اون را خدا شکست میده هر چه دارد مال شماست یا سپاه ابو سفیان یا لشکره ابو جهل، اما شما چی و تودون ان غیر ذات الشوکه تكنو لكم شما دوست داشتید اون خاردار مال شما نباشد خاردار کدومه همونی که خار زیاد داشت همونی که جنگجویانی داشت اسلحه و شمشیر داشتند، نیزه و تیر کمان داشتند. شما میخواستی اون نباشه همون کاروانک باشه که اون چند نفر بودن راحت گرفته می شد اما خدا چیزی دیگه اراد داشت ببینید از کردم یک جنگ معمولی نبود در واقع نبرد حق و باطل بود در واقع اثبات حقانیت اسلام از اون جا اللہ تعالی برای اولین بار ظاهر کرد برای همگان برای جهانیان و يريد الله این یحق الحق بكلماته الله اراده داشت اینکه حق را اثبات بکنن با وعده هایش قبلا خدا وعده کرده بود که حق را الله ظاهر می کند، حق را آشکار می کند. لذا الله می حق آشکار بشه. و یقطع دابر الكافرين الله می که ریشه کافران رقت بکنه. کافران برای اول و آخر چنان ای بخورند که برای همیشه از نام مسلمان بلرزند. این اولین بار بود لیوحق الحق و یبطل الباطل که حق ثابت بشه و بطلان باطل هم آشکار بشه ولو کریه المجرمون گرچه مجرمان نپسندند این را این را مکروه بدانند نپسند نا بدانند ناگوار بدانند ولی خدا میخواست انکار عملي بشه لذا آنها آمدند وقتی که آمدند اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد دعا همیشه موقع اجابت دعا عزیزم در میدان هست برای هر کاری که شما میخواهید دعا بکنید اقدام بکنید بعد دعا بکنید فقط تو خونه بنشینید و هیچ کاری نکنید دعا بکنید فایده نداره مثلا مریضی دارید مریضتون را بردارید به دکتر برید پیش به شفاخانه برید پیش طبیب برید بعدان دعا کنید وقتی که میخواهید منکرات را از بین ببرید وقتی که میخواهید در جامعه اصلاح بکنید حرکت بکنید امر به معروف نای از منکر بکنید خیرخواهی بکنید بعدان دعا بکنید نه کبازی ها وقتی که مشکلات را باشون مطرح میکنیم میگیم دعا, دعا کنیم دعا کنید خدا درست کنه خدا درست نمیکنه تا وقتی ما تو حرکت نکنیم تا وقتی ما اقدام نکنیم برای هر کاری باید اقدام بکنیم و دعا بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه در مسجد النبی ننشست دعا نکرد بهترین و جالبترین دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و دعاهای تکان ای هست دعاهای بدر هست دعاهای خندق هست دعاهایی که در میادین کردند لذا مسلمان دعاش در صورتی قبول میشه که همت بکند حرکت بکند هر کاری کار دینی بود یا دنیاوی بود لذا همت بکنید اقدام بکنید بعد دعا کنید لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن در بدر وقتی که شرایط را دیدند، اونها جاهای خوب را دارند انها آب دارند انها زمین سخت دارند ما تو ریگ و ریگستان واقع شدیم روحی ها هم ضعیف آمادگی اصلا برای این سپاه بزرگ نبود اینجا دست به دعا برداشت و همه رسول الله غم رسول الله فکر رسول الله همین جماعت اندک هست سبحان الله معلوم میشه که رسول الله اصحاب و یاران خودش را چقدر دوست داشت گفت بر الها اگر این جماعت مختصری که امروز اینجا آمدند این جماعت خدا را جماعت اهل ایمان را اگر امروز اینجا اینها را هلاک بکنی بعد از این کسی نیست که تو را عبادت بکند اللهم ان هذه العصابه فلن تعبد في الأرض ابدا همین ها هستند که تو را عبادت میکنند اینها باید روز به روز اضافه بشه اینها کم نشند اینها عابدانی تو هستند خدایا اینها را امروز چه شکست نده اینها را اینها را از بین نبر لذا ان حضرت با یک تزرعی با یک فروتنی دعا میکرد انبیا علیهم الصلاوات والتسلیمات هر چیز را از خدا می خواستند قدرت انبیا قدرت یک انسان معمولی هست قدرت خدایی نیست از نظر مادی ارز می کن. از نظر معنوی که سبحان الله لذا انبیا هم در هر کار خودشون از خدا می خواستند قرآن مجید را بررسی بکنید مملو است از دعای انبیا هر پیغمبری یکی از خدا یکی از خدا اولاد میخواهد یکی از خدا فتح بر دشمن میخواهد هر پیغمبر یه چیز میخواهد یکی آب میخواد هر چی میخواهستم از خدا میخواهستم لذا ما اگر بر مسلک انبیا هستیم بر مذهب انبیا هستیم بر مسیر انبیا هستیم باید از خدا بخوایم غیر خدا نخواهیم غیر از خدا کسی نمی تونه دعای ما بشنو بشنوه نمی تونه دعای اجابت پکنے کسی در جایگاه خدا نیست الا اعوذ بالله کی داشته باشه لذا الله می فرماید اذ تستغیثون زمانی که از خدا کمک می خواستید طلب ایقاسه کردید طلب فریاد رسی میکردید فاستجاب الکم الله اجابت فرمود برای شما خداوند اجابت فرمود گفتند که اونها هزار نفر هستند قرار است که دو هزار نفر دیگه بیاد. الله تعالی وقت ابتدا فرمود اونها هزار نفر هستند من هزار نفر برای شما فرشته میفرستم بعد گفتند که قرار است دو هزار دیگه بیاد خداوند فرمون من برای شما سر هزار فرشت میفرستم گفتند چار هزار دیگه قرار است بیاد خداوند فرمون من پنج هزار فرشت میفرستم یعنی در واقع نیازی به نداشت میخواست که تقویت بکند قلب اونها را الله میخواست که اونها ثابت قدم بکند تا بالاخره وهن را سستی را بزدلی را در خود را ندند لذا الله می فست جاب لكم الله اجابت فرمود اني ممدكم بألف من الملائکه مردفین این که من شما را امداد میکنم من شما را یاری میکنم با هزار تا از ملائکه که ردیف هستم پشت سر هم هستند خب سوال میشه که مگر خدا نیاز به فرشته فرشت داره خدا با یک کلمه کن میتونه دشمن را نابود کنه الله می فرماید و ما الله الا بشرا من این فرشته را و ارسال فرشته قرار ندادم مگر خدا این را قرار ندادم مگر مجدی فقط ولتطمئن به قلوبكم و بخاطر اینکه دل شما با این مطمئن بشه دل شما آرامش بگیره والا ومن نصر الا من عند الله العزیز من عند الله ان الله عزیز حکیم نصرت یاری نیست مگر از جانب خدا است بدون شک خدا ما غالب است و کارهای خدا با حکمت است یعنی خداوند برای نصرت نیاز به فرشتگان هم نداره نیاز به شما هم نداره خدای تعالی دشمنان خودش را با یک کن نابود میکنه در گذشته مگر کم دشمنان خدا بودند خدای تعالی اونها را نابود کرد اما الله عز و میخواد شما را تقویت بکند لذا معلوم میشه که خدای تعالی میخواد اسباب را گاهی که به ما اسباب برای تقویت قلب ما هستند اصل خدا خودش کار ما را مشکل ما را حل میکند بس اینها هم از سبب بودند سبب ظاهری بودند لذا وقتی آمدند عرض کردند بهترین جاها را در اون میدان اونها تصاحب کردند و صحابه در این طرفی که ریگ بود و ریگستان بود خب رفتن در ریگ ها هم خیلی مشکل است نه اسب خوب راه میتونه بره نه خود انسان خوب میتونه راه بره گرم هم بود آب هم نداشتند لذا الله عز و جل کم کم امدادهای خودش را فرستاد اولین امدادی که آمد خدا تعالی یک سنگینی یک خوابی یک خوابی بر اونها مسلط کرد که خود خود شمشیرها از دستشون می افتادند چورت می زدند این خواب می دونید که دلیل آرامشه همیشه کسانی که در جنگها و ها بر علیه کفار می جنگیده همیشه تعریف میکنند بعضی مجاهدین شنیدیم تعریف کردند که در عین جنگ در سخترین شرایط که بر همدیگه توبخانه می زدند خیلی ها تو سنگرها خواب بودند الله تعالی اهرامش میده لذا انسان شما تجربه هم کردی دیگه انسان خیلی ناراحت پریشان و دلش آویزان هست اما همین که خواب میره اس خواب بیدار میشه همین خواب باعث میشه که انسان راحت میشه اون غم کاسته میشه غم کم میشه الله عزوجل خواب را سکون فرموده در قرآن سکن فرموده باعث سکون و آرامش واقعا انسان آرام میگیرد پس اولین چیزی که خدا نصرت کرد و امداد کرد خواب آورد خواب را که آورد و چرت آمد دیگه کم کم اینها دلیر شدند شجاع شدند دلشون قرص شد قوی شدند و دومین نصرتی که الله عزوجل فرمودن باران آمد چنان بارانی آمد که آب زیاد جم شد برای اینها ہوا هم خونک شد آب هم برایشون جم شد و باز این زمین ریگ, ریگ ریگستان شما کسانی که تجربه دار می وقتی که باران بیاد این ریک سخت میشه دیگه راه رفتن خیلی راحت میشه اما اون زمین ملکی که اونها بودند اون تمام گلولای شد خودشون رو از پایشون میافتادن از اینجا روحیه اونها تضعیف شد روحیه اینها خیلی قوی شد این نصرت هایی است که الله اینجا میفرماید اذ یغشی کوم النواس زمانی که تحت پوشش قرار داد شما را خواب خفیف چرت زدن که امنتن برای امنت منه واقع این یک نوع اطمینانی از جانب الله بود که در دلها آرامش بود آرامشی از جانب الله و ينزل عليكم من السماء ماء الله از آسمان آب نازل می فرماید ليطهركم به تا به وسیله این آب شما پاک بگردان قبل از باران هر چی بود وضوی غسل نیازی داشتن با تیمم می‌کردند اما آب کی آمد کلا از نظر ظاهری هم پاک شدند و به عنکم رجز الشیطان و اون وسوسه شیطان را از شما دور بکند ببرد خدا به این خاطر باران می‌فرستد ولیربط على قلوبکم تا به وسیله این دلهای شما را گره بزند ربط بزند یعنی ثبات قلبی پیدا بشید یا بتعبیر امروزیات دل شما قرص بشه و به الاقدام دل کی قرص بشه قدم هم ثابت میشه ثابت قدم میشه لذا الله تعالی تمام اسباب و موجبات استقامت را و نترسیدن را و شهامت را برای صحابه و مجاهدین فراهم کرد و بعد الله تعالی به ملائکه که ملائکه را فرستاد به اون ملائکه هم الله تعالی اعلان فرمود که شما به بندگان من بگوید من همراه هستم من در کنار شون ملائکه در واقع وحی کردند به رسول الله اذ یوحی ربک إلى الملائکه زمانی که وحی می کرد ربت به ملائکه انی معکم یعنی من با شما هستم با ملائکه ملائکه مگه می ترسند نه قولو انی معاکم منظور مؤمنین هستند به مؤمنین بگید که من با شما هستم فرشتها که نمی ترسند ببیند ابلیس آمده بود به شکل انسان در درس بعد می آید انشاءالله که به شکل یک انسانی مشرکین را تقویت می کرد ابلیس آمد و مشرکین را تقویت می کرد دست به دست ابو جهل بود و صفحا را دست تنظیم می کرد و می گفت چطور حمله بکنی چطور بجنگید تا اینکه چشمش به جبرائیل امین افتاد کم کم دستش را کشید و پا به فرار گذاشت تو قرآن میادین این روایتی نیست که کسی بگه خب یک روایتی از معلوم یا زیفه نه تو قرآن آمده ایش رمی خانم ان لذا بعضی معتقدند که همون که ابلیس به شکل انسان آمد بسیاری از ملائکه اینجا ظاهر شدند به شکل انسان اینها آمدن صحابه را تقویت میکردند. لذا به صحابه بگویید به مؤمنین من بگویید انی معكم من با شما هستم فثبتو الذين آمنو یعنی ثابت بکنید ثابت قدم بکنید کسانی را که ایمان آوردند مومنین را صبات بهشون بدهید سئلقی فی قلوب الَّذِينَ كَفَرُ الله اللهمی فرماید این بیانه انی معاکم چطور من با هستم من انقریب در کسان در دل کسانی که کف کردن رعب را مندازم رعب دلشون را بیگیرد فضربو فوق الاناق شما هم کوتاین نکونی وقتی که اونا میترسیدند و پشت دادن گردنهایشون را بزنید فدرق بو فوق الاناق بزنید گردنهایشون را فوق اضافه هست ودربو منهم کل بنان و هر بند دستشون را بزنید هر بند بدنشون را بزنید یعنی اونها را تکه تکه بکنید درس عبرتی برای دیگران درست کنید چرا؟ دلیلش ذالک بی انهم شاق الله و رسوله این بسبب این هست که آنها مخالفت کردند با خدا و رسولش ومن یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب هر کسی که مخالفت کنه با خدا و رسولش همانا خداوند سخت عذاب دهنده هست خدا سخت عذاب میده. ده ذالكم فذوقوه لذا بنا بگیت که ما گفتیم بکفار که این را بچشید این سزا و عذاب شماست در این دنیا و ان للكافرین عذاب النار نتنها در همین دنیا در آخرت برای کافران عذاب آتش است لذا الله عزوجل به ملائک این دستورات را دادند که بندگان مؤمن من را به انها صبات قلبی بدهید به انها قوات قلبی بدهید ملائک هم آمدن انکار را کردن الان یا به شکل انسان آمدن یا به شکل چون روایت ها مختلف است یا به شکل فرشته آمدن رسول الله بهشون خبر داد که ملائکه در میان شما هستند. الان یک بحث اینجا من میخوام خلاصه عرض بکنم آیا ملائکه هم واقعا جنگیدند ملائکه اونجا درگیر شدند حقیقتش اینه که همونطور که قرآن گفته از آیه قرآن معلوم میشه که ملائکه فقط برای آمدند. در جنگ فیزیکی شرکت نکردند و در جنگ فیزیکی نیازی نبود خدای عزوجل خودش میفرماید من فرشته ها را فرستاده بودم که چی که فرشته ها بیایند برای صبات قلبی شما و الا اگر قرار بواسطه جنگ بکنند یک فرشته کافی است یک فرشته مگر جبرئیل امین به تنهایی تمام شهر و اطراف شهر صدوم را که مال قوم لوط بود به تنهایی نبرد از آسمان برعکس سرنگونش نکرد به زمین نزد چرا اینجا جبرائیل با هزار تا فرشت بیاد جبرائیل یک فوت بکنه ابو جل با لشکرش پودر می نیازی نبود ملکه بجنگ ملکه صرف برای تقویت آمدند هم از اشاره آیه معلوم میشه؟ که الله تعالی می فرمای وما جعله الله الا بشرا لكم و لتثمن به قلوبكم ومن و من نصر من عند الله خدا شما را یاری میکند خود خدا به وسیله چمشیرهای خود شما شما را یاری میکند خب این که شاید در بعضی ذهن بعضی سوال ایجاد بشه که تو بعضی از احادیث آمده که صحابه میگویند چون تو احادیث تکوتو داریم که صحابه میگو ما وقتی میرفتیم تا گردن بعضی از کفار را بزنیم ما شمشیر بلند میکردیم جلوتر گردنش میافتاد خب چند مورد را الله از زواجل ب خاطر اینکه اینا اطمینان بکنند و یقین بکنند که ملیک هستند خدای تعال خدای از زوال گردنهایی اونا را زده به نشان داده تا اینها همین باور را داشته باشند که در میان ملیک هستند و ال را اونجا خدای تعالی تو میدان جنگ، که این که به جنگل لازم نبود، نفرستاده بود، میرای که فقط حامی بودن، پشتیمان مودن، تقویت برای تقویت آمدن، تمام کارها را خود صحابه انجام دادند لذا، هنوز این جریان ادامه دارد در آیات میاد اما در بلای این آیاتی که در باره قانون جهاد است. خدا على بيان مي فرميد الله مي فرمد يا أيها الذين آمنوا إن قانون أظلس أي مؤمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا هر وقتك شما ملاقات باك كردت باك ساني ككف كردن زحفا يعني روب روب فلا تول لهم الأدبار بأنها پشت نت يعني أغلب نشيني نكونت فرار نكونت نترسيد ومن يولهم يوم إذن دبره هر كسي ك برگردانه در اون روز پشتش را یعنی پشت بده به دشمنو فرار بکند الله عزوجل می فرماید اون با خشم خدا مواجه البته در دو صورت عقب نشینی جایزه خود الله فرموده مگر بخاطر هنری در جنگ هنر جنگی یا تاکتیک جنگی به اصطلاح، گاهی وقتها بازی از فرماندهان تاکتیکی عقب نشینی میکنند تا دشمن را بیارن به بی اون گرداب بعدن محاصره بکنن حمله بکنن این عقب نشینی تاکتیکی اشکال نداره جایزه این یک صورت صورت دوم او متحیزن الالف یکی از مجاهدین یا بعضی از مجاهدین چنان احساساتی دنبال، دشمن را دنبال کردن تا دور اون را تعقیب کردن زدن دشمن را جلو رفتن الان احساس میکنم ما ده نفر تنهاییم همه سپا پشت سره لذا ما تنها اینجا کار بکنیم لذا عقب نشینی میکنند تا کشته نشوند برام با بقیه برادرانشون در اون صفحه اصلی قرار بگیرند این دو صورت جائزه الا متحرفن لقتال مگر برای تاکتیک جنگی او متحیزن الافعه یا اینکه یعنی جمع به گروه خودش غیر از این دو صورت هر کسی که در جنگ عقب نشینی بکند فقط با ابی غضب من الله همانا این مواجه شد با خشمی از جانب خدا و مقواه و جهنم جایش جهنم است و بیس المسیر بسیار مرجع بدی است ببین وعید سختی است این وعید برای یک مجاهد است خوب توجه کن یک مسلمانی که میره برای خدا و راه خدا می جنگه خدا میگه مورد خشم من واقع شدی جای جهنمه معلوم میشه که عقب نشینی کردن در جنگ گناهش خیلی بزرگه در احادیث مختلفی از رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم روایت شده وقتی که رسول الله را پرسیدن یا رسول الله گناهان بزرگ گناهان بزرگ را برشمردند فرمود شرک به خدا، قتل نفس، انسانها را کشتن به و یکی از گناهان بزرگ فرمودند که در جنگ اغب نشینی کردن معلوم میشه که در جنگ اغب نشینی کردن، ترسیدن از اکبر الكبائره است، از بزرگترین گناهان است خدای تعالی بنده ای که بزدل باشد دوست ندارد بنده خدا بالخصوص کسی که ایمان دارد بنده خدا باید با شهامت باشد باید شجاع باشد باید نترس باشد ترسونه باشد چون که اغب نشینی خیلی ضرر که یکی از ضررها باعث پیش دشمن میشه این ضرر کمی هست دوم باعث تضعیف روحیه بقیه برادران مجاهد و امسنگران میشه بلاخره چند نفر که اغب نشینی میکنند می ترسم بمانند شهید بشم به بهشت برند مگر دنیا تا که ایسا زندگی بکنه ولی اغم نشینی نکنه و نکته دیگر از این می برداشت بکنم اینه که در هر میدانی هر کسی به عنوان مدافع مسلمانان هر کسی به عنوان از کنم که دنبال کننده حقوق مسلمانان میاد و در خط مقدم میسته اون هم نباید بترسه هیچ وقت عقب نشینی نکنه عقب نشینی تاکتیکی عرض کردم در مذاکرات در جنگ در مسائل دیگه اون فرق میکنه مثلا امروز بسیاری از رهبران هستند چه رهبران دینی علمای دینی باشند چه رهبران سیاسی تحصیل کردگان دانشمندان دانشگاهیان چه بقیه سرداران طوایف و سرداران اقوام همه اینها هر یکی که به نوعی بزرگی بر مردم دارند اینها که قیادت و رهبری مردم را در اختیار دارند اینها هر وقتی که میخواند از حقوق مردمشون دفاع بکنند اما حقوق به حق هیچوقت نترسند از هیچ دشمنی نباید بترسند عقب نشینی نکنند ولو اینکه در این مسیر کشته بشند. افتخار است انسان به خاطر حق کشته بشه البته بنده عرض کردم حق منظور این نیست که بعضی از تعصبات قومی رو ترویج بدم و بگم کسی که در راست هست بالاخره اون تعصب جاهلیت رو به پیش ببره مسائل حق رو میگم هیچ وقت انسان باید در مقابل حق عقب نشینه نکنن نترسد دفاع بکنه ولو اینکه دفاعش منجر به شهادتش بشه یک عالم وقتی که از حقوق ملتش حقوق اجتماعی حقوق مذهبی دفاع می کند هم باید که ترس را به خود راه ندهد باید به پیش بره ولو این که هرچی بعد آباد گرچه حکمت و تدبیر و اغلانیت و همه اینها انسان باید رعایت بکند اونها جای خود این چیزی که بند میگم با اونها در تناقض نیست اصلش اینه که خدای عزوجل ترسو را دوست ندارد هر کسی که ترسو است از اول یک گوشه بکشد و خودش را جلون قرار ندهد لذا هر, هر کس، کسی اون کسی که از حقوق ملت ها دفاع میکنند چه در میدان فیزیکی چه در میدان فرهنگی چه در میدان حقوق اجتماعی در هر میدانی باید به پیش بره باید مبارزه بکنه باید تا حق را نگرفته آرامش داشته نباش هیچ وقت ترس را به خود راه نده لذا الله میفرماید که هر کسی که بترسد دارای چنینین اواقی خواهد بود فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله عز میفرماید می فرماید شما اونها را نکشتید خدا اونها را کشت دو کار کرده یکی صحابه مردان جنگیدند. الله می فرماید جمعیت انده که شما باعث شد که اونها کشتی بشند شما اقدام کردی ولی خدا بود و یکی دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دید که کفار همه صف گرفتن و صف خیلی به ظاهر مقتدری هست رسول الله مشتی خاک برداشت و خان شاهت الوجوب و اینها را به اونها پرتاب کرد الله عز وجل بقدرت غیبیش این خاک ها را به چشمهای اونها فرو برد و اونها تک تکشون با همین خاک اولی که رسول الله انداخت اونها دیدشون را از دست دادن نمی تونستن ببینن و بعد مسلمانان حمله کردند و زدند اونها را و چنان در همون حمله اول زدند که دو نفر دو نفر نوجوان دنبال ابو جهل بودند این سردار کف که ابو جهل را بزند و از کسی پرسیدن صحابی گفت امو ابو جهل کدوم یکی هست داد او یکی ابو جهله این دو طرف تا از دو طرف حمله کردند و ابو را چنان بر او حمله کردن که ابو کشته شد وقتی گفته ابو کشته شد همه فرار کردند نه تنها ابو کشته شد تمام کسانی که صحابه را در زمان مکه ازیت می کردن امیه بود امیه را که خود رسول الله زن نیزه ای امیه بود عتبه، شیبه، اینا تمام از سرداران و از سنادید کفر بودن همه اینها کشته شدند همه ریش سفیدها و کتخداها اونهایی که بلوفا می زدن، اونها یکی بعد از دیگری کشته شدن بقیه فرار کردن و هفتاد تا کشته شد هفتاد تا دیگه اسیر شد. الله عز و جل چنان موجودی و چنان آیه بیس هابه نشان داد که سبحان الله الله عز ذا و جل میفرماید فلام تقتلوهم شماون هر نمی کشتی ولكن الله قتلهم اما الله هر کشت و ما رمیتا ای محمد الله و تو نیان داختی اون خاک را از رمیتا وقتی که انداختی ولكن الله رم اما خدا بود کزاد و اون خاک را به چشمانشون فرو برد چرا ولی یبلی المؤمنین منه بلا حسنا الله عطا بکنه اینجا بلا به من نعمت به من عطا الله میخواست که عطا بکنه به مؤمنان عطا زیبا فتح زیبای بهشون بده فتح قشنگی بهشون بده که بوزیر کفر بخاک مالی ده بشه و کمر کفر بش بشکند ان الله سمیع علیم بدون شک الله عزوجل هر سخن شما رو میشنوید و میشنود علیم از احوال قلب و دل شما الله آگاه است الله همه احوال را میداند ذلکم وان الله موهن و کید الکافرین این کار الله چرا کرد حکمت شیعه چون الله عزوجل موهن است زلیل کننده و اهانت کننده مکر و توتعی کافران است خدا میخواست مکر اونها را از بین ببرد سبحان الله مشرکین وقتی که از مکه خارج شدند ابو جهل وقتی که این سپاه خودش را جمع کرد اول رفتم خانه خدا گفتم بیایید اینجا غلاف خانه خدا را گرفتند و گفتن خدای اونجا دعای زیبایی کرده البته گفتن خدایا؟ هر کدام از ما بهتر است هر کدام تر است هر کدام بیشتر بر هدایت است بر مسیر هدایت است او را کمک کن و هر کسی که داره قتل رحمی میکنه چون اونا تنها ایرادی که بعد مسلمانا میگفتن میگفتن قتل رحمی میکنه بین پدر و پسر جدایی میکنن بین برادر و برادر جدایی میکنن چون که ایمان میاره دیگه خود با خود جدایی میشه میگفتن گفتن خدای هر کدوم از ما داره قتل رحمی میکنه رشته ها رو میکنه او اونجا خار و زبون بکن بکنه شکستش بده اللہ تعالی می فرماتے شما اونجا دعا کردید طلب فتح کردید منم جوابت کردم انت تستفتحو فقد جاک الفتح اگر شما طلب فتح کردید یا طلب فیصله کردید فقط جاءكم الفتح فتح فیصله آمد خدا فیصله همینه همین ہے شما گفتی خدا همون طور کرد لذا برای مشرکین هم مشخص شد اونهایی که گریختند فرار کرده میدونستن اونایی که اسیر شدن که ما خودمون از خدا خواستیم فیصله بشه خیلی اونجا ایمان آوردند و انت تنته فهو خیر لكم لذا الله میفهمه این درسی برای تو شد اگر باز, باز آمدید تنته اگر باز آمدید فهو خیر لکم، از چی باز آمدی؟ از مخالفت توحید، از مخالفت قرآن، از مخالفت با رسول الله، اگر باز آمدید، این بهتر برای شما، اما و این تعود و نعود، اگر برگشتید، ما هم برمی گردیم، یعنی اگر دوباره کف کردید، سرکشی کردید، تمرد کردید، ما هم برمی گردیم، با شما راه میبریم. بریم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت الله میفرماید هرگز دور نمیکند دف نمیکند از شما گروهی شما چی زیر ولو اینکه زیاد باشید هر چقدر باشه هزار تا ده هزار تا باشه ولو کسرت هر زیاد باشید چرا وان الله مع المؤمنين اي واعلموا بدانید که خداوند با مؤمنین است خدا با اهل ایمان شما هر چقدر زیاد باشید شما ببینید تاریخ را بررسی بکنید مشکل اینجاست که ما تاریخ مسلمانان را کمتر می‌خونیم تاریخ را بررسی بکنید در تمام جنگ ها مسلمانان از نظر جمعیت اقلیت بودند مسلمانان کم بودند مسلمانان عددی نبودند از نظر عدد از نظر اصله همین افغانستان را ببینید مسلمانان جمیعتی نداشت نسبت به کفار نسبت به هجوم کفار نسبت به تجهیزات کفار اما هر وقتی که مسلمان بر مسیر حق و بر مسیر صحیح بره این وعده الله است وان الله مع المؤمنین بدون شک الله عز وجل با مؤمنین سمعیت خدا نصرت خدا یاری خدا با اهل ایمان هست لذا این قانون اول بود که در سو نباشید بزدل نباشید شجاع باشید الله تعالی انسان های شجاع را مرد را دوست دارد و هر کسی استقامت بکند نترسد بالاخره موفق میشه حتی خیلی از اهل باطل را گاهی استقامت مستقامت میکنن نمیترسند همین رئیس اوکراین ایستاده در مقابل یک بالاخره ابرقدرتی ایستاده شهرهایش ویران شده هیچ چی براش نمونده ولی هنوز استاده می بینیم که روز روز جنگ بنافش داره تمام میشه لذا کسانی که استقامت بل خصوص مؤمن که استقامت بکند حمایت و پشتیبانی خدا هم باش باشد سبحان الله وقت میشه لذا قانون دفم یا ایوها الذين آمنوا اطیعوا الله ورسوله، ای اطاعت خدا بکنید و اطاعت رسول خدا بکنید و لا تولوا عنه و تسمعون و عملا پشت ندهید در حالی که شما میشنوید که خدا چه دستوراتی برای شما دارد ببینید مجاهد در صورتی موفق میشه که مطیع خدا و مطیع رسول باشه جنگ هم برای خودش قانونی دارد در همون جنگ هم نباید ظلم بشه در جنگ نباید ستم بشه حتی نسبت به کفار زنانی، اطفالی، پیرمردانی از کفار اونا اجازه کشتنشون را نداریم یا مثلا اگر با کفار معاهده بستیم قرارداد بستیم اجازه خیانت کردن نداریم شبیخون بزنیم یهو یه از فرصت استفاده بکنیم در هر چیز باید انسان اطاعت خدا و اطاعت رسول را بکند و این اطاعت خدا و اطاعت رسول گرچه اینجا در رابطه با جهاد از آم است در همه امور، در تمام شؤون، در عبادات، در معاملات، در معاشرت، در جهاد، در حکومت داری در اخلاق، در هر چیزی إطاعت خدا وإطاعت رسول والروي غرداني نكوين. والله مي ولا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. مثل مشرکان نباشي. ده. كم يقول يا منافقان كمام شنيدين، أما نمي شنمان، عمل نمي كونان. كسي كي عمل نكوند، او الله تعالی می بترین بدترین مخلوقات بترین چارپایان نزد خدا همین هایی هستند که آیات خدا را مش عمل نمی کنن السم البكم. اون هایی که کرو لال هستند السم البكم. یعنی کرو لال اند الذین لا يعقلون، اون که خرد ندارند اقل ندارند لذا شما مثل اونها نباش فرق یک مسلمان و مشرکی که مسلمان اطاعت میکند مشرک اطاعت نمیکند مسلمان فرمان میبرد مسلمان در یک آیین و قانونی هست اون قانون را بر اون قانون مسلمان را منضبط میکند لذا الله میفرماید السم البكم الذين لا يعقلون بدترین چارپایان و بدترین حیوانات این مشرکان هستند ولو علم الله فیم خیر لاسمعهم خدا ما هیچ خیری در وجود اونها ندیده اگر خیری خدا در وجود اونها میدید اونها رو بیشنواند یعنی انها حالی شمی شد انها متوجه می شدن ولی بالفرض اگر بیشنواند ولو أسمعهم لتولو وهم معرضون اگر بگوش اونها کلام را پیام را دعوات را به رساند، پشت می دهند، ایراز می کنند، گردانی می کنند. بنابر این شما مسلمانان مطیع باشید مثل اونها نباشید. قانون دوم اینه که اطاعت بکنیم، اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. قانون سوم الله می‌فرماید: یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ای مؤمنان، اجابت کنید، اجابت کنید دعوت الله را، و دعوت رسول الله را، برای خدا و برای رسول، هر وقتی خدا و رسول برای شما فرمانی دارند، برای شما دستوری دارند، لبیک بگوید، اجابت بکنید، اذا دعاكم لما يحييكم وقتی که شما را فرا ميخوانند به سوی اون چیزی که موجب حیات شما است ببینید چی چیزی موجب حیات ماست ما چند تا تفسیر این البته هست من خلاصه میکنم یک تفسیر اینه که جهاد موجب حیات شماس واقعا جهاد موجب حیاته وقتی که جهاد ادامه دارد اون ظالم ستمگر دیکتاتور اون ابرقدرت اون جای خودش مینشیند اون دیگه بیشتر انسان نمیکشد میدوند که من اگر دوباره تعرض بکنم دوباره اشغال بکنم دوباره بیایم هستند کسانی که خواب من را میپرانند بعد از اون اگر اون مؤدب نشسته سر جای خودش و تعرضی ندارد به برکت جهاد است، پس جهاد موجب حیات هست یا نیست، موجب حیات هست، اما بعضی میگویند که نه منظور از لما یحییكم تمام شریعت هست، تمام دستورات شریعت باعث نجات هستند، جهادی که از هست، شریعت و قرآن، این هر دو تفسیر تفسیر عامتری هستند، این تفسیر تفسیری راجح‌تر و درست‌تر معلوم میشه معناش اینه که ای مؤمنین اگر شما لبیک بگویید به دعوت خدا و به دعوت رسول الله شما را فرامی خنند به سوی قرآن و به سوی شریعت اگر شما اجابت کردید دو تا فایده برای شما دارد یکی اینکه آخرت شما خوب میشه یکی اینکه حیات شما و دنیا شما هم با موفقیت و با فوض و فلاح میگذرد. ما این را یقیناً بدونید که در احکام شریعت و در احکام قرآن برای ما نسخه فلاح است نسخه نجات است قبلا در ابتدای درس عرض کردم بسیاری از مفاسد دنیا اختلافات دنیا و بسیاری از قتل و خون ریزی ها بسیاری از نامنی ها بسیاری از مشکلاتی که ما داریم همه و همه بر به به این حقوق رعایت نمیشه بر یکی ظلم میشه مال دیگری بالا کشیده میشه فرزند دیگری به ستمی میشه دیگری به گروگان برده میشه انواع خلاف هستند خلاف شریعت لذا جنگ میشه درگیری میشه فساد میشه فساد اخلاقی تمام و تمام به خاطر این است که دستورات شرعی رعایت نمیشه حجاب رعایت نمیشه حیا از بین رفته بیحیائی زیاد شده این بیحیائی که زیاد شده چقدر انسانها ها کشته میشند و جاهایی بدون سر و صدا انداخته میشند اینا تمام خیلی هاست ها اولیا خودشون میکوشند، از بین میبرند. خیلی ها به صورت مرموزانه از بین میره. هیچ نمی دونه بعدا میگه سکت کرد. اینا تمام مشکلات هست به خاطر اینکه به شریعت عمل نیست، به قرآن عمل نیست. انسان ها شراب میخورن کلی فساد، قمار میکنن کلی درگیری، خیلی کارهای دیگه میکنند، کلی فساد میشه لذا عزیزان، اگر ما به شریعت عمل کنیم، به قرآن عمل کنیم، این باعث حیات در دنیا میشه. در همین دنیا لطف و لذت زندگی را انسان میبیند، امنیت، آرامش، محبت، اکرام، ایثار، خودگذشتگی. همه اینا تو جامعه شما می بینید. امروز شما بری بازار میخواید جنسی بخرید چقدر دل تو میل ارزه، دست تو میل ارزه. که کلاهبرداری نکنم نکنن ماشینی می خرید چقدر انسان باتر و ده نفر را می که شما بیا ببینی ای و ایرادی ندار چرا این همه نامنی هست و بعض هم بعضی وقتا می بینید که بالاخره خراب از آب در آمد چرا این همه مشکلات است به دلیل اینکه بالاخره طغوا نیست خدا ترسی نیست کلاهبرداری است مشکلات است حقوق دیگران را تلف کردن زای کردن خیلی از انسان ها بالاخره معامله میکنه یک طرف ناپدید میشه جنس را بر میداره فرار میکنه یا چک میده, میده اصلا محلش خالی هست. یعنی تمام ناهنجاریها به دلیل این هست که حقوق رعایت نمیشه. نه حق خدا رعایت میشه، نه حق بندگان خدا رعایت میشه. بسیاری جا حق خدا پایمال میشه. مثلا کسی شراب میخورد حق خدا را پایمال میکنه. کسی بهیجابی میکنه حق خدا زنا دستور خدا نادیدگی گرفته شده، قمار حق خدا و دستور خدا نادیده گرفته شده کلابرداری حق بندگان اینها وقتی که رعایت نشه جامعه دچار هرج و مرج میشه اما وقتی که همه اینها رعایت بشه حیات شما در این است یعنی زندگی پر آرامش شما زندگی پر سکون شما در همین خواهد بود واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه بدانید که خداوند حائل بین انسان و قلب این اولین برکت استجابت است یعنی وقتی که استجابت کردید دعوت خدا و رسول الله را قلب شما به دست الله است قلب شما را هم تنظیم می کند قلب شما را به سوی خیر هم متوجه می کند اما از این آیه یک مسئله دیگری هم انسان متوجه می شه. ببینید در دنیا هر قدرتی باشد می تواند بر انسان ها هر کاری بکند اما بر قلبش نمی تواند تأثیر بذارد قلبش را آواز بکند نمی تواند. نظرش را فکرش را آواز بکند قلب فقط و فقط به دست الله است به دست رحمان است در حدیث آمده که قلب انسان بین اسبوعی الرحمان بین دو انگشت الله است کنایه از این است که در اختیار الله است لذا اینجا خدای تعالی می خدا بین انسان و بین قلبش حائله یعنی قلبش در اختیار خداست پس اولا چند مفهوم داره؟ یک مفهومش اینه که یه وقتی مغرور نباشید که قلب شما بر مسیر درسته قلب به دست خداست یه وقتی امکان در خدای تعالی در انسان گمراهی ایجاب بکنه خیلی از افراد ما دیدیم شما دیدید اول در مسیر درست بودن بعدم به انحراف کشیده شدن حتما یک عجبی یک تکبر یک غروری کردن خداوند قلبشون را عوض کرده مسیرشون عوض شده یک انسان مثلا بوده پایبند بند صفحه اول شب روز دعا سجده الان اصلا ایمان و اعتقاد نداره موتاد شده بدبخ شده افتاده این قلبش را خدا به سمت و سوی دیگه برده به همین خاطر خدای تعالی به ما دستور داده یکی از دعاهایی که در قرآن داریم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا بار اله بعد از اینکه که ما را هدایت کردی قلب ما را کج نکن ما را در مسیر کجی نبر و دیگه این که بعضی از علماء میگن یک معناش اینه که اگر یک وقتی یک انگیزه خوبی در قلبت آمد یک داعیه خوبی یک فکر خوبی در قلبت و در درونت آمد فورا اقدام خوب بکن چون که شاید این انگیزه تا عبد نماند مثلا یک انسانی هست که خدا تعالی به دلش میده که بالاخره امشب یک پول خوبی هزینه بکنم، دل همه فقرا و را رشاد بکنم، خوشحال بکنم، برای همه افطاری ببرم، برای همه پول ببرم. خب، یک انگیزه‌ای هست وقتی که این انگیزه ایجاد میشه. بقال مولانا اشرف علی رحمت الله عليه که اکی از بزرگان و مسلحان هست ایشون می فرمایند وقتی که یک دعیه خوب در دل شما میاد این مهمانی از طرف خداست برای بره در دل شما خدا ای یک فکری انداخته لذا فوراً این کار را بکن دیر نکن که یک ای وقتی این مهمان نرود شما باز بخوابی بگی فردا یک کاری می فردا صبح که بلند شدی ہزار و سوا سے دیگه بعد اون انگیزه در درون اتنی اس خدا تعالی به سمتی دیگه برده اون را بی همین خاطر شاعر میگه میگه من نمی گویم به فکر سود باش من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش ایز فرصت بیخبر در هر چه باشی زود باش منش اینه که هر کاری که میخوایی بکنی سودی هست دفع زیانی هست وقتی میخوایی انجام میش بدی زود انجام بده این فرصتی که برایت فراهم شده شاید این فرصت دوباره نماند بعضی آستان میگن که ما نامنویسی میکنیم برای حج همین الان برو چون فردا شاید بگه این همه پول برم چرا یک بار رفتم بسی بعضی میگن شاید میخواییم بریم در رای خدا تشکیل بشه. همین الان بکن همین الان این کار را بکن نقدش بکن چون اگر ارز کنم تاخیر بکنیم روز فردا بکنیم دعیه این انگیزه این مهمان از قلبت میره لذا بعضی گفتم مفهوم این آیه وفتي محمد شفي رحمه الله يفهم ايه الله می فرماید وعلموا الله يحول بين المرء وقلبه بدانيد الله حائل هست بین انسان و بین قلب انسان قلب به الله و انه الیه تحشرون و انك بسوي الله عز وجل شما جام کرده می شوید حشر می شید. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه انجا الله عز و ما از فتنه که اون فتنه مخصوص گناهکاران نیستند از اون فتنها ها بیم میده یکی از وظایف مسلمان نهی از منکر است اما متاسفانه امروز اکثر جامعه بی تفاوت است. اکثر جامعه بی است و این بیپروایی از اینزن یک مریضی است انسان بیاحساس بشه بیپرووا بشه نسبت به همسایش نسبت به دوستش، نسبت به برادرش نسبت به هم فامیلش هر کاری میکنه میگه به من چه این بلایی هست این وبایی هست. خیلی ها هستند در جامعه ما گرفتار فساد هستند. انواع فساد. فساد اخلاقی فساد دود فساد میخاری شراب فساد فسادهای دیگر که اینها باعث میشه که انسان اگر بیتفاوت از کنارشون رد بشه اگر به خاطر این گناه ها بیاد اون عذاب تر و خوش کرمی خوب دقت بکنید اون عذاب اون وقت نمی شناسد صالح و طالح را فاسد و خوب را همه را ما دیروز بود که آیه خاندیم در رابطه با قوم یهود که روز شنبه شکار میکردند، یک گروهی آمد من کرد یک گروهی بی تفاوت نشست و یک گروهی خوب همون حیله را کردند الله تعالی می فرمه اونهایی که باز داشتند ونها رو نجات دادیم، ان جینال لذینه، انهاونه عن السوء، انها که مرتکب بودند روزشان به شکار میکردند، اونها رو تبدیل به میمون کردیم، و آخزنال لذینا ظلم و بعذاب بئیس، اما درباره گروهی سوم قرآن چی نگفته سکوت کرده؟ خیلی از مفسران میگن، اینها چون که احساس نداشتند، بی باک بودند، بی پروا بودند، اینها هم به عذاب گرفتار شدند. بازی میگه نه اینها به عذاب گرفتار نشدن علا ای حال دربار یونها اختلاف است ولی غیر از اینها خیلی از اقوام بودن در گذشته که الله تعالی عذاب آورده همه را سوزانده تر و خشک را حضرت زینب بنت جحش که از امهات مؤمنین هست رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم یا رسول الله آیا وقتی که در میان امت صالحان باشند مؤمنان باشند خوبان باشند نیکان باشند باز هم عذاب میاد فرمود نعم اذا کثر الخبث بلی وقتی فساد زیاد باشه و این خوبان فقط به خود گرفتار باشند به خود مشغول باشند خدا همه را عذاب میده خودی همین صالحان را هم عذاب میده ثم بعثوا على اعمالهم در دنیا عذاب میده روز قیامت بعدن هر کسی بر اساس اعمال خودش پیش خدا حاضر میشه اونجا اگر عملش خوب باشه اونجا نجات می یابد اما در دنیا گرفتار میشه چرا بی تفاوت بوده لذا خدا تعالی در این آیه می فرماید که شما از عذاب من بترسید که اون عذاب وقتی که بیاید اون عذاب مال, مال فقط گناهکاران نیست مال گناهکاران و غیر گناهکاران است مال تر و خوشک است مال خوب و بد است چرا چون خوبان بی تفاوت بودند لذا عزیزان تک تک ما وظیفه داریم با منکرات مبارزه بکنید این ماه روزه هست اگر کسانی روزه نیستند جلوشون بیستیم اگر قدرت داریم برادری کوچیکی ما هستند پسر پسرموی ما هستند بزنیم تو گوششون با دست جلوی اونها را بگیریم اعضای خانواده هستند باید جلویشون را بگیریم اگر کسانی بی حجابی میکنند، از ما هستند یا نیستند فامیل هستند یا نیستند بلاخر خواهران باید جلویشون را بگیرند از عذاب خدا بترسونند حد اقل اگر اونها حرف شما را گوش نمی کنند مثل همون آیه که دیروز خواندیم، معذرتن الى ربکم فردا پیش خدا عذری داشته باشیم خدا بگه که چرا شما بیتفاوت بودید بگیم خدا ما گفتیم حرف ما را قبول نکردند. پس به خاطر این که عذری پیش خدا داشته باشیم باید نهی از منکر بکنیم همه وظیفه داریم اونهایی که خدای عزواجل قوت زبان داده با زبان از هر طریق اونهایی که خدای عزواجل قدرت مالی داده دا با مال اونایی که نفوذ داده دا با نفوذ، اونایی که این فضاهای مجازی در اختیارشون هست از این طریق تبلیغ بکنن بر علیه منکرات بر علیه مفاسد بر علیه گناه چونکه گناه وقتی که بیاید امومی میشه اللہ میفرماید واتقو فتنة لا تصیبن الذين ظلموا منكم خاصا بترسید از اون فتنی از اون عذاب خدا واقع فتنه هست لا تصيبن الذين نمی کسانی را که ظلم کردن از شما خاصتا فقط انها به انها نمی و وعلمو ان الله شدید العقاب بدانید الله عزوجل سخت عذاب دهنده هست لذا شما باید با منکرات مبارزه کنید و این هم بخشی از جهاد هست مجاهد مبارزه شما که وقتی مبارزه میکنید شما مجاهد هستید شما وقتی جلویش را میگیرید یا اولا با دست جلویش را بگیرید این این کمال جهاد است درجه اول جهاد است یا با دست نمیتونی با زبان جلویش را بگیرید این درجه دومش هست که در حدیث آمده با دست یا با زبان و آخرین با قلبمون ضعیف ترینش است لذا الله می فرماید واعلموا ان الله شديد العقاب بدان خدا سخت عذاب میده و ذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض الله عز وجل انجا نعمت خودشو یاد میکند این زمانی بود ما جمعیتمون کم بود در حدیث مياد انسان گاهی این آيات را می بیاد اون حدیث می در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند از یک صحابی به شمار جمعیت ما مسلمانان چند نفر است؟ گفتید یا رسول الله بین 700 تا 800 نفریم. اون زمان 700 نفر بودن یا 800 الان سبحان الله 700 یا 800 تا فقط در یک روستای کوچک مسلمان هست. لذا الله مفرمات واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ياد كنيد زماني شما بودت عندك زييف در زمین تخافون ان یتخطفکم الناس می ترسیدید دید که مردم شما را برو مردم چفاول بکنند غارت کنند شما را فآواكم الله شما را در مدينه و ایدکم بنصره الله شما را یاری کرد با نصرت خودش و رزقكم من الطیبات اللہ بشما رزق داد از مالهای پاکیزه همین هر خدا برای شما برای, برای چی داد لعلکو تشکرون تاکه شما بندگان شاکر خدا باشید ما هم ما هم بندگان این خطه یک زمانی ما هیچی نداشتیم الان خدا به ما همه چیز داده هم از نظر مادی هم از نظر معنوی هم از نظر دنیایی هم از نظر دینی بعضی ها هستن شاید می دونند سن نشون ایجاب میکنه که چندین ده قبل یا اگر بعضی ها نبودند اون زمان شنیدند که اگر کسی میمرده کسی نبوده جنازهش را بخوند کسی برای جنازه خواندن نبوده نماز چنان کلمات میگه مردم قدیم را در نماز یاد می‌دادند که آدم خندش میگیره من تو مسجد آمدن ذکر نمی‌کنم یاد نمی‌کنم و در اون زمان بزرگترین عالم کسی بوده مولا به کسی میگفتند که پنج کتاب را، کلمات پنج کتاب را، کریما را فقط بلد بوده بخونت کریما ببخشایی؛ ماناشون را نمیدونستند فقط الفاز را چون زبانشون بالو چی بوده؟ فقط الفاز را بلد بودند این مله بوده اگر معنی را هم میدونسته یعنی ترجمه بلد بوده بهش میگفتن قاضی صاحب یعنی کسی پنج کتاب را با ترجمه بلد بوده اون زمان قاضی بوده اما سبحان الله امروز در یک خانه گاهی نگاه می کنیم پنشیش تا پسر و دختر حافظ قرآن مجید این خیلی نعمتی بزرگی هست ما چقدر هر چی که سجده شکر بکنیم کمه در هر ای در هر ای مکتب قرآن تابلو زده چشم انسان روشن میشه. چنان مساجدی الله عز و به ما داده که قلب انسان روشن میشه. این تماتها نه خیلی بزرگی است از نظر مادی نگاه کنید ابا واجدات ما چی می خوردند اگر یک مشت گندم بریانی به آنها می رسید آنها دیگه خوشحال بودن، شب را راحت می خوابیدند اما الله عز وجل به ما سفره داده الله تعالی به ما ساختمان داده به ما امکاناتی داده که سبحان الله اللہ خیلی بما داده اللہ می فرماید این نعمتها را یاد کنید لعلکم تشکرون تا اینکه شما شاکر باشید اینها عزیزان سجده شکر میخواد تنها سجده شکر کافی نیست شکر زبانی شکر بدنی و شکر فکری انسان اول بی انها فکر بکنه شکر قلبی انسان بی انها فکر بکنه چی بودیم بکجا رسیدیم خدا به ما چی داد و انسان بعد الحمدلله بگه سجده شکر بکنه و بعد شکر عملی اینه اعملو آل داود شکرا ای آل داود که شما هم نعمت مادی دادم پادشاهی دادم هر یکی از ماهای مروز پادشایه همه چیز داره پادشاهان قدیم این امکانات و این خانه که ما داریم نداشتند لذا اعملو آل داود شکرا هم نبوت به داد هم پادشاه عمل کنید لذا شکر بدنی ما عمل است، شکر بدنی ما دوری از گناه است، شکر بدنی ما سجده خدا است. روز به نماز، به طاعت به بندگی، به صدقات به فرمان از خدای از رجوع, رجوع کنیم. رجوع کنیم. الله از بعد اضافه میکنه. این همه شکرها را شما بکنید. لی این شکرت دین شما را اضافه میکند، ایمان شما را تقویت میکند. علم را خدا بیشتر میکند مادیات را خدا بیشتر میکند دین دنیا را خدا ترقی میده لذا الله می‌فرماید لَعَلَكُمْ تشکرون تا اینجا سی قانون خاندیم قانون چارم را می‌خانیم. یا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ خدا در قانون سوم دوم فرمود، اطاعت خدا و رسول بکنید، اینجا میفرما خیانت نکنید با خدا و رسول. سبحان الله یکی از بدترین ها و های زشت خیانت از خدا از خیانت نجات بده خیلی در جامعه ال خائن زیاد شده کسانی که خیانت میکنند با دینشون خیانت میکنند با برادرانشون خیانت میکنند با قوم و فامیلشون خیانت میکنند با نزدیکترین افرادشون خیانت میکنند و برای انسانها هر جا چا اللہ می فرماید نہ با خدا خیانت کنید نہ با رسول خیانت کنید و نه امانت هایی که فیما ما بین شما است راضی هست اسراری هست خیانت نکنید انتم تعلمون شما میدونید این آیه در واقع شان نزولی دارد شان نزول را عرض بکنم بعدا آیه را ترجمه میکنم انسان بیشتر که خیانت میکنه به خاطر زن و بچه یا زنوبت چش میخواد محفوظ بماند بعضی وقتها بعضیها خیانت میکنند چون از طرف دشمن بی انصاف تهدید میشه که نسبت به زنوبت چه تر روز میشه بهترین افراد تزبیم میره این مجبور میشه خیانت بکند بعضی وقتها انسان یک نقطه زعفی دارد روی نقطه زعفش دست میگذارند و انسان میاد خیانت میکنه لذا خیانت بزرگترین گناه است اما ببینید اصحاب رسول الله سبحان الله ما نمیگیم صحابه معصوم نیستند ولی محفوظ هستند کوچکترین اشتباهی از اونها میشد به غیر از اینکه پیغمبر باخبر بشه وجدان بیداری اونها میزد اونها را میزد تو مغزشون تو سرشون اونها میرفتن توبه میکردن یک صحابی به نام ابو لبابه رضی الله تعالی او که اسمش را این صحابی به عنوان مذاکره کننده از سوی رسول الله فرستاده شد بره با بنو قریزه مذاکره بکنه چون زن و بچهش همون جد در همون معلل زندگی می و می ترسید که یه وقتی به زن و بچه من آسیبی نرسونند این صحابی وقتی که رفت چون میدونست اینجا تصمیم گرفته شده که بنو قریزه خیانت کردند با در جنگ احزاب و در جنگ خندق انشاءالله در سوره احضاب می با مشرکان همراه شدن بعدا رسول الله به خاطر این خیانتشون مردانشون همه را کشت اما اونها چون با ابو لبابه بالاخره ارتباط داشتن آشنایی داشتن می شناختن پرسیدند که مشوره خود چی است ما چی کار بکنیم ما تسلیم بشیم یا نه ابو لبابه هیچی نگو، فقط اشاره که دست را به حلقش که شما را میکشند، فقط همین جا کشید و بس، بعد همون جا متوجه شدم که من خیانت کردم، این رازی بود، من نباید به این میگفتم، این هم خب تو اسیر بودند، دیگه در معاصره بودند، گرچه بعدن اونها گفتند، یکی از صحابه که در زمان جاهلیت با اونا حلیف بود هم پیمان بود حضرت سعد رضی اللہ تعالی نهو که زخمی هم شده بود گفتن سعد را اگر بگیم هرچی سعد گفت ما قبول داریم سعد برای ما چی میکنه ارفاخ میکنه سعد هم فیصله سعد را قبول کردن سعد رضی اللہ تعالی نهو آمد و گفت یا رسول الله فیصله من اگر میخواهند همه اینها را از دم تیغ بگذارن همه را بکشید. همه را مردانشون را کشتن یا 600 نفر یا 800 نفر الان ای حالین ابو لبابا این اشاره را که کرد فوراً رفت خودش را به ستون مسجد و نبی بست گفت ابو لبابا خیانت کرده لذا اونجا زار زار گریه می کرد میگن تا 6 روز به مسجد بسته بود رسول الله گفتن چی شده گفتی یا رسول الله این راز را به کفار گفته الان خودش را بسته به مسجد و خلاصه بعد از شش روز توبه ایش قبول شد. الله عز دستور دادند که این توبه ایش قبول شده و این برگردد. آن حضرت فرستاد که بهش بگن بشارتش دادند که خودت را باز کن. هر بار فقط به وقت نماز خودش را باز میکرد. دختره کی داشت دختره کش او را باز میکرد و وقت نماز میخواند دوباره او را میبستد. و هیچی هم نمی خورد. چند بار غش کرد از حال رفت. ولی گفت تا وقتی خدا منو نبخشه من خودم خودم را نمیبخشم تا اینکه وقتی بهش خوشخبری دادند گفت بازم سوگند یاد کرد خودم را باز نمی کنم تا زمانی خود رسول الله با دستان مبارکش منو باز نکنند. رسول الله تشریف بردند به خاطر اطمینان قلبش او را باز کردند و این شکر خدا را به جا آورد. الان اون ستون هنوز هست شما اگر برید میبینی مردم نماز توبه همون جا گرچه بنا بنای جدید است ولی این ستون در محل همون ستون بنا شده اون بالایش با خط سبزی ترکان عثمانی نوشتن ها دهی استوانت توبه یا ها دهی استوانت ابو البابا لذا هنوز همون محل همون جا نزدیک حجره شریف هست در مسجد النبی و نزدیک این منبری که گذاشته اینجا نزدیک این منبر لذا اون استوانه هست بین منبر و حجره اینجا ابو خودش را بست تا اینکه باعث شد الله تعالی توبهش را قبول کرد لذا الله تعالی می فرماید یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان لا تخونوا الله والرسول شما خیانت نکنی با خدا و رسول و تخونوا و خیانت نکنی با امانات هایی که پیش شماست یعنی با که این رازها به عنوان راز در قلب شما امانت هستند و انتم تعلمون در حالی که شما می دانید <سيطور> <ملاب> أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ ما فِتْنَةً واولادكم فتنه بدانید وأولاد کہ مال ها شما و اولاد شما فتنه هستند اینا چی اند فَرِيبِ فتنه هستند لذا شما فری به مال و اولاد الله عنده أجر عظيم خیانت نکردید هر چقدر سخت شد برای شما برای اولاد شما برای فرزندان شما صبر کردید خدا به شما اجر عظیم میده اجر عظیم در دنیا و در آخرت یعنی خداوند شما از زوجل شما را از محلکه نجات میده شما را از مخمسه نجات میده لذا عزیزان خیانت مفهومش را تا شما میدونید اسرار مسلمانان را و اسرار اهل ایمان را و اخبار سری اهل ایمان را پیش غیر بردن و به اونها گفتن خیلی ها هستند برای کشورهای دیگه جاسوسی میکنند اینها اینها بزرگترین خیانت هست اسرار یک کشور اسلامی را و بسیاری از مسائلی که اینجا مخفی هستند به دیگران گفتن به دیگران رساندن یا اسرار برادران مجاهد را خیلی از مجاهدین بودند در معركه های مختلف جهادی چه در افغانستان چه در فلسطین اینها بهترینها شهید شدند یادگگیر شدند به سبب خیانت بودند به دشمن میگفت دشمنم میزده موشک مستقیم اونجا را هدف قرار میداده این خیانه تا بزرگترین ضربه را به انسان می‌زند و خیلی‌ها بودند که توبه نکردند با همین خیانت کشته شدن خدا می‌دونه اونجا الله برایشون چه عذابی در نظر دارد لذا الله تعالی قانونی دیگر برای ما بیان می‌فرمایند که ما خائن نباشیم نسبت به برادران خودمون نسبت به دین خودمون هم دینهای خودمون هم کیشان خودمون ما بلکه اسرار اونها را اخبار اونها را مسائل اونها را عیوب اونها را حتی بجاهای نجیم اگر ای دارند خودمون اصلاح بکنیم خودمون اونها را نصیحت بکنیم ولی نسبت به اونها خیانت نکنیم یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله این تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطير الاولين صدق الله العظيم درو الشريف اللهم صل على محمد نبينا وسلم صليت على ابراهيم عليه السلام وكافن محمد در آیات گذشته که موضوع این سوره موضوع جهاد بود پنج تا قانون چهار تا قانون قبل ازین در رابطه با اینکه اهل ایمان و اهل جهاد چه مواردی را و چه نکاتی را باید رعایت بکنند خاندیم و در این آیهی که تلاوت گردید قانون پنجم هست خداوند تعالی دستور داده که شما در هر حال تقوار خدا ترسی را داشته باشید در واقع تقوی نسبت به چی؟ در جهاد انسان با دشمنان مواجه هست با مخالفان مواجه هست نسبت به اونها هم انسان باید تقوا را رعایت بکند انسان غدر نکند خیانت نکند ممن در همه حال و در همه جا و در همه صورتها باید با تقوا باشد طرف شما هر کسی هست طرف شما دوست دشمن خودی بیگانه هست حتی وقتی که شما با یک غیر مسلمان با یک غیر مسلمان اگر معامله می کنید با او برخوردی دارید با او داد و دارید باید شما نمونه خدا ترسی و پیکر تقوا باشید اونجا خدا را باید در نظر بگیرید این نگاه نکنید که این چون خدا را قبول ندارد من کلاه بذارم سرش نه مسلمان در هر صورت باید خدا ترس باشد حتی در رابطه با دشمنان خدا لذا الله می فرماید ای مؤمنان ان تتقوا الله اگر شما از خدا بترسید یجعل لكم فرقان خدا تعالی به شما فرقان میده فرقان را دو تفسیر برای فرقان دوتا تفسیر عرض می کنم. یک تفسیرش فرقان یعنی واقعات و مسائل و حوادثی خدای تعالی پیش میاره که حق و باطل تشخیص داده بشه خوب و بد تشخیص داده بشه یعنی خدای تعالی شرائط پیش میاره که شما مشخص میشه که برحق هستید و دشمنان شما بر باطل اون شرایط چیه مثلا شرایط فتح به همین خاطر به بی روز بدر الله تعالی در قرآن مجید فرموده یوم الفرقان بدر روز فرقان هست چونکه خدای تعالی به وسیله فتحی که به مسلمانان داد شرایط حق و باطل مشخص شد ما در درس دیروس خاندیم که ابوجهل غلاف خانه کعبه را گرفت قبل از اینکه حرکت کنه بسوی میدان بدر و دعا کرد گفت خدایا هر کسی بر از ما بر هدایت است بر راه درست هست بر مسیر صحیح هست او را پیروز بگردان و هر کسی که قط رحمی می کند بین پدر و فرزند فاصله ایجاد میکنه او را شکست بده اشارش به پیامبر خدا و مسلمانان بود او فکر میکرد از نظری او هم هر کسی که در جنگ پیروز شد او حق است و هر کسی که شکست خورد او بر باطل است البته این نکتر من خدمت شما ذکر بکنم که این لازم نیست، حتما اهل حق در جنگ پیروز بشن امکان داره یک روزی در جنگ شکست هم بخورند در جنگ احود شکست بود اونجا خب یک سری ها و ضعف های را خدا تعالی می میکند اما اس حکمت اصلی اونطوری که از آیات قرآن بر می آید و ما این آیات را قبلا خوندیم اینه که اگر قرار باشد در هر جنگ خدا به مسلمانان پیروزی بده نصرت خدا هست اما هر جنگی مسلمان چه شرایط را رعایت میکنه چه رعایت نمیکنه چون مسلمان مسلمان است و چون کافر کافر است هر جنگی تا شروع شد کافر شکست بخوره کافر خار و زبون بشه کافر پش بده کافر فرار بکنه، خدا چینی اینی شرایطی فراهم بیاره اون وقت تو همین دنیا مشخص میشه نه اینکه بلغیب بلکه علنی به صورت آشکارا که اینها یه دست غیبی پشت سرشون هست مسلمون خود به خود مشخص میشه که اینها مسیرشون مسیر درسته مسیر حقه اونا مسیرشون باطله لذا کفار وقتی که این شرایط را ببینند از ترس شده هم همه ایمان میارند خدا تعالی دستور داد ایمان بلغب، این دیگه ایمان بلغب نشد ایمان به مشاهده شد خدا تعالی علنی داره نشان میده که تا کافر میاد تو میدان خار و زبون میشه به این خاطر خیلی معرکه ها هستند که برای مسلمانان هم شکست میاد برای مسلمانان هم مشکلات میاد چون خدای تعالی همه چیز را بر اسباب قرار داده اما در کنار اسباب بندگانش وقتی که کاملا او, او را باور داشته باشن یاری هم میکند علا ای حال خود ابو جهلی دعا را کرده بود پس معلوم بود از نظر او معیار حق موفقیت و پیروزیست یعنی هر کسی که در جنگ پیروز و حقه پس واقعین این جنگ جنگی چی بود؟ سرنوشت سازی بود. این جنگ جنگی بود که حق و باطل حتی بر اساس دیدگاه کفار در این بود که هر که پیروز بشه اون حقه. لذا خدا تعالی با جمعیتی که یک سوم جمعیت کفار بود بدون هیچ اسلحی بدون هیچ آمادگی در اون جنگ مسلمانان را پیروز کرد. این را خدا می فرقان فرقان یعنی زمینه فراهم آورد موفقیت شما را آورد تا که مشخص بشه شما برحق استید تفسیر دوم فرقان فرقان اینه که خداوند به انسان مومن چنان صلاحیتی میده چنان استعدادی میده و چنان کمالی میده که خود به خود حق را از باطل تشخیص میده خوب را از بد تشخیص میده همو فراست مؤمن که گفتن در حدیث فراست بهتر از فراست مؤمن خدا به مومن چنا فراستی میده در حدیث شریف میاد این بحث تقوا هر وقتی که برای یک مسلمان زمینه گناه فراهم میاد ولی او گناه نمی کنه او از گناه خودش را عقب میکشه همین که زمینه گناه فراهم میاد، زمینه حرام خاری فراهم میاد، زمینه کلاهبرداری فریب دادن طرف فراهم میاد، ولی نمیکنی چون از خدا میترسی. زمینه نگاه کردم به حرام فراهم میاد، ولی انجام نمیدی چون از خدا میترسی. همین که تغوار انسان رایت میکنه، هر گناهی که انسان از او فاصله میگیره یک نوری در قلبش پیدا میشه. که این نور بزرگتر میشه و بزرگتر، آخر دل روشن میشه. دل چنان روشن میشه که این مومن را خدا تعالی فراستی میده، حق را از باطل تشخیص میده. پس این فراست مومن، این فرغان، این قدرت تشخیص حق از باطل به برکت چی حاصل میشه؟ به برکت تغواه. به برکت خدا ترسی پس تفسیر دوم دو فرقان اینه که خدا تعالی چنان نوری چنان عطایی چنان قدرتی به شما میده که شما حق را از باطل تشخیص میدید لذا الله می ای مؤمنان ان تتقوا الله اگر شما با تقوا باشید اگر شما خدا ترس باشید اگر شما از خدا بترسید یجعل لکم فرقانا الله از زوج شما فرقان قرار میده، فرکان ارس کردم یا فتح و پیروزی یا اینکه در دل شما قدرت تشخیص، تشخیص حق از باطل پیدا میکنه خود با خود اون وقت کسی از شما مشوره بگیره که این راه را انجام بدیم، این راه درسته، اون راه، این کار رو بکنیم، اون کار خدا تعالی خود با خود چنان فراستی، چنان راهنمایی، چنان هدایتی، چنان نوری در قلب میده خوب تشخیص نه این راه درسته. و هم درست نشخیص میدی و یکفر عنكم این برکت اول تغواست یجعل لکم فرقانا برکت دومش و یکفر عنکم سیعاتکم هرچی که گناهان شما شما اشتباهات زندگی شما همه را خداوند کفاره می فرماید همه را خداوند محف می فرماید هیچی براجمه گناه نمیذاره. و سفرم الله شماره می والله ذو الفضل العظیم اشاره به این است که تنها بخشش نیست. تنها اگر ما بخشیده بشیم به این خداوند بسنده نمی فرماید. خداوند اکتفا نمی فرماید. علاوه از بخشش شما خیلی بر شما فضل می کند. ما هرچی که در قیامت و در بهشت انشاءالله خواهیم داشت از فضل خدا خواهیم داشت خدا که ما رو میبخشه اما تنها به بخشش بسنده نمیکنه فضل میکنه خیلی لطف میکنه چنان جایگاه و چنان مقام و چنان رتبهی به بندگان مؤمن خودش عطا کنه که اونها با عمل خودشون با سعی و تلاششون به اونجا نرسیدن با فضل خدا به اونجا میرسن به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و وسلم توصیه فرمودند که همیشه در دعاها از خداوند فضلش را بقاید تا زمانی که فضل خدا نباشد هیچ چیزی شامل حال شما نمیشه والله ذو الفضل دارا عظیم دارای فضل عظیم است و اذ يمكر بك الذين كفروا او یقتلو که او یخرجو اینجا خدای عز و اشاره می فرماید لطف دیگری نعمت دیگری احسان دیگری بر مسلمانان و بر رسول الله اشاره می فرماید به جریان هجرت جریان هجرت واقعاً یک جریان بسیار بزرگی هست مسلمانان در مکه مکرمه خیلی اذیت بودند کفار مشرکین به اوج سرکشی رسیدند تا جایی که میتونستن شکنجه میدادند تا جایی که میتونستن اذیت میکردند تا جایی که میتونستن مزاحمت میکردند تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و در خواب دیدند در خواب دیدند که خدای عزوجل دستور داد به یک نخلستانی یه منطقه‌ای که همش نخل بود و درخت خرما بود و نخلستان بود اونجا هجرت بکنه رسول الله صلی اللہ وسلم متوجه نشدند کجا هست فکر کردن که شاید این منطقه هجر هست منطقه هجر بحرین یا منطقه یمامه هست ذهنش به مدینه نرفت منتظر بود که خدا تعالی دستور بده که هجرت آغاز بشه تا اینکه وحی آمد و خداوند فرمود که به به هجرت کنید یسرب مدینه هست بعدا رسول الله متوجه شد که اون که در خواب دیده اون نخلستان نخلستان یسرب است اسمش یسرب بود بعد از این که رسول الله تشریف بردند و شهر رسول الله شد شد مدینه النبی امروز که بهش مدینه میگویند اصلش مدینه النبی هست یعنی شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم لذا الله در خواب دیدند به رسول الله نشون دادند و بعد در بیداری اعلام فرمودند و قبل از اون اهل مدینه در دو جریان بیعه عقبه میگم بیعت عقبه که آمدن با رسول الله بیعت کردن دو سال متوالی اعلام کردن یا رسول الله ما همه آمادگی داریم حمایت کنیم لذا آن حضرت دستور دادن که صحابه کم کم برن به طرف مدینه به طرف یسریب صحابه می رفتند گروه گروه می رفتند دسته دسته می رفتند همه رفتند کسی نماند آن حضرت صلی علیه علیہ وسلم منتظر دستور بودند خود رسول الله ماندن، ابو بکر صدیق سیدنا علی و تعداد بسیار کمی از صحابه بقیه همه رفتند اما مشرکین مونده بودند که چکار بکنند هر روز تصمیم می گرفتند تصمیمشون لغو می شد تا اینکه جلسه تشکیل دادن در دارون ندوه همون محل اجلاس همیشگیشون محل مشورهای همیشگیشون اونجا نشستن و تمام سران و تمام بزرگان قبائل و طوائف جمع شدند و اونطوری که در روایتها آمده اتفاقاً ابلیس ملعون به شکل یک پیرمرد با تجربه کارکشته منطقه نجد که منطقه در قسمت شرق بود که زیاد اهل مکه اونجاها را نمیشناختن از اون منطقه به عنوان یک شیخ نجدی یک پیرمرد نجدی و آدم با تجربه هم وارد جلسه شد و شریک این جلسه شد اونجا بحث شد مشوره شد گفتن چه بکنیم یکی از سران گفت که تبعیدش بکنیم یارانش که رفته اینا هم بیرون کنیم از, مدین، از مکه این شیخ نجدی این پیرمرد کارکشته نجدی به ظاهر نجدی بود گفت نه نه این کار را نکنید اگر این بره بیرون جمعی را اطراف خودش جمع میکنه همطور یارانش رفتن دیگران را هم جمع میکنه و بعد برای شما موی دماغی میشه برای شما خطر میشه شما اصلا تصمیم برای تبعیدش نکنید. بعضی مشوره دادن که بگیریم زندانش بکنیم دست و پاش را زنجیر و زولانه بکنیم و قیدش بکنیم حبسش بکنیم تا نتونه تکان بخوره نتونه کوچکترین فعالیتی بکنه باز پیرمرد نزدیک خالت که نه این کار را نکنید. اون وقت اون دوستانش اون یارانش اون آ، آ، افراد با وفایش اونها حمله میکنند، اونها حجوم میارند، بالاخره شب روزی وقتی میاند خطر برای شما نجاتش میدم، میبرم با خود و باز هم برای شما مشکل میشه. آخرین مشوره ابوجهل داد زمین که های دیگری هم داده شد، ابو جهل گفت بهترین راهش اینه که ما چند نفر جوان را از تیرهای مختلف از های مختلف و قبائل مختلفی تعیین بکنیم یکی از این قبیله یکی از اون قبیله که همه حمله بکنند به وقت شب حمله بکنند ایشون را از پای در بیارند از بین ببرند بعدن بنوحاشم میخواد با کدوم یک طرف بشه کدوم قوم را میخواد قصاص بکنه درگیر بشه اون وقت همه جمع میشیم پول جمع میکنیم دیش را میدیم کارش تمام میشه. اون پیرمرد نجدی تایر که بهترین مشوره همینه, همینه همین کار را بکنید. از یک طرف این مشوره داری میشه از یک طرف الله مهربان اون ربی که همه چیز را کنترل میکنه. ما گاهی از تدبیر دشمن می ترسیم گاهی ما از مکر و نیرنگ دشمن می ترسیم اگر ما با خدا باشیم خدای از از بالا مکر می فرماید تدبیر می فرماید خداوند تمام نقشه ها را تمام مشوره پشت درهای بسته را کنترول دارد خداوند نمی که هر مکری اجرایی بشه هر مکری عملی بشه اگر خدا میگذاشت دیر وقت بود که مجموعه اهل حق از بین رفته بود بالخصوص اونهایی که ضعیفند نتوانن حامی ندارن پشتیبان ندارن قدرت مادی ندارند. دیر وقتی بود که دشمنان اینها را از بین برده بودند پایمال کرده بودند. اثری نبود از دین و دین حق ولی همیشه وقتی که انسانها مومنین بر مسیر صحیح باشند بر مسیر حق باشند باید پشتیبانشون را خدا را بدونند و پشتشون گرم باشد. لذا اینها از اینجا دارن تدبیر میکنن دارن نقشی میکشند الله الله عزوجل از بالا می بیند، جبرائیل را دستور داد که به نبی من، به پیامبر من اعلام کن که هجرت کنید. وقتی که جبرائیل آمد خدمت رسول الله صلی اللہ وسلم و دستور آمد را ابلاق کرد، عین ظهر بود رسول الله رفتم خانه ابو در زد، ابو بکر آمد چه خبره یا رسول الله در خدمتم گفت خداوند دستور داده هجرت میکنیم امشب میریم آماده باش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ از قبل شطرها را و یک مردی به عنوان راهنما آماده کرده بود لذا انها را دستور آماده باش داد وقتی که شب شد سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی کرم الله وجه را بجای خودش قرار داد علی. تو اینجا باش که ما میریم امانت های بود به او سپورد توسیح های کرد به او کرد تو پشت سر ما بیا. چون برای سیدنا علی خطری نبود. مشکل اونها با رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بود. و حضرت صلی اللہ علیه وسلم را افتادن ابو بکر بردن اشون رتاجا شطرها از اونجا اون, اون را رفتند و در اون غار غار شب سشب انجامند. بقیه جریان هجرت در سوره توبه می آید علا ای حال این آیه در رابطه با همین است که الله می فرماید اونها هم مکر می کردند اونها نقشه میکشیدند. ما هم از بالا نقشه میکشیدیم. کشیدیم ما هم تدبیر می کردیم ما هم برنامه ریزی می کردیم اما برنامه ما تدبیر ما نقشه ما بهترین نقشه ها هست چون الله عالم الغیب هست مکان و ما یکون را میداند از آینده و گذشته میداند لذا الله بهترین تدبیر را کرد لذا ما هم اگر ارز کردم باز هم تکرار میکنم اگر ما در مسیر درست باشیم در مسیر صحیح باشیم اهل حق دشمن کم ندارند تمام اهل باطل دشمن اهل حق هستند ما اگر مؤمن واقع باشیم و انتم الاعلون شما هم موفقید شما پیروزید شما تردست و بردستید اگر مومن باشید لذا الله می فرماید و اذیم کرو الذین کفرو زمانی که نقش می کشیدن تدبیر و توتعی می کردن نسبت به شما کسانی که کفر کردند چه نقشه ای؟ که تا اینکه شما را زندان کنند یخلوکه یا اینکه از پای در بیاورند شما را بکشند او خرجو که یا شماره اخراج و تبعید کنند یکی از این کارها را با شما بکنند و یمکرروونه و یمکررو الله آنها مکر می کردند آنها تدبیر می کردند آنها توطمی کردن و الله الله از بالا تدبیر برای نجات و برای موفقیت شما می کرد خدا دیگه مقدر کرده بود که این پیامبر ما هجرت بکند اونجا بره مدینه نبی حکومتش را تشکیل بده و در مدت بسیار کمی تمام دنیا را و کمتر از هشت سال بعد از هشت سال دوباره بیاد همین مکه را هم فتح بکند هنین و طائف و همه جاها را فتح بکند لذا این تدبیر الله بود این نقشه الله بود و بعد نقشه الله ادامه یافت بعد از این پیامبر جانشینان این پیامبر شاگردان راستین و با این پیامبر نهزتش را ادامه بدند ابر قدرت های بزرگ را ایران اون زمان را روم اون زمان را به پای از پای در بیارم بزانو زانو بز بنشینند و تمام دنیا را فت کنند بعدن نه ایرانی ما نه عراقی ما نه افغانستانی ما صفات تا سند و هند رفتن و از یک طرف تا اندلس و ایتالیا و اسپانیا و تمام بلاد را سبحان الله در مدت کوتاه صحابه خلفاء راشینی فت کردند. لذا این تدبیر الهی و نقشه الهی این بود که تمام جهان بید تحت سیطره ای اسلام اینجا در مکه پناگاهی نیست ببینید قدرت خدا را جای نیست که نماز بخونن نماز را قاچاقی بی ولی الله عزوجل این جور برنامه‌ریزی کرد بظاهر ترک وطن بظاهر رسول الله آه و حسرت میکشید تو حدیث آمده اون کلمات را من یاد نکردم که رسول الله چه ابراز احساساتی به مکه کرد خیلی مکه را دوست داشت هر کسی وطن خودش را دوست دارد اما مکه یادگار ابراهیم و اسماعیل مکه جایی که بیت امن الهی اونجا هست لذا رسول الله با دلی ناخواسته با دلی پرخون و حسرت مکه را ترک کرد اما الله تعالی ببینید چه تدبیر فرموده بود چه نقشه الله فرماید و ویمکر الله آنها مکر میکردند تدبیر میکردن و الله الله هم از بالا تدبیر میکرد والله خیر الماکرین اما الله بهترین تدبیر کنندگان است بهترین نقشه بهترین ریز الله است لذا الله عز و جل به این صورت پیامبر عظیم و شعن خودش را نجات داد، جریان هجرت اتفاق افتاد و بعد از جریان حجرت که در ادامه می خانیم. اما اینجا خدای تعالی زجر و سرزنش می فرماید، و توبیخ می کند. اونها ای را که می ما مثل این قرآن می تونیم بگیم، یکی, یکی نه چندین مشرک بودند، اما یکی قابل توجه نظر ابن حارس، و میرفت داستان و افسانه بیشتر داستان ها و افسانه های عجم دروغ و واقعیت نداشتن. اونها را حفظ میکرد میگفت که این قرآن از گذشتگان برای شما تعریف میکنه من هم مثل این تعریف میکنم برای شما لذا او آمد تعریف کرد چی گفت وقتی که تعریف کرد الله عزوجل آیات نازل فرمود وإذا تتلى عليهم اياتنا هر غبرانان ايات ما حيات القران تلاوت مشي، قَالُوا قَدْ قد سمعنا استكبارا تكبرا ميگوین ما شنيديم لو نشاء قلنا مثل هذا اگر ما بخاهي ميگوي مثل اين انها ذا الا اساطير الاولين ان نيسمگر افسانه هاي پيشينيان و واقعا جسور بودند چقدر نمی ترسیدند که می گفتند هم این آیه در رابطه بان همین نظر ابن است و هم در باره ابو جهل است نظر ابن گفت که خدای اگر این, این قرآن واقعا از طرف تو هست ما را عذاب بده بر ما بجای آب سنگ ببارن ما را سنگ باران کن و ابو جهل هم دیروز خاندیم که وقتی که خاص بره گفت خدا ای اگر اینها بر مسیر حق هستند اینها را پیروز کن ما را شکست بده اونجا خدای تعالی اول مرگ و موت خودش را فراهم آورد اول خودش کشته شد زیرا الله می فرماید و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك زمانی که آنها گفتند بار الها اللهم این دعا را خدا قبول کرد اللهم إن كان هذا هو الحق اگر این حقاس من عندك از جانب تو است این کلام کلام تو علينا حجارة من السماء بباران برما سنگ بباران از آسمان او وقتنا بعذاب علیم یا برای ما عذاب دردناک بیار اما خداوند میفرما چرا من فعلا عذاب نمیدم چون ای محمد صلی الله علیه و تو در میانه شون هستید وجود رسول الله رحمت است وجود نبی رحمت است زمانی که نبی باشد عذاب نمیاد وقتی که نبی از این شهر بره بعد خدا میفرما به حسابشون میرسیم و ما کان الله ليعذبهم خداوند عذابشون نمیده و انت فيهم در حالی که شما در میانی انها هستید و ما کان الله اما یک مانع دیگری که عذاب نمیاد هم خدا ذکر میکنه اون چیه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون خداوند اونها را عذاب نمیده چون اونها استغفار میخوانند. یعنی چی اونها استغفار میخوانند؟ بعضی که میگویند چون در لابلای مشرکین مومنین هم بودن مومنین مستزعف اونهایی که بزاعتی نداشتند توانی نداشتند نتونستن هجرت کنند اونها خدا را یاد میکردند همواره ذکر میکردند استغفار میکندند به خاطر استغفار اونها خدا عذاب نمیده بعضی این توجیه را آوردند اما توجیه و تفسیر که بیشتر اهل تفسیر میکنند اینه که چون مشرکان استغفار میخندند، گاهی از خداوند می گفتن خدا ما را معاخذ نکن، به خاطر این استغفارشون خداوند اونها را عذاب نمیداد. حالا بحث ما اینجاست، مگر دعای مشرک و دعای کافر هم قبول میشه؟ بله، دعای مشرک و کافر در امور دنیا قبول میشه یعنی یه چیز دنیاوی بخواد از خدا امکانش هست که قبول بشه امکانش هست که پذیرفته بشه از آیات مختلفی از قرآن مجیدیم به اثبات رسیده یکی اون ای که در رابطه با خود ابلیس هست شیطان هست که خداوند میفرماید شیطان ابا کرد از سجده انکار کرد و کافر شد چون فرمان خدا را قبول نکرد کافر شد اما با وجودی که کافر شد بعد دعا کرد گفت که رب انظرنی الى یومی و بعثون خدایا مرا تا روزی که همه بنده ها را از قبر بلند میکنی تا اون روز من مهلت بده منو نکش من کار دارم عصبانی بود بر این نسل جدید بر انسانها که سبب بدبختی شدند خداوند دعایش را قبول کرد کامل نه قال انك من المنظرين الى يوم يبعثون شما مهلت داده شدی اما تا روزی که الى يوم الوقت المعلوم تا اون روزی که وقتش مشخص پیش خدا خدا میدونه هر وقتی من بخوام مهلت داری باش پس دعای ابلیس قبول شو معلوم میشه که دعایی که اگر بکنند تو این دنیا و خداوند من مسلحت ببیند میپذیرد استدلال دیگر خداوند خودش میگه در رابطه با مشرکان میگه که اذا ركبوا في الفلك هر وقتی سوار کشتی میشدند اونجا وقتی که سیلابی گردابی می آمد و موج می آمد دعو الله مخلصین له الدين خالصتا خدا را صدا می زدن و می گفتند تو کمک کن لا ان اگر ما رو نجات دادی از این مخمسه و از این ملک لا نكونن من الشاکرین ما بعد از اون بندگان گزاری برای تو خواهیم بود خب اینا با وجودی که مشرک بودن دعا میکردن خدا میفرماید فلان من انجام من نجاتشون میدادم دوباره وقتی می آمدن شرک میکردند پس در همون حال شرک دعا میکردن دعایشون را خدا قبول میکرد بس هر وقتی که کافری مشرکی دعای می کند بعید نیست که این دعایش در امر دنیا قبول بشه به همین خاطر اینجا فرمود اونا استغفار میخواند از خدا مغفرت میطلبند طلبند خداوند تا زمانی که مسلحت می بیند عذابشون نمیده. همچنین اعمال کفار و مشرکین این نکته قابل توجه است اعمال خوبی که انجام میدن مثلا امروز تبشیریها ها هستن مسیحیان هستند تو جنگل های افریقا دارن به بینواها به فقرها به گروسنگان کمک میکنن این اعمال آ برایشون نف ادارت بله در دنیا امکان داره که وضعیتشون روز به روز بهتر بشه وضعیت رفاهیشون وضعیت مادیشون وضعیت زندگیشون و چه بسا همین اعمال نیک گاهی باعث میشند که ایمان هم نصیبشون بشه یعنی بعضی بندگان خدا هستن خیلی هم دردی دارن خیلی دلسوزی دارن خداوند اززوجل این لطف اونها را نسبت به بندگانش میبینه خداوند هم لطف میکنه به اونها ایمان میده معرفت و شناخت خودش را میده اونها بعدا مسیر درست را انتخاب میکنه پس اعمال هم بی تأثیر نیست اگر یک مشرکی یک کافری عمل نیکی انجام بده یک خدمت خوبی چون بعضی وقتا بعضی سوال می کنند که خیلی مخترع هستند خدمت کردن برای انسان ها بعضی ها این برق را اختراع کردن بعضی ها این تلفن را بالاخره خلق کردند ابتکار کردن بعضی ها این ماشین ها را هواپیما ها را چقدر انسان ها امروز راحت هستند خب اینها این, این همه خدمت به انسانیت کردند هیچ فایده بین ها نمی چرا در دنیا فایده بهش می اما چون که ایمان نداشتن در آخرت نه خداوند می فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب کسانی که کف کردن اعمالشون مثل سراب هست. سراب از دور فکر میکنی که آب هست نزدیک میری می بینی که نه این ریگ هست از تشنگی جان میدی اینا هم عملی میکنه فکر میکنه چون ایمان ندارند فکر میکنه برایشون نتیجه داره. ولی پیش خدا وقتی که آخرت میاد چون ایمان نداشتند لذا سراب پس تفسیر دوم همینه که خودشون چون استغفار میخوانند خدا عذابشون نمیده اما بالاخره روز خدا تصمیم میگیره اما حال این شبه برای شما برای بنده دیگران ایجاد میشه پس مشرک تا زمانی که ذکر کنه استغفار کنه از خدا آفیت بخواد از خدا امنیت بخواد خدا عذابش نمیده نه بقیه عمل کردش هم مهمه خداوند میفرماید ببینید که اینها قابل عذاب هستن به خاطر بقیه عمل کردشون خیلی از کفار مشرکین بودن در دنیا تا آخرین روز ایمان نیاوردن ولی عذابی هم برایشون نیامد چون که اونها به غیر از کفر کاری دیگه نکردن بد نکردند بد نرسوندند به خصوص را آزار ندادند دوستان خدا را انبیا را اذیت نکردن فقط ایمان نیاوردن به خاطر ایمان نیاوردن خدا عذاب نمیده چون که دنیا دار عذاب نیست دنیا دار جزا نیست دنیا دار امتحانه عذاب اون دنیاست اما بعضیا که ظلم میکنند بعضیا که ستم میکنند اینجا خدا گوشمالی میده. هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دلی نیامد به وقتی که دل صاحب دلان را دل انبیاء را به درد می‌آورند اون وقت خدای عزوجل عذاب چنان چنانچه در آیه بعدی همین خداوند بیان فرماد. و ما لهم الا يعذبهم الله چی شده اینها را که خدا اینها را عذاب نده چرا عذاب نده در حالی که اینها وهم یسدون عن المسجد الحرام اینها باز میدارن از مسجد الحرام اینا نمیگذاشتن کسی نماز بخوانند بالخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وقتی می آمد نماز می خاند نمی نمیگذاشتن صحابه نماز نمیخا نمیخواندند قاچاغی دوزدکی جای دیگه میخاندن تا اینکه عمر فاروق رضی الله تعالی ایمان آورد و گفت که من از این بعد میرم کی جرت داره بیاد جلوی نمازی منو بگیره لذا از شاخدارها میترسیدند ولی بقیه زوافار عذیت میکردند چنانچه روایتی هست حضرت عبدالله ابن مسعود تحت این آیه میآید این روایت را که فرماید یه روزی عبدالله بن مسعود یک آدم فقیری بود کسی را نداشت در مکه یه روزی هم حمایت کرد از رسول الله صوری را خاند خیلی کتک خورد تا جایی که بیهوش شد لذا می فرماید که من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده در نماز میخواند، چند تا از بزرگان قریش بودند ابو جهل بود عطبه بود شیبه بود ولید ابن عطبه بود امیه بن خلف بود و بعضی دیگه بودند ابو جهل گفت که فلانجا امروز شطوری کشتند کی همت میکنه از شما بره شکنبهش را بیاره که همون شکنبهش را همون هرچی نزاستش هست روش بذاریم همین که بسجده میره یکی از اون کفار سرسخت به نام اقبه ابن ابی معید اقبه ابن ابی معید گفت من میرم میارم اون بلند شو فورا رفت اونجا همون شکومبر آورد و همون بطن و شکم به اسطلاح شطور که پر از نجاست بود ابو جهل و اون اقبه هر دو بردند روی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در همون حالی که در سجده بود گذاشتند این بار و سنگینی آن حضرت در همون حالت سجده بود عبدالله ابن مسعود میگه من میترسیدم، من خیلی ضعیف بودم، نتونستم کاری بکنم، دلم به درد آمد، دیدم که فاطمه دخترکی کوچیکی هست و گریه میکند و فرار میکند، آمد اون را برداشت از سر آن حضرت صلی عليه علیه وسلم و گفت که شما ظالم ها چرا پدرم راضیت میکنید؟ لذا اون افرادی که اونجا بودند، عبدالله ابن مسعود میگه از آن حضرت شریندم که بر علی اونها دعای بد کرد. گفت خدای قریش را معاخزه کن خدای ابو جهل را معاخزه کن اطبای ابن ربیع را کن شایبای ابن ربیع را کن ولید ابن اطباه را کن امیه بن خلف را خدای معاخزه کن اقبای ابن محیط، ابی معید را بگیر و یک نفر دیگر را نام برد که من فراموش کردم البته راوی میگه خود ابن مسود راوی بعدی ابن میمون میگه من فراموش کردم یکی دیگه از راویان میگه من یادم هست گفت اماره ابن ولید این هفت نفر را رسول اللہ نام گفت این هفت نفر هفت اثران بودند هفت نفر از اون شاخی ها و گنده های قریش بودند اینها را نام برد عبدالله ابن مسعود میگه قسم به خدا من وقتی که اون قلیب بد را دیدم اون ای که همه کشتهای بد را اونجا انداختند و رسول الله اونجا آمد اونها را خطاب کرد دیدم هر هفت نفر تو اینها هستند هر هفت نفری که اینجا اون حال را و اون تمسخر را بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم آوردند بعد از هجرت یک سال طول کشید سال دوم هجری در ماه رمضان جنگ بدر بود اینها تمام کشته شدند و رسول الله فرمود جنازه را یک قلیب یک چاله حفر کنید تو اون بندازید همه را اونجا سر به سر انداختند ابن مسود میگه من آمدم هر هفت نفری که در اون دعا رسول الله نام برد هر هفت نفر را دیدم اونجا هستند لذا الله تعالی اینجا همین اشاره میکنه چرا عذابشون ندم؟ اینها شما را نمیزارن که نماز بخونید از مسجد الحرام باز میدارن و خودشون را متولی میدارن مگر متولی نه هستند متولی مسجد باید اهل تقوا باشند اونایی که از شرک پرهیز میکنن نه اونها که شرک میکنند لذا الله يفرميت وما لهم الله يعذبهم الله چه شده چرا خداون انها را عذاب ندهد در حالی که وهم یسدون عن المسجد الحرام انها باز دارن از مسجد حرام ما كانو اولیاءه انها نیستن اولیاء مسجد انها نیستن متولیان واقعی متولی واقعی کی باید باشه ان اولیاءهو اللا المتقون نیست اولیاء اون مسجد الحرام مکر اهل تقوی اونهایی که از شرک و کفر پرهیز میکنند ولیکن اکثرهم لا یعلمون اما اکثرشون نمیدونند فکر میکنه هر کسی از فلان تیره بود از فلان قبیله بود اون میتونه متولی باشه نه متولی اهل تقوا هستند و بعد اینها نمازی نداره نمازشون چیه نمازشون کف زدن و سوت زدن هست و ما کان صلاتهم عند البیت الا مخا و تسدیا نماز اونها نزد بیت نیست مگر مکا و تسدیا مکا بعضی میگن کف زدن هست و تسدیا سوت زدن هست بعضی برعکس میگویند منظور نمازشون چی شده اینه که فقط اونجا هورا بکشن اونجا داد و فریاد راه بندازند این نماز اصلش نام خشوع هست، نام خضوع هست، نام تواضع هست، راز و نیاز هست امروزه هم بعضی رسومات را گشت در مناطق ما نیست، در مناطق جاهای دیگه هست بعضی ها تو مسجد به نام ذکر تبل میارند بعضیها که خودشون را اهل تصوف میدانند موسیقی استفاده میکنند اشعاری شاید شنیدید اشعاری قوالی میگویند در زبان اردو بیشتر هندوستان و پاکستان هستند اشعاری در مدح خداوند در مدح رسول الله صلی علیه و وسلم و مسائل دینی اما با ساز و با دهل و با موسیقی اینکه دین نیست این قاتی کردن دین با از کنم محرمات هست چیزهای حرام اینا حرام هستن مطلقاً الان در مناطقی ما گاهی شنیده میشه بعضی میگن که اشکال نداره در حالت ذکرم تبل بزنیم در حالت ذکر قدیمه صوفیه داشتن صوفیه واقعی نداشتند اونایی که داشتند غنا داشتند موسیقی داشتند اونها اهل باطل بوده اهل حق سادات صوفیه به شدت تو کتاب هست به شدت رد می کنند غنا را موسیقی را تبل را تار را هر چیزی که باشد به وقت ذکری نه درست نیست این ذکر خدا نیست این توهین به خدای عزوجل رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بعثت لمحق المعازف والمزامیر من مبعوث شدم من فرستاده شدم تا موسیقیات را این دهلو تار دو تار و ستار را از ببرم اینا آمدن میگن نا ما ذکر خدا را با اینها می کنیم آدم بواجد میاد. چرا انسان با یک چیز باطل بواجد بی چرا انسان با چیز نامشروط تحریک بشه چرا با یاد خدا کی یاد حقیقی باشد انسان تحریک نشه لذا خیلی حاصل در مساجد خدا را توریاد میکنند، توری ایبادت می میکنند که از شکل عبادت خارج میشنند، و گاهی بلا نسبت عربده میکشند. این ایبادت نیست، این ذکر نیست. مشرکین هم به بگمان خودشون ایبادت میکردند مگر اونها چرا خودشون را متولی خانه خدا میدونستند؟ چرا خودشون را متولی کعبت الله میدونستند؟ میگفتن این محل عبادت هست. اینجا اما عبادت عبادت من در آوردی عبادت که باید طبق دستور خدا و سنت رسول الله باشد لذا هر کسی که می‌خواد به این صورت عبادت کنه هر کسی که می‌خواد به این شکل ذکر بکنه این دلیل بطلانش هست کسی که با آلات اللعب آلات بیهوده آلات سرگرمی آلات موسیقی و حکم سرود خواندن و شعر خواندن ولو اینکه این شعر و سرود تعریف خدا باشه و تعریف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشه با موسیقی همینه چرا حلال را با حرام ما قاتی بکنیم پاک را با ناپاک ما آمیخته بکنیم چرا بدونی نمیشه مثل حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه شاعر رسول الله که در مدح رسول الله شعر می سرود والدعاء کرد از صلی اللہ علیہ وسلم آن صلی الله علیه و سلام بدون اینکه انسان متوسل به بشه لذا الله می فرماید وما کان صلاتهم عند البيت نماز اونان از نزد بیت نبود الا مكا و تسديا مگر اینکه کف زدن بود و سود زدن بود فذوق العذاب بما کنتم تكفرون عذاب رب این در بدر خدا گفت شما که با پیامبری من اون رفتار را کردید شما که با عبادات ما اون تمسخورات را داشتید بچشید عذاب ما را بما کنتم تکفرون بسبب کفرتان بسبب ناسپاسیتان ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله هم درباره همین اهل شرک و اهل باطل هست گرچه مصداق اولیش ابو جهل است که پول جمع کرد و گفت که ما یک مجموعه تشکیل بدیم، پول خزینه بکنیم تا اینکه ما یک لشکری، یه سپاهی، یک ارتیشی بر علیه مسلمانان تشکیل بدیم. مردم مکه پولهاشون را دادند. الله می‌فرما این پول فردا حسرتی میشه. این پولتون به جایی نمیرسه. و بعدا برای شما حسرتی میشه خیلی ها هم امروز مصداق این آیه هستن خیلی از اهل باطل هزینه میکنن پول خرج میکنن برای اینکه مسلمانان بر علیه مسلمانان الان این پولشون چندین مصرف داره یکی از مصارفش اینکه که اسلحه درست میکنن اسلحه آماده میکنن یکی از مصارفش جاسوسو افراد مخبری در میان مسلمانان میزارند بزرگترین مصرف را در این روزها مصارفی که ادارات و وزارتخانهها دارند اون مجموعه ای که مال همین تجسس و اطلاعات هست دارند لذا یک بخشی از پولشون را بعضیها بر علیه مسلمانان در زمینه اطلاعات و تجسس و کسب اطلاعات و خبرگیری از میان مسلمانان مصرف میکنند یک گروهی صرف میکنه پول را تا از این طریق بالاخره بعضیرها را به طرف خودشون جذب کنه امروز کلیسا خیلی تبلیغات میکنه تو این فضاهای مجازی بسیاری از فقیر فقرا میرن به طرف اونها میگن بیایید از فلان کلیسا هم انجیل را تحویل بگیرید هم حقوقتون را تحویل گیرید مبلغ هنگفتی هم بهشون میدم بعضی از فقر میرند لذا اینا دلشون خوشه که دارن بر علیه اسلام بر علیه مسلمانان هزینه میکنن پول مصرف میکنن با پول میخایید دین را به پیش ببری این دین قطعا دین باطل هست دینی که با پول میخواد به پیش بره دینی که با خزینه مالی میخواد به پیش بره دین با که انسان با جان و دل قبول بکنه هیچ وقت یک قلب را پول نمیتونه تغییر بده ظاهر را تغییر میده به خاطر نیازش، به خاطر مشکلش میاد با تو همراه میشه اما قلبش را درونش را نمیتونه تغییر بده لذا الله عزوجل اینو افراد که هزینه میکنند سرمایه دارند چه افراد و سرمایه داران باشند چه دولتها باشند چه مؤسسات تبشیری باشند مؤسسات خیریه که در زمینه های مذهب میخواند با پول مردم را هم مذهب خودشون بکنند این خطاب اونهاست متوجه اونهاست الله میفرماید ان الذین کفرو ینفقون اموالهم لیسدو عن سبیل الله همانا انهای که راه کفر برگزیدن انتخاب کردن ینفقون أموالهم خرج میکنن مالشان را لیسدو عن سبیل الله تا از راه خدا باز بدارند به راه شیطانی خودشون مردم بران برگردن اما اللہ می فرمد فسیون فقونها ان قریب این پولها را انفاق میکنند هزینه میکنند خرج میکنند خیلی خرج میکنن پولهاشون را خیلی مصرف میکنند برای مردم مثلا شما ببینید امریکا در بعضی از بلاد مثل افغانستان چقدر سر مز... سرمایه گذاری کرد شوروی چقدر سرمایه گذاری کرد چند میلیارد دلار اینجا هزینه کردند چقدر حقوق دادند چقدر اجیر گرفتند اما آخر ناکام شدند خیلی می بینیم که پول جواب نمیده عکس میشه مسئله برای اکس میشه الله میفرماد فصینفقونها ثم تكون عليهم حسرا این پیشگوی قرآن مجید را خیلی جاه می میتونه ببینه سپس اون پول حسرتی برایش میشه بی خود چرا دلارها هم اونجا مصرف کردم ثم يغلبون سپس مغلوب میشن شکست میخورند یعنی برنمهایشون همه شکست میخورد این در دنیاست شکست آخرت خطرناکه والدین کفر رو جهنم يحشرون حشرون انهایی که کفر کردند و برای کفر و کفر و شرک ترویج شرک پول خرج کردم به سوی جهنم حشر می شوند در آخرت به سوی جهنم برده می شوند لیمیز الله الخبیث من الطيب چرا یحشرون چرا حشر می به سوی جهنم که خدای اززوجل ناپاک را از پاک تشخیص بده جدا کند که متمایز بکند جدا کند خبیث را یعنی شرک را ناپاک را کفر را من الطیب از ایمان از توحید از پاک و یجعل الخبیث بعضه علی بعض خبیث را یعنی گند را نجس را خدا بعضی را بر بعضی ببینید هر چی که مذاهب باطل هست ولی اینکه با هم دیگه تفاوت دارند همه خبیث هستند چون در همه اونها غیر الله پرستیه شما ببینید غیر از دین اسلام هر چی که ادیان در دنیا هست همه ادیان غیر خدا را پرستند یک گروهی هست صلیب را می پرستد گروهی دیگه ایسا و عیسیٰ مسیح را می یک گروهی هست آتش را می پرستد گروهی دیگری هست مجسمه بودا را گروهی دیگری گاف را گروهی دیگری خورشید را هر یکی یک چیزی را میپرستد همه چیز پرستن غیر الله پرستن فقط دین اسلام است که تو این دین خدا پرستی هست لذا این نعمتی هست که خدا به ما داده و باید شاکری این نعمت باشیم الله می فرماید که وی يجعل الخبيث بعضه على بعض همه یکی هستند همی ادیان باطله اهل خوب سند اهل فساد هستند بعضی رب بعضی قرار بده فیرکمه جميعا همه را سر به کند خداوند فاجعله فی جهنم در جهنم قرارش بده هم الخاسرون الله می فرماید اینها اینو مبلغین مبلغین کی خزینه میکنن تا به سمت سوی اینو مذاهب باطل بندگان را ببرند اینها زیانکارند زیان دنیا و آخرت قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولین اینجا الله عزوجل بعد شکست در بدر به بقیه کفار یه حشتاری دیگه دادند یه تذکر دیگه دادند این زمان دیگه ابو جهل کشته شد بقیه خیلی از سردمداران کفر و شرک کشته شدند کسی که در رأس باقی مند ابو صوفیان بود ابو صوفیان هم ادامه داد تا سالها ولی آخر دید نتیجه نداره بالاخره ایمان آورد و تسلیم شد اللہ می فرماید قل للذین کفرو بگو به کسانی که کفر کردند این اگر باز بیایند از شرک از اداوت مسلمین از درگیر شدن با مسلمانان باز بیایند یغفرو لهم ما قد سلف بخشیده میشه تمام گزشته در گذشته هر اشتباهی کرده هر خطایی کرده هر گندی داشته همه معاف میشه اما و این یعودو تحدید است اگر دوباره برگردند همون راه مخالفت راه کفر و شرک فقد موت سنت الاولین وقت این هوشدار هست که سنت اولین گذشته یعنی عادت و سنت الهی در میان اولین می بینید که خداوند با اولین شما چکار کرد با پیشینیان شما چیکار کرد چگونه در خاک ذلت اونها را ذلیل زبون کرد فقط ماذا سنت الاولین لذا وظیفه شما مسلمانان چیه این موضوع اصلی سوره است که عرض کردم موضوع جهاد است وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه شما با اونها بجنگید تا فتنه نباشد فتنه نباشد و یکون الدین كله لله دین و غلبه دین همه برای خدا باشد اینایت داشته باشید آیا ما ما مسلمانان که یکی از وظایف ما و یکی از احکامی که خدا متوجه ما فرموده جهاد است ما جهاد میکنیم تا مردم را مسلمان بکنیم نه خیر اگر مسلمان بشم به نفعشون هست اما اگر مسلمان نشدند هیچ مسلمانی اجازه نداره بل اجبار کسی را مسلمان بکنه اون اسلام و ایمان جبری به درد نمیخوره خدا قبولش نداره خداوند اسلامی را قبول داره که اختیاری باشد خب وقتی که چینین هست پس جهاد برای چیه ببینید جهاد دو نوع جهاد داریم یکی جهاد دفاع که بیشتر جهاد ان حضرت صلى الله عليه وسلم جهاد دفاعی بودند هر وقتی که دشمن میخواست حمله بکنه دشمن میخواست که یک فتنه درست کنه شر درست کنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دفاع می کردند لذا دفاع از مسلمانان دفاع از حریم مسلمانان دفاع از حد و حدود مسلمانان از مرزهای اسلامی از خود مسلمانان لذا در صورتی که بیبینیم مرزی از مرزهای مسلمانان مورد تعرض قرار گرفت مورد تجاوز قرار گرفت مورد اشغال قرار گرفت یا بر مسلمانان ستم میشه ظلم میشه اون وقت جهاد متوجه بقیه هست که شما دفاع کنید شما امتی واحده هستید لذا همه حکومت های اسلامی که متاسفانه در رأس حکومت های اسلامی کسانی هستند که ظاهرشون مسلمانه است اکثرا اما باطنشون قلبشون باهمنه است چه روز با اونها مشوره در با کفار این حکومت های اسلامی باید اتحادیه تشکیل بدند و این اتحادیه باید همواره از مسلمانان در تمام دنیا دفاع بکنه. هر جا که کشوری از مسلمانان مورد اشغال و حجوم قرار گرفت همه یک ارتش واحد داشته باشند همه دفاع بکنه اون وقت ببینید آیا بر هیچ مسلمان ستم میشه؟ آیا در گوشه از گوشه های دنیا مثل چین آیا مسلمانان نسل کشی میشند؟ این نیست یکی از انگیزه ها و علل و اصل از کنم که دلائل اصلی جهاد دفاع هست و دوم جهاد اقدامی هست جهاد اقدامی اینه که در صورتی اقدام میکنیم که کفار دوچار فتنه هستند ببینید یعنی از اون قرارداد و از اون مصالحه ای و از اون توافق نامه‌ای که بین ماها هست اونها چیکار میکنه اونها ادول میکنه اونها سرکشی میکنن اونها نقض عهد میکنن مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فتح مکه اقدام کردن در حالی که دو سال پیش در حدیبیه برای ده سال معاهد بسته بودن گفتن ده سال نما با شما کار داریم نه شما با ما کار داشته باشید نما با شما می جنگیم نه شما با ما بجنگید نه ما با حلفاء شما می جنگیم کسانی که با شما هم پیمانان نه شما با هم پیمانان ما به جنگید در سالش شم این معاهده بسته شد دو سال بعد مشرکین مکه قریش مکه با گروهی از قبائل به نام بنوبکر اینها شبانه حمله کردم بر یه گروه دیگر به نام خزاعه که خزاعه مسلمان نشده بود غیر مسلمان بود اما چون به رسول الله پناه آورده بود با مسلمانان هم پیمان بود لذا در اون معاهده بود که به هم پیمانان ما مسلمانان شما کار داشته نباشید اونا خیانت کردند اونا عهد را شکستند وقتی که عهد را شکستند رسول الله اقدام کردند حرکت کردند با سپاه ده هزار نفری اینجا دیگه دیدن کار خراب شد ابو سفیان آمد قبل از اینکه رسول الله به مکه برسه گفت یک فرصتی دیگه به ما بدید آن حضرت فرمود دیگه نه تصمیم من را گرفتیم اینجا بود آخر ابو صوفیان تصمیم شد پس ببین جهاد اقدامی در صورتی هست که اونها فتن انگیزی بکنند اونها فتنگری بکنند و اینکه که مسلمانان پیشرفتشون با شمشیر بوده نه خیر هرگز مگر مسلمانان ابتدار چه قدرتی داشتند فرار کردن از دست ستم و در جریان بدر جمعیت مسلمان ببخشی در جریان فتح مکه جمعیت مسلمان چند نفر بود؟ ده هزار نفر با ده هزار نفر رسول الله آمد و مکه را فتح کرد دو سال بعد رسول الله وفات کرد در سال دهم هشتم مکی فوت شد در سال دهم ده رسول الله وفات کرد از این دنیا رفتند این زمان 120 یا 130 هزار نفر صحابی بودند خب بعد از اون جنگی نبود به اون صورت همه بعد به دین اسلام گرویدند آمدند با قدرت شمشیر نبود یعنی دوازده سیزده برابر شدند فتح مکه در چه سالی بود؟ در سال هشتم از بیست رسول الله چند سال گذشته بود؟ بیست و یک سال گذشته بود در ظرف بیست و یک سال جمعیت ده هزار نفر بود دو سال بعد که بدون جنگ بود جمعیت به صد و بیست هزار نفر رسید علت چیه؟ علت اینه که این فتح و پیروزی و موفقیت با قدرت شمشیر نبود با تعلیمات درست بود با راهکارهای درست بود با اخلاق بود لذا الله تعالی می فرما بجنگید حتی لا تکون فتن فتنی نباشی فتنی یعنی غلبه شرک غلبه اهل کفر چون اینا وقتی که غلبه داشته باشند تغوار رایت نمی کنند ظلمی کنند و یکوند دین کلوه لیلہ و غلبه برای دین خدا باشد دین همه برای خدا باشد اونا هم باشند ولی اونها به تعهدات خودشون بر دین خودشون عمل بکنند مگر رسول الله در مدینه بود یهود نبودن اونجا مسیحیان نبودن اونجا بعدن بلاد که فتح شد مگر حضرت عمر حضرت ابوبکر مگر گفت که بزور مردم را مسلمان بکنی نه مردم ایران مجوسی بودن کار خودشون را میکردن کردن فقط فتح کرده، اما وقت دیدند. سبحان الله این فرشتند اونا به اسلام گرائش نشون دادند تمام این بلاد حتی فرهنگ مسلمانان را گرفتند این بلاد بلاد عاجم بودند مصر لیبی اینا کشورهای آفریقایی عراق فارسی زبان بودند همه اینها یا ابرانی بودند یا سوریانی شام همه امال از کن ابرانی ها بود اما وقتی که مسلمانان آمدند هم لباسشون عربی شد هم زبانشون عربی شد هم فرهنگشون اسلامی شد به خاطر اینکه از بس که از مسلمانان متاثر شدند لذا الله می فرماید وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله فاین انتهو اگر بعض آمدند آنها از فتن انگیزی فان الله بما يعملون بصير خداوند به اون که عمل میکنن بیناست و این تولو اما اگر اونا پشت دادن به فتنه و شرک خودشون ادامه دادن و فتنه انگیزی مشرکانه فعلمو ان الله مولاکم بدونی خداوند حامی شماست نعم المولا و نعم النصیر بهترین حامی خداست و بهترین یاور خداست خدا شما خوب یاری می لذا الله عز وجل مجد یاری و نصرت دادن وعلم و ان ما غنمیم تو اما بعد از اینکه بفتتح شد خداونده از زواجل درباره غنیمتهایی که اول سوره خواندیم اینجا مجدت ذک میفرماد حکمی و غنیمت ها رو بنده عرض کردم که بعضی با هم اختلاف کردن گفتن این غنیمت ها مخصوص جنگجویان است بعضی گفتند نه اونایی که پشت صحنه بودن همه سهم دارن الله می فرماید بدانید اونچه که شما غنیمت گرفتی می شی از هر چیزی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ خمسش یک پنجمش برای خداست ببین یک پنجم و خمس از غنیمت از غنیمتی که به دست میاد از کفار مال خداست مال خداست یعنی چه یعنی در اختیار خدا در اختیار رسول الله هرچی که رسول الله هر جا که مصرف میکنه بعضی مصارف اجازه شدند مثلا ولذ القربى برایخی شاوندان و الیتاما برای یتیمها و المساکین برای مسکینها و ابن السبيل برای مسافران اینها مصارف هستند پیامبر اینجا مصارف میکنه یک پنجم چهار پنجم دیگر مال غنیمت مال مجاهدین مال کسانی که پیروز شدند هست پس چهار پنجم مال مجاهدین یک پنجم در اختیار رسول الله است ما در قرآن مجید واجه خمس همی یکی را داریم و همچنین در احادیث هست از خزائنی که شما پیدا می کنید از رکاز و کنز و خزانه ها و معادنی که خدا به شما میده، از اونجا دیگه شما زیاد زحمت نمی کشی پول هنگفتی به شما میده، اونجا هم خمس هست یک پنجمش در رای خدا بدید بقیه مال خودتون که زحمت می کشید غیر از این مال بقیه مالی که شما دارید مال تجاری شما است مالی که شما درامت شما است، داد و ستت می زحمت می کشید مالداری می کنید گسفند شطور و بقیه کارها فقیه اصناف تجارت این یک پنجم نه یک چهلوم که زکات اسمش یک چهلو میشرا در سال در م... راه خدا به مصارفی که خداوند فرموده در سوره بعد میاد در سوره توبه اینما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین هشت مصرف هستن خدا ذکر فرماد به اونها مصرف کنید لذا کلش این هست دیگه نیست که بلاخره خمس گرفته بشه خمس فقط از اون مالی هست که اون مال از طریق جنگ و غنیمت میاد و چهار پنجمش مال غانمین مال مجاہدین یک پنجمش مال این مصارفه. الله می فرماید این کنتم آمنتم بالله اگر شما این مقتضیه اول است یعنی این می طلبت که شما چون مومن هستید طبق دستور خدا خرج کنید طبق میل خودتون نه و ما انزلنا على عبدنا این مقتضی دفم است اون چیزی که ما نازل کردیم بر بنده بر رسول الله یوم الفرقان در روز فرقان یوم الفرقان روز بعد رو میگن روز فیصله خدا خوب فیصله کرد یوم التقل جمعان روزی که دوتا جمع با هم دیگه ملاقات کردند دو گروه مسلمانا، مسلمانان کفار با هم دیگه ملاقات داشتند برخورد داشتند در اون روز خدا این امر را بشما داد والله على کلش این قدير نه اینکه تنها اونجا خدا بر هر چیز قادر هست خدای قادر ینصر الاقل و یهزم الاکثر اون اقل را اون جمعیت اندک را یاری می کند و جمعیت زیاد را خدا شکست میده. اونجا چطور شکست داد الله تعالی می فرماید در ادامه می فرماید اذ انتم بالعدوت الدنیا زمانی که شما در کناره نزدیک بودید و هم بالعدوت القصوى و آنها در کناره دور بودند نزدیک یعنی نزدیک از مدینه دور دور از مدینه چون دو طرف اون میدان این ای که نزدیک مدینه بود صحابه اینجا چادر انداختند و اون ای که ابو با سپای خودش بود دور از مدینه اونجا اونها بودند و پایینتر به طرف دریا قافله ابو سفیان اون قافل تجاری بود و رکب و اسفل منکم و اون کاروان پایین تر از شما بود که اونها رد شدن رفتن به مکه رفتن. حالا این دو تا جماعت با هم روبرو شدن. ببینید جنگ بدر از قبل وعدهی نبود. خدای تعالی شرایط رفت را هم آورد. خدا خواست که اینا روبرو هم بشند. اگر از قبل وعده می شد شاید خلف وعده می کردن. میفرماید: ولو فرماید. لختلفتم فی المعاد، اگر شما با هم دیگه وعده میکردید در وعده خلف وعده میکردید اما خداوند خاصی کاری فیصله به الله امرا کان مفعوله خداوند از اینجا مسلمانان را به خاطر اون کاروان به خاطر اون قافله از مدینه بیرون کرد اما طوری خداوند تدبیر فرمود که اون کاروان در بره از اون طرف سفاه ابو جالب بیاد در میدان بدر اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت چیکار بکنیم بعضی از صحابه میترسیدن چون نه گروهی داشتن نه جمیتی داشتن نه اسلحه ای گفتند یا رسول الله ما آمادگی نداریم ما میخواستیم این قافله را بزنیم اما بعضی از بزرگ مردان که به این وعده های الهی اذعان و باور داشتند مثل ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت سعد سعد ابن عبادر رئیس انصار ایشون یک سخنرانی اونجا کرد برای قومش و تشجیه کرد که امروز ما میخواییم در رای خدا جنگیم و خطاب کرد رسول الله را گفت یا رسول الله ما اصحاب موسی نیستیم ما یاران موسا نیستیم که ما بگیم برو با خدایت شما دوتایی بجنگید ما اینجا نشستیم نه ما تا آخرین قطری خونی که داریم ما در کنار شما هستیم شما هر جا میرید ما شما را را نمی کنیم ما با شما هستیم لذا این این سرداران بودم واقعا سردارانش ایمان و شهامت سرداران اخلاص و شجاعت خداوند سرداران ما را اینچنی سرداران بگرداند که برای ایمان برای قرآن برای اسلام جان بدن و غیرت داشته باشند نه نه اینکه غیرتشون به خاطر تعصبات قومی باشد بعضی غیرت ها خوب است اما مسیر غیرت غیرت ها درست باشد مسیر غیرت ها غیرت های جاهلیت نباشد لذا اینها گفتن که ما در کنار تو هستیم یا رسول الله بالاخره ان حضرت رفتند الله می فرماید آنها اون کنار بودن شما اینجا ولیکن لیقضی الله امرا كان مفعولا خدا این زمینه را چرا فراهم آورد این شرایط را چرا فراهم آورد این دلشکر را چرا روبروی هم قرار داد تاکی می خاص فیصلے بکند که شدنی بود در علم الله اون باید می شود ولکن الله امرا تا اینکه خداوند فیصلے کند امری را که کان مفعولا ان در علم خدا شدنی بود اون چیه لاهلک من هلک عن بینا ویحیا من حی عن بینا تا اینکه حلاک بشه اینجا هر کسی که بناس حلاک بشه با بینه عن بینه یعنی بعد بینا بعد از دلیل باید هلاک بشه و زنده بماند هر کسی که زنده میماند بعد از دلیل یعنی خدای تعالی از روی بیانه میخواد ثابت کنه که اونا باطلند و اینها حق هستند و ایناللہ لسمیع علیم بدون شک خداوند عزوجل هر سخن را شنواز از هر حال آگاست با خبره خداوند تعالی چندین شرایط فراهم کرد تا اینکه این دلشکر لشکر روبروی هم قرار بگیرن و الله از نظر امکانات اصلاً با هم قابل مقایسه مغا نبودن هیچ وقت صحابه برای آمدن مشوره نمی‌دادن به همین خاطر الله میفرما اگر قبلا وعده کردید شما نمی آمدید خدا رخ شما رو به سمتی دیگه برد و آخر اینجا آورد انسان نمیدونه انسان فکر میکنه عینن مثل همون جریان موسی علیه صلات و والسلام انسان موسی و پیروان موسی فکر کردن را, را اشتباه بودن خداوند عزوجل آمدن به اون سمت بردن که به دریا گیر کنند چون خداوند مقدر کرده بود که این دریا باید برای موسی باز بشه این دریا وسیله نجات موسی بشه و همین دریا وسیله حلاک فرعون و فرعونیان بشه لذا خداوند عزوجل رخ اونها را ناخداگا به اون سمت برد اینجا هم رخ صحابه را الله تعالی ناخداگا نیتی نذاشتن به این سمت و دیگه زمینهای هم خداوند فراهم کرد یکی از اون زمینها چی بود رسول الله در خواب دید همین سپاه جهل را در خواب دید خداوند در خواب به پیغمبر اونا را اندک نشان داد تا برای صحابه بایدن تعریف بکنه و وقتی که رسول الله برای صحابه تعریف بکنه این صحابه تغوییت بشن فس اونا چیزی نیستند رسول الله همین طور برای اونها تعریف هم کرد الله می فرماید اذی یوریکهم الله فی منامک قلیلا زمانی که به شما خدا نشان داد آنان را در خواب شما اندک اندک نشان داد تو خواب می دید رسولی ایک جماعت اندکی هستن یه مشت هستند و لو اراکم کثیرا لفشلتم اللہ می فرمای اگر انها را زیاد نشان می شما فشل می شدید سست می شدید و تنازعتم فی الامر اون وقبا هم دیگه درباره جنگ کردن چی می شدید با هم دیگه اختلاف می کردید تنازع می کردید درگیر می شدید ولیکن الله سلم اما خداون شما را سالم نگاه داشت از چی؟ از فشل و از تنازع من الفشل و التنازع خدا نخواست که شما با هم درگیر بشید خدا نخواست که در شما فشل و سستی بیاد لذا در خواب کم نشان داد اللہ خوب میدانه انسان باید به این رب علیم و حکیم کاملا در بست اعتماد بکنه ان الله علیم بذات الصدور خداوند خوب میداند به راز سینه‌ها اسرار قلبها، اسرار درون و بعد اینجا وقتی که آمدند هم به خاطر اینکه هیچ گروهی فرار نکند سبحان الله خداوند چقدر تدبیر کرد تا همین جنگ یک بار شروع بشه اینجا وقتی که سفارائی کردند مسلمانان از اول کم بودند ولی همین کم را خداوند کمتر نشان داد در چشمان ابو جل خیلی کم بودند ابو جل روی اسبش سوار شد یک دو ریزت گفت با اینها بجنگیم اینا که چیزی نیسته اینا عددی نیستند خدا خواسته فرار نکنم بجنگند مرگش بیاد و بعض سپاہ هزار نفری مشرکین را در چشم صحابه هم بسیار اندک نشون داد تا این هم سس نشن این به جنگت. الله می فرماید و ادیوری کموهم زمانی که بشما نشان داد آن مشرکین را ازل تقیتم وقتی که با هم دیگه ملاقات کردید روبروی هم سفارائی کردید في اعيونكم در چشمان شما در چشمان شما آنها را داد به شما قليلا نشان داد و شما را هم به آنها اندك نشاندت و يقللكم في اعينهم و شما را هم اندك قرار داد شما را کم کرد در چشمان آنها هم که شما را دیدن گفتن اینا چقدر کم اند چرا الله تعالی همه این تدابیر را فرمود همه این برنامه‌ریزی را اینکه خدا میفرماید و مکر و مکر الله مکر خدا اینه همه این حرکت لیقضی الله امران كان مفعولا برای بار دوم الله میفرماید تا الله فیصله بکند امری دا که اون امر شدنی بود در علم الله الله میخواست اینجا کمر کفر را بشکند اون وعده که خدا داده بود که اون وعده عذاب می در همین دنیا میآید اون وعده خدا می خواست اینجا عملی بشه اینجا محقق بشه به دست یک مشت یک جماعت آدم های ضعیف نحیف بدون امکانات اما در این حال قوی از نظر ایمان با روحیه بالا در کنار رسول الله به دست اینها الله عزیز و جل میخواست که اون بهترین های کفار و مشرکین را یکی یکی اینجا بکشد یکی یکی اینجا پوزیشن را به خاک بمالد چنانچه همین کار را خدا کرد هفتاد نفر هفتاد نفر در اون زمان جمعیت الان اگر هفت نفر یه جای میمیرد دنیا خبرگزاریات تمام تکان میخورد هفتاد نفر در اون جمعیت اندک کشته شدن هفتاد نفری دیگه اسیر شدند، بقیه هرچی ماندن مثل موش فرار کردن هرچی داشتن شطورهای خودشون را اسباب خودشون را آلات جنگی خودشون را آزوغه های خودشون را همه را گذاشتن پا به فرار گذاشتن اینجا خدا نشان داد که این ریوم الفرقان هست یوم فیصله هست پس عزیزان وقتی که مسلمانان واقعا با خدا باشند واقعا طابع دستور باشند خداوند شگفتی میآفریند معجزه میاره خدا تعالی نشون میده آیات خودش را و این فتح و ظفر و نصرت مخصوص صحابه نیست مخصوص هر اهل ایمانی که بر مسیر ایمان باشند و الى الله ترجع الامور فقط و فقط بسوی الله برگردانده میشه بازگشت همه امور هست بعد از این الله تعالی قانون جهاد را هنوز این موضوع ادامه دارد اما مجاهد چند چیز لازم هست الله تعالی میفرماید اولین چیزی که شما با مواجهه دشمن لازم هست اینه که شما ثابت قدم باشید صبات قدمی داشته باشید یا ایها الذين آمنو اذا لقيتم فئا فثبتوا ای مؤمنان هرگاه شما ملاقات کردی با گروهی از کفار فثبتوا صبات قدمی داشته باشید دیروز من بنده کردم نه تنها در میادین جنگ فیزیکی در همه میادین جنگ و جهاد و مبارزه مسلمانان مجاهدان مسلمان و رهبران مسلمان رهبران مذهبی رهبران فرهنگی رهبران علمی در هر جا رهبران از کُنم سیاسی اجتماعی باید ثبات داشته باشند از دشمن نترسند ترسور خدا دوست ندارد باید برای احقاق حقوق مسلمانان خوب دفاع کنند لذا الله می فرن اما راکار صبت قدمی را خدا ذکر کرد اینجا میخواد که ثابت قدم باشید چکار کنید واز ک الله ثران خدا را به کسرت یاد کنید خدا را به کسرت ذکر کنید ذکر صبت قلبی میاره؟ وقتی که قلبتون ثابت قدم شد قلبش شو مطمئن شد الا بذکر الله تطمئن القلوب قلب آرامش میگیرد قلب که آرامش میگیرد ثابت قدم می شه اون وقت پاها نمیلرزه پاها هم نمی ترسه ترس قلب وقتی که وقتی که قلب می لرزه و می ترسه دست و پا هم متاثر از قلبه وقتی که قلب قرص باشه و چیم قرص میشه با مطمئن میشه با ذکر خدا به همین خاطر شما در همه مشکلات خدا را به کس را ذکر کنید بدون مشکلات هم به کس را ذکر کنید و یک نکته چند بار یادآوری کردم اینجا هم که ذکر دیگه شرایطی ندارد شرایط وزو، شرایط استقبال قبله، شرایط وقت، فلان وقت یا شرایط ایستادن نشستن، خابیدن، را رفتن هیچیک از این شرایط مطرح نیست شرایط زمان، شرایط مکان، هیچ شرطی فقط یک شرطی خدا ذکر کرده اون اینه که اذکر الله کثیرن زیاد ذکر کنید زیاد ذکر کنید کم ذکر نکنید اللہ تعالی از من و شما این انتظار را ذکر زیاد کنید و این را هم بدونید که در هر عملی که هستید هر کاری داری می هر مشغولیتی دارید خودش بسیاری از اعمال و طاعت ما همرا با ذکر استند مثلا نماز بدون ذکر از اول الله اکبر هست تسبیح هست تحلیل هست تکبیر هست سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا سبحان قرآن خوندن خودش یک ذکری هست قرآن یک ذکری حج که میرید همش ذکره روزه هم وقتی که میخواد روزه تون روزه با حالی باشه در اون روزه شما روزه شما مقبول بشه از نظر کیفیت بالا بشه همرا با روزه ذکر کنید الله را به کثرت یاد کنید مجاهد در سنگر به کثرت ذکر کند هر کسی وظیفه انجام میده کارمند در اداره کار میکنه ذکر کنه خدا را یاد کند و ذکر کثیر حدی خدا بیان نکرده نه در قرآن نه در سنت میگوین بعضیها که بلاخره بعضیها برای یک سری فرمولهای دارن اینا برنامه تربیتی هستند ذکر زیاد لازم هست بالاخره، بعضی تعریف کردن الله کسیرن رد. چه تعریفی؟ یکی از صحابه هست. غالبا امن مسعود یا کسی دیگه است میگه ذکر کسیر اینه که انسان در هیچ لحظه از خداوند غافل نشه. یعنی مشغول ذکر هستی. بعدن کاری پیش میاد. کارت را انجام بده. فکریت ذکرت با اون کارت باشه. کار را که تمام کرده دوباره بیاد خدا باش، دوباره شروع کن. یعنی هر لحظه که بیکاری خدا را یاد کن این ذکر کسی است. این که فقط مثلا بگم صبح سی بار شب سی بار صبح دویس بار شب دو بار نا همیشه لذا اللہ می فرماید وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تا اینکه شما رستگار بشه، ذکر شما رستگار می کنه الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و اینجا خدای عز و جل بسیار فرمول زیبایی و جالبی برای اینکه بین شما اختلاف نیاد بیان کرده اگر این را ما بهش عمل بکنیم هیچ وقت اختلاف نمیاد. شما می دونید که امروز مسلمانان در همه دنیا از هیچ نظری کمبود ندارند نه, ما، نه, ما، نه از نظر مالی، نه از نظر اسلحه، نه از نظر علم و پیشرفت تکنولوژی بلاخره نسبت به کفار عقب هستند ولی مسلمانان کم ندارند ولی هر جا مسلمان مشکل داره علت اصلی مشکلش اختلاف است در هر میدانی که شکست میخوره هم به دلیل اختلاف است. و کفار هم این قدر برنامه ریزی کردن مسلمانان برای مسلمانان عنوان و الغاب درست کردن هر یکی با دیگری درگیر هست شما ببینید چه اختلافات در میان مسلمانان هست اختلافات منطقی اختلافات ارزی زمینی اختلافات عرض کنن زبانی اختلافات مذهبی اختلافات فرهنگی، انواع اختلافات است. خب خداوند از و بندگان خودش را با سلایق مختلفی آفریده شما جوری دیگه فکر میکنیم من طوری دیگه فکر میکنم ولی خدا اینجا فرمولش را بیان کرده که اگر میخواهیم من و شما هم باشیم هم دیگر را تحمل کنیم لازم نیسته که حتما شما نظر من را قبول کنید یا من نظر شما را قبول کنم البته نه در مسائل منسوس در مسائل غیر منسوس مراد هست الله میفرماید وَلَا تَنَازَعُو با هم دیگه نزا نکنید با هم دیگه درگیر نشید فتفشلو فشل میشید سست و ضعیف میشید و تذبری حکم اون وقت حیبت شما میره، شکوه شما از بین میره، اون عظمتی که شما دارید اون جلالی که دارید تا روزی که متحد هستید منسجم هستید تمام دنیا شما حساب میبره ولی اینکه شما کم باشید اما وقتی که متلاشی شدید الان ببینید من زیاد نمیخوام سر درس قرآن به بعضی مسائل سیاسی اشاره بکنم ولی گاهی بالاخره مثالی مردم ما الحمدلله در مسائل سیاسی اجتماعی یک وحدتی با هم دیگه دارند علماء ریش سفیدان تحصیل کردگان همیشه با هم همدلن مشوره می کنند و مسیری میگیرن گاهی مسیرشون درست گاهی از نظر سیاست شاید مسیر غلط هم باشه کار نداریم ولی باہماند این بزرگ ترین برگ برنده هست چون باہماند هم همیشه الحمدلللہ موفقا و جمعیتی ما نداریم نسبت به جمعیت های بالای کشور و اون استانهای بزرگ و استانهای غول اما هر جریانی میشه هر انتخاباتی چشمها به طرف این استان دوخته چرا شما میدونن اینا تاثیرگذارند دلیلش هم تنها و تنها وحدت است این نصرت پروردگاره الله تعالی این هم وحدت را بیشتر بکند لذا این شکوه این عظمت این هیبت این وقار و عزت که شما پیش همه مردم عزیز هستید به خاطر وحدت شما است هر وقت موفق شد شدند شما را تک تک بکنند اون وقت شما این شکوه خودتون را این عزت خودتون را از دست میدید خدا نیاری اون روز پس الله عزوجل میفرماید اگر نزاع کردید با هم دیگه اختلاف کردید فشل میشید سست میشید و تذهب ریحکم و اون حیبت شما اون عظمت شما از بین میره اون وقت بالاخره به جای حساب نمی شه مگر کشورهای اسلامی کم هستند خدا تعالی هم کاری کرده که تمام زخائر بهترین زخائر نفت و گاز که تمام دنیا بهش احتیاج داره به دست همین کشورا مسلمانه ولی چنان اینها را متفرق کردن از یک طرف می خواند را بفروشند از یک طرف می که اقتصاد خودشون را درست کنند و از یک طرف صحات تصمیم نادرست و نروای دیگه دارند و بزرگترین اینه که اگر مسلمانان در کنار هم قرار بگیرند خطر برای اونا. هر نوع خطر است. لذا ببین که چطور مسلمانان را؟ یک گروه را به نام عرب و غیر عرب، یک گروه را به نام این مذهب و اون مذهب، یک گروهی دیگر را به نام اختلافات ارزی و اختلافات منطقی و چه تعصبات ایجاد کردند؟ که مسلمان گاهی انسان میبینه مسلمان اونقدر که از مسلمان تنفر داره حتی این تنفر از امریکایی و از انگلیسی هم نداره چرا گاهی درگیری های بین خود مسلمانان است با چه بیرحمی مسلمان مسلمان را میکشد بعضی وقتا خودش را منفجر میکنه هر چی باشه باشه بالاخره عزیزان این بخاطر چی هست؟ خاطر اینه که مسلمانان و قدرت را اون عظمت را اون شکور از دست بدند قرآن همین را گفته لذا راهکار چیه الله می فرمایی واسبرو صبر کنید واسبرو صبر کنید این کدوم صبره؟ این صبر اندل مصیبه نیست شما را شما مصیبتی که نیامده که صبر کنید این صبر به معنای تحمل سلام همدیگه هست همیشه وقتی که بین دو گروه اختلاف ایجاد میشه چون من سلیقه اون راقبون نمیکن و سلیقه من دار. نه صبر کنید. سلیقه های همدیگر را تحمل کنید. شما بر سلیقه خودت باش بر سلیقه خودش باشه. شما بر اون مسیر که خودت میپسندی اون بر مسیر که خوده. پس این صبر اندل مصیبه نیست. این صبر بر طاعت و بندگی نیست این صبر برتر که گناه و معصیت نیست اون سینه صبر میاد ولی این صبر به معنی چی هست صبر به معنی تحمل کردن هم دیگر اخلاق هم دیگر سلیقه هم دیگر اگر یکی کج میره صبرش کن تحملش کن سینه‌ت را بالا بگیر را از کن نشون بده و همین صبر را گاهی در خانواده وقتی که ندارم پدر و فرزند با هم درگیر میشن قهر میشن خانواده متلاشی میشه گاهی زن و مرد این صبر را وقتی که ندارند هم دیگر را تحمل نمی کنند پرخاشگری می کنند درگیر میشوند خب خدای تعالی زن را در محیط دیگه پیدا کرده مرد را در محیط دیگه اون یک سری خصوصیات خاص اخلاقی خودش را داره مرد خاص خودش را داره بلهذا با هم دیگر را اخلاق هم دیگر را تحمل کنند هر کدوم که راهش است در اون قسمت خودش را اصلاح بکنه با دیگری تطبیق بده لذا اگر هم دیگر را تحمل کنند موفق میشوند یه زندگی محبت آمیزی زندگی مسالمت آمیزی زندگی پر از سکون و آرامش میتونن چیکار کنند تشکیل بدن لذا این رو هر جاهایی که احتمال اختلاف است بین شاگردان یک دانشگاه، شاگردان یک حوزه، بین افراد یک شهر، بین افراد یک خانواده، بین بالاخره همه مسلمانان تنها راهش اینه و خداوند برای صبر چه فضیلتی بیان کرده؟ ان الله مع الصابرین. خداوند همراه با صابران هست و در ادامه الله تعالی می فرماید که علاوه اثر غرور و تکبر داشته نباش متوازه باشه ببین یک چیزی که مسلمانان را با هم دیگه همدل میکنه توازو در هم مقابل هم دیگه هست یکی خودش را تیسمارخانی بدونه فلانخانی بدونه و یکی دیگر را بالاخره از یک انسان هم پستر بدونه دیگه هیچ وقت بین اینها توافقی بین اینها تفاهمی ایجاد نمیشه الله میفرماید ولا تَكُونُوُ کل لذین خارج اومند دیاری هم نباشید مثل آنانی که خارج شده از دیارشان بثران با خرور با تکبر ور آن و نشان دادن مردم همیشه وقتی که هدف نشان دادن ریا باشن هم اختلاف درست میشه وی صد عن سبيل الله و باز میدارن از راه خدا والله الله بما يعملون محيط و خداوند به اون که اونها عمل میکنند احاطه کرده اعمال و متکبران را جزایشون میده ده چنانچه در بعد جزایشون داد و اید زیان لهم و شیطان و اعمالهم اینجا یک چیزی دیگر را خدای تعالی یادآوری میکند می کند که بنده در ابتدای داستان از کردم شیطان بد جوری گول داد چون شیطان گرچی خیلی زرنگ و زیرک هست ولی خدای تعالی به شیطان علم غیب نداده شیاطین علم غیب ندارند جنات ندارند ادیامی کنن جنات که ما داریم ولی ندارند لذا شیطان نمی اینجا چه خبره شیطان فکر می کرد که خوب این اینا هزار نفر هستند اونها سی نفر هستند اینها وقتی که خوب به جنگن اونها از بین می برند اما از عاقبت از اینکه خدا چه فیصله کرده شیطان یک درصد اما خبر نداشت لذا یک ای که از او قریشی ها بیم داشتند از یک قبیله به نام قبیله بنو کنانا اون بنو کنانه در همین حواشی بودند در همین مناطق بودند و ابو جهل وقتی که آمد دغدغه داشت که وقتی بنو کنانا با ما تصفیه حساب نکنند از قبل با هم مشکل داشتند شیطان که اونجا به شکل پیرمرد نجدی آمد، اینجا به شکل رئیس قبیله کنانا بنو کنانا به شکل سراقه ابن مالک. سراقه ابن مالک رئیس این گروه بود، این قبیله بود. آمد به شکل او خودش را ظاهر کرد. و رئیشی ها را گفت شما نگران نباشید. ما با هم اختلاف داریم و اختلاف بجای خود اینجا دشمن مشترکی داریم. اینها را فریب داد و گفت که من با 2000 نفر به شما می پیوندم قبیله ام خواهد آمد لذا تا اینجا تا آخرین لحظات همراه بود اینجا وقتی که صف بستند و آماده معرکه شدند آماده رویارویی شدند اون طرف صف بود ناگهان چشم شیطان افتاد به چی افتاد؟ به ملائکه افتاد ملائکه و جنات هر دو قبل من این بحث را کردم که موجودات لطیفی هستن لطافت دارن ما انسان ها نمیتونیم اونها را ببینیم ولی انها میبینند هم دیگر وقتی که دید که سبحان الله جبرئیل امین را ببین همه ملائکه اینجا سخت بسته آماده باش دستش تو دست ابو جهل بود کم کم دستش را کشید و فرار کرد کجا؟ گفت من چیزی میبینم که شما نمیبینید لذا این اولین فرار باعث شد الان دیگه دیر شده بود روبرو شده بود این باعث تضعیف روحیه شد آمده بود که تقویت روحیه بکنه تضعیف روحیه شد اینا خودشون رباختند اینا نمیدونستن جریان چیه و حتی میگم بعد اینجا که ابو کشته شد و بزرگانشون کشته شدند اما بعدا کسی سراقه ابن مالک ردی گفت اون روز نامردی کردی گفت کدم روز کجا جریان چیه هرچی بهش گفتن سوگند دیاد که من اصلا رو هم خبر نداره لذا ان جا الله تعالی این اشاره فرموده الله می فرماید و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم زمانی که شیطان آراست کرد برای آنها اعمالشان را اینجا قبل از اینکه من آئی ترجمه بکنم یک برانتزی دیگه باز میکنم شیطان خیلی از اعمال بد را جلوی چشمان ما آراسته می کند اعمال شرکی را اعمال کفری را اعمال خرافاتی را اعمالی که زلم هستند گاهی افرادی هستند که در بیداری و گاهی در خواب کسی پیششون میاد. و تشویقش میکنه میگه خیلی کار خوبه نمیدونه کیه تشویقش میکنه به یک کار نامشروع کار نادرست بعضی مشرکان خصوص اهل شرک که شرک میکنند بعضی وقتا تو خوابهای خودشون میبینند خوابی میبینند که از اون خواب تحیید همین شرکش میشه خداوند هم به شیطان بخاطر امتحان ما اینقدر تسلط داده که رسول الله فرمود ان شیطان یجری من الانسان مجرى دم شیطان اینقدر میتونه که از طریق خون داخل رگ و ریشه انسان بیاد وسوسه کنه لذا گاهی به انسان وسوسه می کنه خوبه خوبه کار خوبه کار چیه کار فساده کار کشتن انسانی هست کار شرک کردن هست لذا گاهی به شکل یک مشاور میاد گاهی در خواب میاد بالخصوص در خواب که میاد اون فکر میکنه که بالاخره معجزه ای من است. در حالی که غافل از این که این شیطان هست لذا هر کاری که میکنیم فکر نکنیم من خواب هم دیدم من که خواب دیدم حتما خیر تو این فلان فرد را کسی لباس سفیدی آمد تو خواب به من گفت برو بکشش چی میدونی بوده؟ انسان هیچ وقت به خوابش تکیه نده بگه من چون تو خواب دیدم باید این کار بشه خواب شما که موجزه نیست خواب شما که وحی خدا نیست خیلی از خوابها خوابهای شیطانی هستند به همین دلیل انسان اون کاری که میخواد بکنه با دستور خدا با قرآن تطبیق بده از نظر قرآن اون کار کار درستی داره میکنه اگر درسته خوب اشکال نداره اگر نادرست بخاب یا به اون لباس سفید یا به اون مشاور خوب که با دلیل مشمشواره داده هیچ وقت به اون اتکا نکند لذا الله فرماید و اذ زیین لهم الشیطان و اعمال زمانی که شیطان آرست کرد اعمالشان را در دلشان وسوسه کرد که حتما این کار را بکنید و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و به اونها گفت چه بی صورت وصف چه بی صورت حضوری و مشافحه مشافحه تن گفت گفت لا غالب لکم اليوم من الناس نیس غالبی برای شما امروز از مردم هیچ کبر شما غالب نمیشه شما ما را دارید در کنار خودتون این گروه این تجهیزات اون جمعیت را ببینید شما غالب میشید و همچنین این وعدر داد و این نیجار لکم من حامی شما هستم جاری جبی من معین کمک کننده من حامی شما هستم شما را کمک می کنم شما نگران نباشید شما پرواز داشته نباشید الله می فرمای فلم ما تراعت الفیعتان وقتی که هر دو گروه هم دیگر را دیدند صف بسته بودم برای درگیری هم دیگر را دیدند نکسا علا عقبه پشت سر عقب کشید نکسه برگشت پشت سرش وقتی گفتن کجا چرا وقال انی بریئ منکم من از همکاری با شما بیزارم بری هستم از شما یعنی من جوارکم از حمایت شما از همکاری با شما هم دستی با شما انی ارى ترون من میبینم چیزی که شما نمیبینید اون چی که شیطان میدید چی بود ملائکه بودن من می بینم چیزی که شما نمی بینید اینی خاف الله من از خدا می ترسم الله تعالی می فرماید والله شدید العقاب خدا من اینگونه سخت عذاب میده هر کسی که با دشمنان خدا دوست بشه یعنی با شیطان دوست بشه خدا سخت عذاب میده لذا تنها شد ابو جل بیار و مددگار شد و روحیش تضعیف شد صحابه هم مردانه حمله کردند با شهامت ایمانی حمله کردند و قریشی ها را اونجا تو اون میدان شکست دادند خارشون کردند الله عز و جل موفقیت را پیروزی را و ظفر را برای مسلمانان به ارمغان آورد الله تعالی همیشه مسلمانان را عزت و آیت عنایت بفرم بفرماید اذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غره اولائ دینهم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 ذلک بما قدمت ايديكم وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيد در آیات گذشته در رابطه با غزوه بدر و پیامدهای این غزوه و نتایج این غزوه و انکی خدای عزوجل چگونه سپاه اسلام را که از نظر ظاهر ضعیف بود موفق فرمود پیروز فرمود و سپاه کفر را که از نظر ظاهر خیلی قوی و تنومند بود شکست داد این مطالب خوانده شد که الله تعالی اون روز رحم یوم الفرقان فرمود روز فیصله فیصله شد حق از باطل جدا شد حق از باطل تشخیص داده شد که کدوم حق کدوم باطل هست حال در ادامه الله عزوجل یا وگویها و بعضی از اعتراضات پوچ و بی جای منافقین را بیان می فرماید منافقین که انها می گفتن این مسلمانان را چی چیزی فریب داده چی چیزی باعث فریب انها شده دینشون فریبشون داده من یک نکتی را همیشه یاد آوری می کنم اینجا هم ارز بکنم ما هر وقتی می منافق و منافقین ذهن یک مقداری ذهن ماها مقداری بند هست در همون منافقینی که در زمان رسول الله بودند ذهن به طرف عبدالله ابن ابی میره به طرف منافقین صدر میره در حالی که این صفاتی که خدای تعالی اینجا بیان می فرماید در این زمان هم هستند کسانی که همین عقیده را دارند، همین دیدگاه را دارند خدا تعالی وقتی میگه المنافقون شامل حال اونها هم میشه شامل حال اینها هم میشه اینهایی ای که امروز هم میگن خیلی از افرادی که اعتقاد به دین ندارند باور ندارند به نصرت خدا فقط به اسباب نگاه میکنند و که مسلمانی همت میکنه مسلمانی غیرت میکنه مسلمانی اقدام میکنه و حرکتی برای خدا انجام میده، حرکتی انجام میده که اسباب ظاهریش فراهم نیست خب میگه اینا،, اینا چرا اینطور فریب میخورن؟ چه چی چیز اینا رو فریب داده؟ میگم باورهای اینها، باورها همون اعتقاد است، باور همون ایمان هست مثل همون منافقین، منافقین زمان ما هم نسبت به مسلمانان، احیانا تمسخر میکنن شنیده میشه گاهی میکنن میکنند و میگویند اینها را فریب دادند اینها گول خوردند اینها که بدون هیچی حرکت میکنند در واقع گاهی ایمان باعث میشه که انسان حرکتی بکند گرچه حرکت نباید حرکت بدون تدبیر باشد امرا با تعقل باشد اینجا خداوند میفرماید اذ یقول المنافقون زمانی که میگویند منافقان والذین فی قلوبهم مرض کسانی که در دلهای آنها مرض هست مرض کفر و شرک و نفاق هست آنها میگویند گویند غر ها اولائی دینهم انها را فریب داد دینشان دینشان اینها را فریب داد چون اینها نگاه کردن گفتن که سی, سی نفر در مقابل ہزار نفر ان دیوانگی هست این خودکشی هست. چی چیزی باعث شده که فریب بخوری دین میگه وینهاره فریب داده. در حالی که غافل هستند از اینکه انسان مومن وقتی که در مسیر الله باشه و توکلش بر الله باشه الله اورا کفایت میکنه. الله به همین اشاره میفرماید جواب الهی برای اینو منافقان این که ومن یتوکل على الله فإن الله عزيز حکیم هر کسی بر خدا توکل بکند اما دیروز مفهوم توکل را عرض کردم همه اسباب را همه امکاناتی که خدا برای دفاع آفریده همه امکانات را انسان استفاده بکند اما اعتمادش به امکانات نباشد اعتمادش رب باشد هر کسی که توکل کند بر الله فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِيمٌ بدون شک خداوند عز و جل هم غالب هست و هم کارهای خدا با حکمت است. الله تعالی بندگان خوب خودش را بندگان مؤمن خودش را بندگان صادق خودش را انهایی که با خدا صداقت دارند خدا نصرت میکنه و هم حکیم از چنان از راه حکمت نصرتشون میکنه که انسان تعجب میکنه و بعد برای این منافقان خدای تعالی ذکر میکند عذاب را، تخویف را، تهدید را. ولو ترا اذی توفل لذین کفره الملاکه تو زمانی کشومابی بینی که جانشان را میگیرند، جان کفار را کی میگیرد می گیرند قبلا این مطلب را هم یادآوری کردم که اون ملائکه که جان را می گیرند یک ملک نیست تنها ازرائیل نیست تنها ملک الموت نیست ازرائیل فرمانده هست اسرائیل مدیریت مال اسرائیل هست مدیریت مال ملک الموت است. اما ملائکه که برای قبض ارواح بندگان خدا هستند خیلی زیاد هستند دستورات و فرامین از اسرائیل صادر میشه بعضی وقتا چون مردم تعجب میکنن سوال هم میکنن که خب وقتی که ملک الموت فرشته مرگ اسرائیل است چطور در یک لحظه روح بعضی را اینجا در زاهدان قبض میکنه روح بعضی را در تهران در امریکا در اون گوشه دنیا اون گوشه دنیا همه این ارواح چطور دفعتن قبض میکنه یک فرشته از اینجا معلوم میشه که فرشته مرگ و فرشته که بر فرشته هایی که برای قبض ارواح تعیین شده این فرشته ها خیلی زیاد است یکی نیست لذا الله میفرماید ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا اگر ببینی زمانی که جان کسانی را که کف کردم می گیرند جانشون را کی می گیرند؟ ملائکه می گیرند و جانشون را می گیرند با چه توپ و شتری با چه خشونتی یدربون وجوه هم و ادبار هم می چهرهشون را و پشتشون را در آیه دیگه ما خاندیم که وقتی که جان کفار را میگیرند میزنه اونها را و میگه اخرجو انفسکم جانتون را بید بیرون کافر هی مبارزه میکنه جانش را نمیده گناهکار عاصی فاسق و ذوق و عذابر حریق عذاب سوزان را عذاب آتش را بچشید من یک نکته دیگری میخوام خدمت شما ارز کنم خیلی از افراد هستن که مقداری از قرآن دور هستن گرچه خودشون را اهل قرآن می گویند و البته احادیث را قبول ندارند این گروه هستند الان متاسفانه در دانشگاه ها هم دانشگاه های کشور ما در دانشگاه های دیگه این افراد زیاد هستند که میگویند گویند حسبونا کتاب الله کتاب خدا برای ما کافیه و احادیث را قبول ندارند بنده قبلا تعریف کردم شاید یک بار پیش دکتری رفتم دکتر سنش هفت سال بود تقریبا تهران رفتم مریض بودم. این دکتر گفت که من حافظ قرآن هستم. من تعجب کردم تو تهران هفتاد سال گفت تمام قرآن حفظ کردم ولی بغیر قبول ندارم نه بخاری نه مسلم نه نهج البلاغه نه چیزی دیگه هیچی قبول ندارم. متوجه شدم این اهل قرآن است. اینها خودشون را اهل قرآن میدونند. اینها هرچی که تو قرآن آمده فقط قبول دارند. و چی که در احادیث هست قبول ندارن مثلا یکی از مواردی که قبول ندارن عذاب قبر است میگن عذاب قبر تو قرآن نیامده خب در احادیث آمده خب حدیث را اونا قبول ندارن در احادیث به صورت متواتر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از عذاب قبر صحبت کردند و فرمودند قبر چطور انسان را فشار میده بالاخره اینها میگن تو قرآن نیست ببینید اینجا در قرآن هست ولی اینها نمی بینند الله تعالی می فرمین روح و جان منافقین را قبض و به می گوین وزوق و عذاب الحریق عذاب سوزان را بچشید خب این عذاب عذاب جهنم نیست عذاب سوزان هنوز و عذاب جهنم جلو هست اون تا این عالم تمام بشه میدان حشر برپا بشه حساب و کتاب شروع بشه بعدن بعضی را به جهنم میبرن بعضی را به بهشت میبرن پس این که خدا میگه بسشید عذاب حریق را عذاب سوزنده را این در قبر هست ما در رابطه با فرانی ها هم خاندیم آل فران خاندیم که فران را وقتی که خدا غرق کرد خداوند میفرماید روح اونها را که من گرفتم بردم به اون دنیا النار یعرضون عليها غدوب و آتش جهنم صبح و شام بر اونها هست آتش برزخ ببخشید برزخ همون قبره و بعد در ادامه می و یوم تقوم ساعت و, و آل فرعون اشد العذاب روز قیامت که برپا میشه اونجا گفته میشه فرعون را و آل فرعون را ببرید به اشد عذاب خب این که آتش صبح و شام یعنی على دوام بر اونها عرضه میشه و روح اونها را کباب میکنه و جسم اونها را هم متاثر میکنه و میسوزاند این کدوم آتش این آتشی که در قبر در عالم برزخ است لذا آیات زیادی هستند که دلالت بر عذاب قبر دارند اینهایی که منکر عذاب قبر هستند به این آیات دقت نمی کنند به این آیات توجه نمی کنند الله می که ملائکه وقتی که جان منافقین را می به اونها می ذوق و عذاب الحریق این عذاب سوزان را بچشید این در کجاست؟ در برزخه در جایی که ارواح کفار اونجا میره قرار می گیره ذلك بما قدمت ايديكم الله می فرماید ان علت عذاب است چرا به سبب عمل کرد خودتون به سبب کفر به سبب نفاق به سبب باور نداشتن وعده های خدا این به سبب اون که دست های شما انجام داد و ان الله ليس بظلام للعبید بدون شک خداوند عزوجل ظلم کننده برای بندگانش نیست خدا ظلم نمیکنه خودتون بر خودتون ستم میکنید ظلم میکنید و خداوند تشبیه میده میگه کداب آل فرعون والذین من قبلهم یعنی احوال این منافقان مثل احوال آل فرعون است و کسانی که قبل از فرعونیها بودند اشکال کاری اونها چی بود ایرادی اونها چی بود کفروا بایات الله فاخذهم الله بذنوبهم اونها نسبت به آیات خدا انکار کردند کفر کردند خدا هم اونها رو به سبب گناهانشون گرفت ان الله قوی شدید العقاب بدون شک خداوند قوی است و سخت عذاب میده و خداوند هم اینجا بیان می‌فرماید که خدا هر نعمتی که به بنده بده اون نعمت را خدا تغییر نمیده تا زمانی که انسان خودش تغییر نده ببین این نعمت چیه که مشرکین تغییر دادند، کفار تغییر دادند. ما در آیات گذشته خواندیم که یهودی‌ها قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله سلام تشریف بیارت، یهودی‌ها در مدینه می‌گفتند اصل یهود مال مدینه نبودند. یهود آبای و اجدادشون مال شام بودند، مال سوریه امروز بودند. از شام آمده بودند. چون که در کتاب‌های آنها نوشته شده بود که آخرین پیغمبر وقتی که مبعوث میشه در شهری به نام یسرب که نام قدیم مدینه هست اینجا هجرت میکنه و کسانی که با اون نصرت کنند کسانی که اون را یاری کنند بهترین انسانهای روی زمین هستند و بهشتی هستند لذا پدران یهودی ها از اونجا هجرت کردند از شام در حالی که شام کجا از نظر زیبایی از نظر آبادی لبنان هم جز شام هست اردن هم جز شام هست فلسطین و سوریه هم جز شام هست به اینها میگه عروس خاورمیانه از بسک زیباست، هست از بسک اونجا همه از کناه انواع درخت ها و باغ ها و میوه ها و سبزی ها هست اما اینها اونجا را ترک کرده آمده مدینه طیبه اینجا آمدن گفتند که پدرانشون قدیمه هایشون گفتن هر وقتی که این نبی خاتم آمد پیامبر آخر الزمان آمد ما میشیم جزء اون انصار اینجا که آمدن مردم مکه مدینه اطراف سرزمین حجاز و عرب اینا که شنیدند اینها هم گفتن ما هم وقتی این پیامبر بیاد تو این شهرهای ما بیاد ما ازش حمایت میکنیم لذا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و به مدینه رفت اولا اهل مدینه که بخششون یهودی بود اینها از قبل میدونستند ایمان هم داشتند ولی فقط و فقط به خاطر تعصب،, تعصب قومی انسان را کر میکنه، کر می چون که از فرزندان اسرائیل نبود بنی اسرائیل نبود از فرزندان اسمایل بود به این خاطر ایمان نیاوردن گفتن نه ما پیغمبری را ایمان میاریم که از خود ما باشد از تایفه خود ما باشد به اصطلاح این تعصب اونها را محروم کرد اهل مکه هم خیلی ها به خاطر تعصب ایمان نیاوردن چون تیره ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوط به اون تیره بود بنو هاشم اینها با بنو امیه در مکه رقابت داشتند رقابت داشتن روی سرداری رقابت داشتن روی مجاورت خانه کعبه روی مسئولیت های دیگه مثل سقایه دادن، خدمت حجیها ها کردن جارو کردن این رو برای خودشون افتخار می دونستن خودشون را دیندار می دونستن این رقابت ها بود چون که رسول الله از بنو حاشم شد بعضی ها از اونها هم ایمان نیاوردند. داستان ابو جل را برای شما تعریف کردم یه روزی کسی پرسید ابو جل را که تو را به خدا سوگند میدم تو واقعا باور نداری که محمد پیانبر خدا گفت که چکار کنم من که همه اعداغا و منصبها را اونا گرفت الان پیامبری هم ماری اونا باشد برای ما بقیه تیره چی میموند اینا همه تعصب بود که ایمان نیاوردند هم خیلی از قریش و هم بسیاری از و همه یهودی ها لذا خداوند میفرما اینها از قبل به نوعی باور داشتن قبول داشتن اما الان به خاطر تعصب و عناد چون که از ایمان و از اون باور برگشتن به کفر پس این حالت خودشون را خودشون تغییر دادن خدا تغییر نداد الله میفرما ذالک بان الله این به سبب این هست که الله عز وجل لم يكن مغيرا نعمه نيستغییر تغير هیچ نعمتي كه انعمها على قوم ان نعمت را انعام فرموده بر قومی حتى يغيروا ما بانفسهم حتی آنان خودشان تغییر بدهند اون احوالي نسبت به وجودشان الله سميع عليم بدرستي که الله هر چیز را شنواس و هر چیز را اینا عیناً مثالشون مثل فرعون هست فرعون مگر نمیدونست که موسی پیامبر به حق خداست میدونست یقین داشت قرآن می نفسن و استقنتها انفسهم قرامگه نفسا و قلبا یقین باور داشتند اما تکبر یکی را تعصب گمراه میکنه یکی را تکبر گمراه میکنه لذا الله میفرما کذا به ال فرعون حال اینها مثل حال آل فرعون بود و من قبلهم کسانی که قبل از فرعونها بودن آد سمود همه اینها فست قرآن میگه تکبر کردن كذبوا بآيات ربهم تكذيب كردند آيات رب شان را قبولنا كردند فأهلكناهم بذنوبهم ما آنا ر بسبب جناهانشان نشان حلاك كرديم وأغرقنا آل فرعون وما غرخ كرديم آل فرعون راهم رابا فرعون وكل كانوا ظالمين همي إنها ظالم بودند ظلم كردند هم ظلم بر مردم هم ظلم بر خودشون بزرگترین ظلم شرک کفره که مرتکب این بودن لذا خداوند عزوجل می فرماید اینها شر و دواب هستند بدترین موجودات زنده هستند خدای عزوجل انسان را افضل آفریده بهترین آفریده حتی انسان اگر بر مسیر درست باشد بر مسیر ایمان باشد از فرشته هم بهتر است چرا خداوند فرشته ها را گفت که شما بیایید آدم را سجده کنید ادای احترام بکنید برای انسان چون که خداوند میخواست نشون بده که این انسان اگر انسان باشد اگر واقعا در مسیر انسانیت در مسیر اطاعت خدا باشد این انسان از فرشته هم برتر است این افضل مخلوقات است اما وقتی که از مسیر منحرف بشه از هر موجود پستی پستره از هر حیوانی حیوان تره ما دیگه خاندیم در قرآن انسان‌های بد را انسانهای متعصب و معاند را کافر را یه جای خدا می که از سگ بدتره یه جای می از علاغ بدتره به سگ اولااق تشبی میده بدترین حیوانات نهن سگ ننجترین هست اولاق احمق ترینش هست. لذا انسان وقتی که مسیر ایمان را و مسیر خدا را ترک بکنه این انسان از اون بالا از اون افزل بودن از اون ااعلا و اولا بودن میفته به اسفل بدتر میشه. الله می فرماد ان الدواب عند الله. بدترین چار پایان بدترین موجودات زنده دابه هر موجود زنده را میگن بدترین موجود موجودات زنده عند الله نزد خدا الذین کفروا انهایی که راه کفر اختیار کردند فهم لا یؤمنون البته همون کفاری که ایمان نمی آورند بعضی کفار هستند بعدا ایمان نصیبشون میشه اونها استثناء هستند و بعد خدای تعالی اشاره میکنه به گروهی دیگر از این بدترین ها اینا کی هستند اینا بنو قریزه هستند بنو قریزه ان ما در سوره احزاب کل جریان را میخونیم اما اینجا همین قدر هست که بنو قریزه عهد را شکستند بنو قریزه گروهی از یهودی ها بودند بهترین یهودی ها هم از نظر سرمایه سرمایه دار بودند از نظر قدرت قدرت من بودند اما اینها با رسول الله عهد کردند پیمان بستند که ما با هم دیگه جنگ نداریم با هم دیگه مشکلی نداریم ما زندگی خودمون را میکنیم شما زندگی خودیمون را بکنید قبلا خدمت شما ارز کردم که اسلام نمیگه شما به زور باید ایمان بیارید فقط میگه که آرام جایتون بشینید. شرارت نکنید فتنه داشته نباشید بنو قرزه رسول الله نگفت که نه باید شما ایمان بیاری گفت باشه. شما وقتی که عهد شکنی نکنید فساد نکنید شما سر جایتون ما اینجا سر جای خودمون هستیم اما بنو قرزه بیچاره گول خورد انسانی که عهد باشد پیمان شکن باشد این انسان دیگه از حیوان هم بدتره خائن دیگه خائن دیگه حیوان هم خیانت نمی کنه سگ وفادار ترین حیوانات است الا ایحال بنو قریزه چیکار که وقتی که تمام احزاب تمام گروها مثل مشرکین مثل یهودی ها مثل منافقین مثل اقوام و قبائل بر عليه رسول الله بسیج شدند خب بنو قریزی از همه سرمایه دارتر بود. همه پیغام فرستادند. شما ما را حمایت نکنی ما پیروز نمیشیم. ما با یک لشکر میام لشکر بین ده هزار تا دوازده هزار نفر بودند آماده مدینه را مهاجرت کردند. تا یک ماه مهاجرت کردند جنگ احزاب یا جنگ خندق معروفه که رسول الله خندق را حفر کردند. خوب اینانی نیاز به غذا داشتند نیاز به خوراک داشتند نیاز به پول و مال داشتند به بنو قریزی گفتند تو ما را حمایت کن. اینها عهد شکستند پیمان را شکستند از این طرف با رسول الله تو خودت را اهل کتاب میدونی تو خودت را پیرو نبی خدا موسی میدونی تو را چی شده که داری خیانت میکنی ولی خنجر زدن از پشت لذا کمک کردند با اونها همراهی کردند تا اینکه خدا اونها را شکست داد خار و زبونشون کرد اون طوفان آمد تا یک ماه اولا اون خندقان را به مدینه حمله کنند بعدا آزوغه تمام شد خوراک تمام شد یک صحابیه یک تاکتیکی یک سیاستی بکار, بکار برد بین بنو قرزه و بین مشرکین درگیری درست کرد این ها را نسبت به هم دیگه بی, بی کرد لذا ابو سفیان گفت من رفتم رفت به مکه بنو قره زر تنها گذاشت همه فرار کردم بعد از یک ماه تا اینکه اینها این رسول الله به حسابشون رسید اما اینجا خداون می فرماید الذین عاهدت منهم کسانی که این بدترین چار پایان و بدترین موجودات کیا هستن کسانی که تو با اونها عهد میکنی ثم ینقضون عهدهم فی کل مره بعدن عهدشون رو هر بار میشکنن و هم لا یتقون ناس خدا نمیترسن از پیامد عهدشکنی هم نمیترسند که چی پیامد سوئی برای اونها دارد لذا خداوند دربار این نو خائنان چه میفرماید فاما تثقفنهم في الحرب اگر یافتی آنها را در جنگ فشرد بهیم من خلفهم پشت سری ها را ابرت بده به وسیله اینها یعنی چنان اینها را بزن چنان بکوب چنان نابودشون کن که بعدیها برای خودشون عبرت بگیرند که هر خائنی اگر خیانت کرد جزایش اینه فشرت بهم من خلفهم یعنی عبرت بده پشت سری ها را لعلهم يتذکرون تا اینها ان تذکر بگیرند دوباره از این غلط ها نکنند خب بعضی از قبائلی که خیانت کردن تکلیفشون اینه اما اگر هر کسی خیانت نکرد چی احساس میکنیم که این فردا خیانت بکنه ما اجازه داریم ما پیش دستی بکنیم ما شب حمله بکنیم نه. قوم مسلمان که خودش را پای بند دستور خدا می دونه نباید خائن باشه هیچ وقت حتی با دشمن هم عهد شکنی نکن فریبکاری نکن رو راست باش این تعلیم اسلامه این تعلیم قرآنه امروز ببینید دنیا چقدر عهد شده. به ظاهر یک کشور میاد میگه من کار ندارم من فقط منور دارم من با اون کشوری ضعیفتر چه, چه کاری دارم من؟ یهو حمله میکنه همین اخیرن هر روز روسیه میگفت ما کار نداریم یهو حمله کرد او قرآن. اما قرآن به ما دستور میده ما اینطور نباشیم ما غدار نباشیم ما خائن نباشیم اگر با کسی پیمان داریم پیمان صلح تا آخر با بر پیمان خودمون باشیم اگر احساس میکنیم اون خیانت میکنه ما خیانت نکنیم ما اول به اونها اعلام بکنیم آقا از این بباد بین ما و شما پیمانی نیست پیمان را اول بشکنیم با چی با اعلام کردن نبا شبی خون زدن نبا شبان حمله کردن این کار کار مردان نیست قرآن داره دستور میده فرمان میده که ما مرد باشیم و ما پیمان شکن نباشیم لذا الله می فرماید و اما تخافن من قوم خیانتا اگر شما می از یک قوم خیانت اونها رو می ترسیدید فانبذ الیهم علا سوا بینداز بسیوی اونها اهد برابر یعنی شما که اعتماد نداریم اونها اعتماد داشته نباشیم بهشون اعلام کن از این بباد ما با هم هیچ سلحی نداریم پیمان ما اهد ما تمامه و شما خیانت نکنید چون که ان الله لا يحب الخائنین خداوند خائنین را دوست ندارد به نقض العهد خائن اون که پیمان را بشکند خائن اون که پیمان را بشکند اینجا یک نکته می عرض بکنم اون نکته اینه که خدا اون خائنی را میگه دوست ندارم که با دشمن خیانت میکند خوب توجه بفرمایید این محل محل تعمق قرآن چطور ما رو تربیت می کند؟ اون طرف اگر دشمن تو هست، یعنی کافره، تو مسلمانی، با او اگر خیانت کردی خدا تو رو دوست ندارد، پس شما فکر بکنی اون خائنی که با برادر مسلمان خیانت می کند، او تکلیفش چیه؟ اونی که با هم دیگه عهد میکنن پیمان می بندند، می شینند، سول می آقا، ما از این به بعد خونی هم دیگه نیستیم برادری هم دیگه هستیم چهار روز بعد میره بالاخره خیانت میکنه. وقتی که تکلیف ما نسبت به کفار اینه که اگر با کفار ما خیانت کردیم خدا ما رو دوست نداره. اگر با هم خیانت کردیم خیلی بدتر از اون. ن ان الله لا يحب الخائنین خداوند خیانت کنندگان را اون خیانت خوندگانی که نقض عهد میکنن پیمان میشکنن اونها را هرگز دوست نداره لذا هر وقتی پیمانی میبندید عهدی میکنید وعده ای میکنید حتی این چکی که شما میدید به کسی این هم یک نوع عهدی هست بعضی ها تو سرشون دارن که این با یک چک فریب میدم بعد میرم که پشت گوشم را هم نبیند لذا ای این خیانت هست الان بعدا کسی نداره میاد عذر میکنه به من مولت بده اون چیزی دیگه اما کسی از هم اول چک میده در واقع این نوع عهد میکنه یک نوع پیمانی میبنده که آقا فلان تاریخ پولت حصول میشه ولی از همین ابتدا نیت دادن ندارد این خیانت است و خداوند خائنین را دوست ندارد کسی که خدا دوستش داشته نباشد او خیر دنیا میگویند خیر آخرت میبیند ولا يحسبن کفر كفروا سبق انهم لا يعجزون خب اصل جریان فراموش نشه جریان بدر بود جریان بدر که بعد از اینکه خداوند عزوجل سردمداران کفر را اینجا کشت و از بین برد هفتاد نفر ازشون بود هفتاد دیگه اسیر شدند بقیه فرار کردند اینا که فرا کردن الان خداوند اونها را تذکر میده تلنگوری برای اونهاست که گمان نکنن کسانی که کفت کردن که سبقو اونا پیشی گرفتن توانستن بگریزند این هم لا یعجزون اینها نمیتونند آجز بکنند ما را اینها هم به دام یعنی این تذکری از اگر ادامه بدن مبارزه را اگر ادامه بدن جنگ کردن را ما را عاجز نمی کنند ما اونها را گرفتار می کنیم و خدای عزوجل ایجاد قانونی که این قانون برای همه مسلمانان هست بیان می فرماید میگه در مقابل دشمن مجهز باشید امروز این دستور خدا متوجه سران مسلمان است که باید برای دفاع از مسلمانان دفاع از کشور اسلامی دفاع از کیان اسلام و مسلمانان باید همیشه آماده باش باشند همیشه پیشرفته ترین تسلیحات را اسلحه مدرن را باید داشته باشند هرچی دنیا دارد نباید از اون کمتر داشته باشند چرا امروز دنیا میگه های ابرقدرت میگویند که ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم اما کشورای اسلامی داشته نباشیم چه دلیل یا اونها از بین ببرند تا همه برابر باشیم یا همه داشته باشند اگر اونها تعهودی را امضا کردند سران حکومت‌های اسلامی هم اون تعهد را امضا کنند که استفاده نکنند ولی برای دفاع همه باید داشته باشند لذا الله همین اینجا می‌فرماید خطاب به حاکمان مسلمان و اعدو لهم مستطعتم آماده کنید برای دشمنانتون هرچی که می من قوة از قدرت قوت و من ربات الخیل و از بستن اسبها اسب اون زمان بهترین ابزار جنگی اسب بود اسبهای عربی اسبهای تندرو تیزرو اما امروز جایگوزین اسب ابزار دیگری هست امروز ما میتونیم از ابزار جدید نام ببریم که مسلمانان برای خودشون آماده کنند برای جنگ برای دفاع برای اینکه لشکر قوی داشته باشند بهترین هواپیماهای جنگی بهترین فانتوم ها بهترین نابهای جنگی بهترین تانک را بهترین موشک را دور برد نزدیک همه تجهیزاتی که امروز هست در دنیا بهترین ها را باید داشته باشند تا به وقت جنگ کمبودی داشته نباشند توکل همینه که ما هر چی که از ابزار و آلات استفاده بکنیم ما مسلمانان داشته باشیم و بعد به خدا توکل بکنیم بگیم این اسلحه ما را پیروز نمی کند رب ما را پیروز می کند این اسلحه را که من خریداری کردم و لشکر اسلام را مجهز کردم چون دستور پروردگاره لذا الله می فرماید چنان آماده کنید ترحیبون بہی عدو واللہ و عدو وکم بیم بدهید بترسانید بوسیلی این اسلحیتون دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را غوب دادن و ترسندن چیئے همین مانورهای نظامی امروز از که کشورها دارن هر کشوری ایک مانوری اجرامی کنے تو دریا تو حفظا تو زمین و اصلح خودش را به معرض نمایش میگذاره این از قرآن ثابته تا دشمن بدون شما خیلی پیش رفته هستید دیگه چشم تمع به شما و به کشور شما داشته نباشه به فرزندان شما داشته نباشه ترهیبو نبیه عدو الله و عدو فکم به وسیله این دشمنان خدا را بترسونید و دشمنان خودتون را بترسونید و آخرین من دونهم. و غیر از این دشمنانی که الان هستی مشرکین مکه اینا فردا از بین میرن اینا فردا نابود میشه مکه فتح میشه دیگه دشمنانی هست غیر از, از اینها دشمنانی دیگه غیر از اینها چی هستن؟ اون زمان اهل کتاب در فلسطین بودن مسیحیان بودند یهودیان بودند روم تمام مسیحی بود ایتالیا ای امروز تمام مسیحی بود ایران تمام مجوسی و آتش برست بودند اینجا قرآن در به سوی اونها اشاره میکنه و آخرون من دونهم دشمنان دیگه شما داره بغیر از این دشمنان فسقی، اینا چیزی نیستند اینا عددی نیستند هنوز دشمنان بزرگتری دارید که لا تعلمونهم شما اونها را نمیدانید الله یعلمهم خدا اونها رو میدوند لذا مال خرج کنید اسلحه بگیرید برای اینکه فردا با اون دشمنان مبارزه بکنید شما آماده باشید سبحان الله یاران رسول الله صلی الله علیه و وسلم بعد از اینکه رسول الله چشم را بستند و از این دنیا رفتند این وظیفه را انجام دادند منتشر شدند در دنیا منتشر شدند اولا به وسیله تبلیغ تمام دنیا به وسیله شمشیر و جنگ فتح نشد به وسیله تبلیغ و معرفی کردن اسلام خیلی از کشورها هست که یک خونی ریخته نشد یک شمشیری زده نشد رفتم برای تبلیغ رفتم تمام دنیا منتشر شدند و هر جایی که اگر یک سرکشی بود یک متمردی بود متکبری بود دیگه با اون می جنگیدند مثل دو ابرقدرت قدرت با ایرانی ها و رومی ها این کشورها تمام کشورها یه عربی امروز مثل یمن عراق، مصر، شام، اینها یا در تسلط ایران بود یا در تسلط روم بود. مثلا شام و سوریه و غیره اینها همه در سیطره روم بود اون زمان و همه اینجا اهل کتاب بودند. یمن و عراق اینها در سیطره ایران بود. لذا صحابه که حرکت کردند از همینجا شروع کردند. یک به یک اینها فتح کرتن جلو رفتن پیش رفتن تا اینکه بزرگترین جنگها در خود قادسیه ایران و در روم اتفاق افتاد در زمان امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نهو چه رشادتی چه ایمانی سی سال بیشتر طول نکشید تمام قدرت ها به زانو افتادن، تمام شکست خوردن، تمام متلاشی شدن، شما ببینید چه قدرتی بود؟ بعضی میگن با زور شمشیر، مگم مسلمان ها چقدر زور داشتن، این ایمان بود، این نصرت الله بود، اونا همه چیز داشتن، اونا تمدن چند هزار ساله داشتند. اینا تازه آمده بودن گویا، وارد دنیا شده بودند لذا الله می فرماید وا من دونهم دشمنان دیگر هستم بغیر از این دشمنان لا تعلمونهم شما آنها را نمیدانید الله یعلمهم الله آنها را میداند و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله آنچه که خرج میکنید از هر چیزی در راه خدا یوفا الیکم بصورت کمال به شما برگرداند میشه خدا به شما پس بر میگرداند و انتم لا تظلمون و شما ظلم نمیشید از سوی خدا هرچی بدید خدا به شما میده بیشترم میده هم در این دنیا میده هم در اون دنیا این نکتره هم که اگر خود ما قدرت نداریم قدرت رفتن نداریم قدرت کار کردن و فعالیت برای دین خدا و پیش برد اداف اسلامی نداریم مال که میتونیم مصرف بکنیم مال را همه جا مصرف کنید به فقیر بدید به مسکین بدید به خیشاوند بدید اما اون مالی که شما مصرف کنید که به وسیله اون مال کار دین به پیش می مثلا فعالیت جهادی هست یا فعالیت های فرهنگی مال را در زمینه فعالیت های فرهنگی دعوت و تبلیغ تعلیم و تعلم مدارس دینی یا در زمینه جهاد و مجاهدین و پیشرفت جهاد هزینه میکنید این مال را الله اینجا اشاره کرده که شما هر خرج میکنید به صورت کمال به شما برمیگردد و انتم لا تظلمون به شما ظلم نمیشه و این جنحوا للسلم فج نحلها این قانون دیگری برای جهاد است ببین ما این آیات را که میخانیم بعضی ها این سوی تفاهم برایشون میشه که اسلام فقط دین جنگ است، دین درگیری است. در حالی که در کل قرآن مزیدی که دو تا سوره درباری موضوعات صحبت کرده. در همین موضوعات فقط صحبت از جنگ نیست. جنگ با خیانت کاران، جنگ با خائنان، جنگ با شکنان اما اگر یک کافری باشد که تمایل به داشته باشد، بگه آقا ما چرا بجنگیم؟ ما با هم دیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. به حقوق هم دیگه احترام داشته باشیم ما با شما کار نداریم تعرض نداریم و شما کار خودتون را بکنید تبلیغ میکنید هر کار میکنید آزادید و ما را هم بذارید که ما از ما نه ما به زور امام بیاریم اگر تمایلی به صلح داشتن الله میفرماید شما بیشتر تمایل نشان بده بس ببین ما خانه جنگ نیستیم قرآن خانه جنگ نیست خانه صلح هستیم حتی در اینجا این, این مسئله هم پیش میاد که خوب شاید اونها دارن با ما خیانت بیکنند ما را فریب میدند به نام جنگ میگه ما صلح بکنیم بعدا یک خیانت نکنه الله میفرمون و توکل الله دیگه اینقدر دغدغه داشتن باش بر خدا توکل کن پس ببینید اسلام دین صلح هست دین محبت هست دین پیام صلح هست و جنگ در صورتی هست که دشمن خائن باشه لذا اللہ می فرماید وَإِن جَنَحُ لِسَّلْمِ اگر تمایل نشان دادن به سل تمایل نشان دادن فَجْنَحْ لها تو هم تمایل برای اون سل نشان بده وَتَوَكَّلْ علی الله اگر می ترسی دی که اونها خیانت می تو بر اللہ توکل کن تو نترس. تو برو با اونها قرارداد امضا کن بشین با هم دیگه صلح کنید لذا صلح هم دلیل زعف نیست دلیل اینه که ما فرمان خدا را چی میکنیم اطاعت میکنیم و توکل على الله توکل بر خدا انه هو السميع العليم این علت اس همانا الله تعالی هر چیز را شناساست هر اراده ای را داناست اگر اونها بخوان خیانت بکنند و از پشت خنجر بزنه هم خدا می شنود می بیند می و این یوریدو ان یخدعوکا اگر انها شما که دنبال خداع و فریب نباشید اما اگر دشمن خواست که شما را فریب بده ف این حسبک خدا شما را کافیه ف این حسبک الله. خدا کفایت میکنه خدا اون وقت شما را نصرت میکنه همیشه هر کسی که خیانت میکنه او شکست میخوره بعضی وقت هاستان طرف میگه که بیا با هم دیگه چی میکنیم سول میکنیم اما نقشه داره که نقشه داره بگمان خودش بالا دسته ولی همین شکست میخوره که خدای عزواجل خائن را هر کسی باشد خائن خائن را فتح و پیروزی نمیده اللہ می فرماید هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ آن ذاتی هست که تُرا تعیید کرد با نصرت خودش ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ترا یاری کرد و بالمؤمنین و بوسیل مؤمنین خدا ترا نصرت کرد ترا یاری کرد و بعد ببین خدا چطور نصرت کرد یکی از بزرگترین آثار نصرت محبت یاران تو با هم دیگه هست محبت یاران تو و همدلی یاران تو هر که میگه یاران رسول الله با هم داشتن دروغ میگه قرآن میگه با هم محبت داشتن و خدا میگه این لطف من است، این تایید من است، این نصرت من است که اونها را با هم دیگه محبت دادم قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و تشریف ببرند دو قبیله اوس خزرج از سالها با هم درگیر بودند خون ها ریخته شده بود بر علی هم دیگه شعر گو میگفتند بر علی هم دیگه هم را طعن و تشنی می کردند چقدر اینها عرض به خدمت شما که با هم تحدی داشتند اما رسول الله که آمد اینها شیر و شکر شدند چنان با هم دیگه دوست شدند که از برادر برادر تر و همچنین مهاجرین و انصار اونا از مکه مکی ناز مدینه نگفتن انصار که اینا اومدن جای ما را گرفتن اینا آمدن کار ما را تعطیل کردند چنان باشون دوست شدن چنان ایثار چنان از خود خودگذشتگی که شما همیشه داستان ها را می خونید لذا یکی از صورت‌های نصرت خدا اینه که یاران تو را با هم دیگه محبت و الفت داد. پس این را عزیزان بدونید هر وقتی که خدا ما را تایید بکند ما با هم دیگه محبت خواهیم داشت، با هم دیگه متحد خواهیم بود، با هم دیگه هم دل خواهیم بود، همدیگر را دوست خواهیم داشت. هر وقتی که خدا از ما برگشت اون وقت بدونید که اینو از اون بد میاد اون قیبت اون را میکنه اون برای اون چه میزنه اون برای برادر با برادر پسر امو با پسر امو فامیل با فامیل قوم با قوم لذا در هر مقتی اختلاف و چند دستگی شروع میشه پس علامت نصرت خدا چیه؟ وحدت هر قومی که وحدت نداشت بدون عذاب خدا بر اون قوم هست ما آیه را الله اللہ می من قادر هستم که سنو عذاب به شما بدم قل هو القادر و علا ان یبعث عليكم عذابا من فوقی کم از بالا عذاب بدم بجای باران سنگ ببارت از پایین عذاب بدم بجای اینکه سبزی برویت زمین خوشک و قحط بشه یا زلزل بیاد این دنو اذاب، او یلبس کم شیعان و یذیق بعض یا یعنی گروه گروه دست دست فامیل فامیل، تیره تیره بکنم به جان هم دیگه بیفتید. این اذاب خداست، خدا خودش میگه این عذاب من است. پس نصیرت خدا اتحاد است، همدلی هست، هم دیگر را دوست داشتن، هم دیگر را اکرام کردن خو... و یاری خود و. خاش می خدا ناراضگی خدا چیه از کنم که همینه که با هم دیگه اختلاف داشت اختلافم سر چه چیز هایی می بین دو تا جوان سر پمپ بنزین به خاطر نوبت با هم درگیر میشن اون فامیل خودش رو میخواد این فامیل خودش رو میخواد میزنه دیگر را باز برای فردا نقشه میکشن برای پس فردا همینه متلاشی شد چقدر جوان کشته میشه چقدر جوان بیابرو میشه چقدر مال ضایع میشه این برگشتن نظر خداست چرا ما اینقدر نفس داریم اینقدر نتونیم همدیگر را اکرام کنیم همدیگر را ایثار کنیم به جای اینکه با دیگه دو ماشین با هم میریم بگه بفرما شما احترام بذاری برادر مسلمانمون است اون بگه نه بفرما شما به جای اینکه این باشد اونه این نظر خدا وقتی برگرده اون میشه وقتی که خدا تعالی دوست هم باشه با هم دیگه محبت میکنیم لذا الله میفرمايت والف بین قلوبهم یعنی چی کیفیت نصرت خدا چطور نصرت تو میکنه والف بَيْنَ قُلوبِهِم بَيْن دلهای انها بین قلوبهم بین دل های اونها الفت ایجاد کرد بین دل های اونها محبت ایجاد کرد بین دل های اصحابت لو انفقت ما في الارض جميعا اگر تو خرج میکردی تمام اون چیزی که در زمین بود همگی را خرج میکردی ما الفت بین قلوبهم تم نمی توانستی الفت ایجاد کنی بین دلهایشون ولیکن الله الفت بینهم اما الله الفت ایجاد کرد بینشون ببینی خدا چطور الفت ایجاد میکنه وقتی عمل ما خوب باشه الفت ایجاد میکنه وقتی کہ عمل صالح باشه تغوا باشه خدا ترسی باشه خود به خود اکرام و احترام و محبت و ایثار و از خود هم میاد اون از صفات مؤمن است خدا اون صفت را بعد به ما میده لذا الله می, می فرماید ولیکن الله الف بینهم اما این الله اس کے الفت ایجاد کرد بین انھا چنان الفتی کے آخری لحظات او وہ میگه کہ آب آب برای او می می آب می بی اون میبرند دیگری می میگه آب میگه نه به من نده به اون بده سبومی میگه آب اون میگه نه به اون بده تا اون جمیر اون تمام شده بر میگرده این دو تا هم تمام شدند این محبت اینقدر هم دیگر را دوست داشتن دنیا کجا میتونه این نمونه را نشون بده این خداست که ایجاد کرد اینهو عزیز و حکیم بدون شک پروردگار رب تو غالب هست هر کاری میتونه بکنه اما حکیم هست کارهایش حکمت داره لذا چنان مؤمنینی را خدا برای تو تربیت کرد برای تو اینها را الله عز و جل آماده کرد ای پیامبر اینجا خطاب پیغمبر راست یا ایوها النبی حسبک الله ای نبی من ای پیامبر من الله اللہ است. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من المؤمنین، اون مؤمنینی که ترابیرهی میکنند، اون مؤمنینی که واقعاً پیروی تو هستند، طابع تو هستند، اونها تو را کافی هستند. اگر ما با خدا باشیم، الله ما را کافی سوامی برادران مؤمن ما. دیگه قدرتی داشته نباشیم حکومتی داشته نباشیم همشکلی ندارد الله پشت سر ما باشند مؤمنین با ما باشند حسب الله الله تو را کفایت میکنه و من اتبعک من المؤمنین اون مؤمنینی که تابع تو هستند اونها کافی هستند اونها برای هر اشاره تو جان میدن مال میدن اونها ایثار میکنن چنان صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله چطور از رسول الله دفاع کردند در جنگ احد وقتی که تیر بر آن حضرت میامد یک صحابی پشتش را گرفته بود به طرف دشمن جلوش رسول الله که هر تیر میاد به پشت من بخوره حضرت تلح رضی الله تعالی عنہ دستش فلج شد از بس که دست را نگه داشته بود تا هر تیر میاد به دستش بخوره از دور میزدند رسول الله را این طور صحابه از رسول الله حمایت کردن دفاع کردن اونی که با مال میکنه اونی که با جان میکنه همه در تاریخ نظیر اینها را شما نمیتونید پیدا کنید خب بعد وقتی که خداون اینگونه تربیت کرد خدا خودش اینها را تربیت کرد به وسط رسول الله، به وسط قرآن قرآن واقعاً اصلاح میکنه اگر کسی بیاد کاملاً بخواد که قرآن را در زندگی خودش پیاده کنه. بعد الله می فرمه الان این ها را بر جهاد آماده کن تحریک کن یا ایوها النبی یحرد المؤمنین ای نبی تشویق کو مؤمنان را علا القتال بر جهاد و شما باید انقدر غوی باشید که این یکم منکم عشرون صابرون اگر از شما 20 نفر صابر, صابر صابت قدم باشند یغلب و باید غالب بشن بر 20 نفر سبحان الله چطور ممکنه یک نفر در مقابل ده نفر این قدر باز ایمان تو قوی باشه و این یکم منکم من اگر از شما یکصد نفر باشند یا الفا من الذين كفروا غالب میشند بر هزار نفر از کفار باید غالب بیشند چرا؟ به قوم الله یفکهون به سبب اینکه هنگامی است که فهم و درک ندارد اصلش عزیزان اصلش اینه که وقتی که انسان انسان وقتی که مؤمن واقعی باشد برای جان خودش پروانه ندارد برای جان نمی جنگد، برای اینکه زنده بمانت نمی جنگد، برای خدا می جنگد برای رضای معلای جنگد خب مسلم این فرد این مجاهد این ده تا هم حریف میشه. اما کافر، کافر چون که اعتقاد دارد اول و آخر همین دنیاست اون او فقط سعی میکنه من زنده بمونم او وقتی که سعی میکنه زنده بمونه اون قطعا تو جنگ شکست می خورد اون برای کی می جنگد برای اینکه زنده بماند می جنگد خب زنده‌واندن شبیه که فرار بکنه تا زنده بماند پس به این خاطر الله فرمود که یک نفر شما ده نفری اونها اما بعدا این حکم رو تخفیف داد الله میفرما الان خفف الله عنكم حالا خدا از شما تخفیف داد و علم ان ضعفة. خدا میداند در شما ضعف هست شما نمیتونید الان چیکار کنید یک منكم اگر از شما یک سد نفر صابر بودند بر دویس نفر از کفار غالب میشن یعنی یک در مقابل دو این که باید باش چون ایمان دارید شما برای خدا می جنگید و این یکم منکم الفون اگر از شما هزار نفر باشن یغلب و الفین به اذن الله غالب میشن بر دو هزار نفر به اذن الله والله مع صابرین اینم علت از خداوند نصرتش کمکش یاریش با صابرین است کسانی که صبر میکنند کسانی که استقامت می کنند، کسانی که مردگونه می جنگند خدا با اون هست. این قانونی بود که خدا بیان کرد که مومن باید از کافر بیشتر قدرت داشته باشه. چون مومن خدا رو پشت سرش داره پشتیبانش داره و کافر پشتش خالی است. ما کانال نبیین این آیه درباره اسیران بد است. اسیران بعد جریانش معروفه بعد از اینکه عرض کردم هفتاد نفر اسیر شدند این اسیران هم تمام بزرگان بودند نزدیکان رسول الله بودند نزدیکان همی صحابه بودند مثلا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اموی رسول الله اسیر بود دیگر نوفل ابن حارس ابن عبد المطلب کے برادر زادہ عباس بود اینم پسر رسول اللہ میشه، حارس و عبداللہ با هم برادر انت دیگر پسر رسول اللہ بود این اسیر بود عقیل ابن عبی طالب کے برادر حضرت علی بود این اسیر بود خیلی دیگر احمی طور یا نسبت پسرمو داشتن یا نسبت دامادی داشتن همه اینها اسیر و رسول الله و مهاجرین همه آخه از همین خاندان بودند از یک فامیل بودند با هم دیگه پسرمو بودند با هم دیگه امو و برادرزاده بودند لذا اینا که اسیر شدند رسول الله مشوره کرد اسیران را بردن یه جای زندان کردن گفتن چکار بکنیم با اینها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله <سؤال> تعالی او اول مشوره داد گفت یا رسول الله اینا از خود ما هستند و ما امیدواریم که فردا ایمان بیاورم همونطور ایمان ما آوردند ما امیدواریم که اینها ایمان بیاورند و مؤمن بشند از یک طرف شرایط اقتصادی ما هم خوب نیست شرایط مالی ما هم خوب نیست مسلمانان هیچ چیز ندارن اینجا خدا ما رو نصرت کرد ما چند تا شمشیر بیشتر نداشتیم لذا ما بجای اینکه اینها رو بکوشیم اینها رو آزاد بکنیم یک منتی هم بر اینها بگذاریم و هم از اینها فدیه بگیریم در مقابل هر اسیری مقدار پول بگیریم بعد آزادشون بکنیم بسیاری از صحابه همین مشوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نورا را و مشوره دادند اما عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ این از کنم که قهرمان اسلام سپاه سالار بزرگ اشد على الكفار کسی که بر خیلی عصبانی است این گفت نه یا رسول الله ما این کفار را که تا دیروز این برادران ما را بدتری شکن جوابی داد الان خدا اینها رو به دست من داخته ما اینها را آزاد بکنیم که پول بگیریم من اصلا راضی نیستم همه اینها را از دم تیغ بگذارانیم و بعد هر یکی نزدیک و خودش را خودش بکشد یکی از اینها پسر موی من است اول بدیم من پسرموی را بکشم شما یا رسول الله عباس را خودت بکش. علی عقل را خودش بکشد هر کسی نزدیک خودش را بکشد چرا ما با اینها رافت داشته باشیم هم داشته باشیم اما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تنها بودند مشوره بقیه همه مشوره صدیق را پذیرفتند ابوبکر رضی الله تعالی عنه رسول الله هم تصمیمی فایسله کرد فایسله کرد اما فایسله چی بود گفتند که هر یک از اینها بازی تو اینها باسواد بودند خواندن و نوشتن بلد بودن ببین اسلام چه توجهی به علم و به دانش داشت به سواد و خواندن و نوشتن داشت اولی شرطی گذاشتن هر یکی از این اسیران باید تو مدینه بماند تا زمانی که ده نفر را باسواد نکرده اجازه نداره بره اولی شرط این بود افراد با سواد باید ده نفر از فرزندان مسلمین را سواد یاد می دادند و نوشتن یاد می دادند این شرط اول بود دومی دو شرط این بود که دوباره عهد کنند پیمان ببندند در هی جنگی با کفار همراه نشند سومی سو شرط این بود که هر یکی مبلغی بده اونایی که وضعشون ضعیف بود چهل اوقیه بدند اونایی که وزیشون خوب بود مثل حضرت عباس رضی الله تعالی نهو اونا باید هشتاد اوقیه بدند دو برابر بدند بعدن میتونم برند لذا بر این فیصله شد و رسول الله فیصله کرد بعد از این که فیصله شد الله این آیه را نازل کرد این آیه تقریباً 17 آیه از موافقات عمر فاروق رضی الله تعالی نهو است یعنی اینکه خدای تعالی طبق نظر عمر نظر داد یکی از اون از اونها همین آیه هست اینجا حکمت ایجاب میکرد چون اولین جنگ بود و جنگی که تبدیل به فیصله حق و باطل شد باید چنان کفار را زهر چشمی نشون میدادی تا دوباره کسی جرات نمیکرد به سوی مسلمانان نگاه کند لذا حکمت ایجاب میکرد همه اینها کشته بشن تا ترس و وحشت و روب بدن اون بگیرد الله هم همینه میگه گرچه خداوند از طرف خودش مقدر کرده بود که بعدن اینا ایمان میارند. لذا الله میفرماید ما کان لنبی ان یکون له اسراء سزاوار نیست لایق نیست برای هیچ نبی برای هیچ پیغمبری این یکون له اسرا اینکه برای او اسیرانی باشد حتی یفخن فی الارض حتی که خوب در زمین خونشون را بریزد واد خونشون را بریخت چرا شما قبول کردید با اونها از اونها فدیره تريدون عربه دنیا شما کالا دنیا می خواهید؟ والله و یريد الله اراده آخرت برش ما دارد در آخرت خدا به شما میده والله عزیز حكيم خدا غالب از کارهاش با حکمت هرچی خدا میگه خیر حکمت ولی دیگه فیصله شده بود پول را راطویل گرفتن کار از کار گذشته بود الله بعدا را نازل فرمود و بعد خدا می فرماید ببین چه جمله سنگینی لولا کتاب من الله سبق اگر از جانب الله نوشته پی‌شا پیش ننوشته شده بود لمسکم فیما اخذتم بشما میرسید در عوض اون چیزی که شما گرفتید عذاب عظیم عذاب عظیبی می میرسید یعنی چی خدا چی را قبلا نوشته الله تعالی قبلا فیصله کرده بود که تا زمانی که حکمی صادر نشده اگر کسی اون حکم را عملی نکند برای اون عذابی نباشد خب قبلا خدا چون دستوری نداده بود که حتماً اسیران کشته بشن اگر چنین دستوری بود اون وقت اگر نمی‌کردند اون دستور را بعدن آزاد می‌آمد ولی خدای تعالی قبلاً به پیغمبر اجازه داده بود که هر وقتی اسیر گرفتی فاما فا من بعده و اما فدان یا اسلم مننت بگذار بدونی هیچی چی آزادشون بکن همون کاری که در حدیبیه کرد رسول الله و اما فدان یا فدیه بده بگیر و آزادشون کن هر کاری اجازه داری خود الله اختیار داده بود لذا اما اینجا مسئلات این رو ایجاب می کرد. ولی خب کار از کار گذاشت خب الان پول زیادی گرفتند کار بکنه این پول را پول دیگه حرامه نخوریم چون خدا فرمود توریدون عرضت دنیا نه الله الان که گرفتی بخورید فکلو مما غنمتم حلالا تنیبا بخورید از اون چه که غنیمت گرفت از اونها حلال پاکیزه اما وطق الله از خدا بترسید احتیاط کنید الله غفور و رحیم اگر شما از خدا ترسید خداون بخش آینده و مهربان است خب از این اسیران از این اسیران این را خدمت شما عرض بکنم که بعضی ها تهدل مسلمان بودند از قبل مثلا عباس رضی الله تعالی عنہ همین جا وقتی که رسول الله بهش گفت که پول بده گفت یا رسول الله من از قبل مسلمانم من تالا اظهار نکردم رسول الله گفت نه الان که اسیر هستی داری میگی الان پول باید بدی بعضی چون از قبیله خود رسول الله بودم بنو هاشم همه اینها عباس بود اون اگر کنم که عقیل بود نوفل ابن حارث بود دیگران بودند اینها را بغیه بیزور آوردند اینها نمیخواستند بیان در مقابل رسول الله بجنگند الان مسلمان بودند یا مسلمان نبودند روحیه جنگ نداشتند اما از کنم که اینها را به اجبار آوردند لذا خداوند اینجا به اینها خطاب میکند همین مسلمانان چون بعضی ها همین جا مسلمان شدند همین جا که اسیر شدند هم پولشون را پرداخت کردند هم چی کردند هم مسلمان شدند مثلا در سیدنا عباس رضی الله تعالی می آید که عباس رضی الله تعالی رسول الله را خاص بعد از این که قرار شد فدیه بده گفت که مال بقیه چهل اوقیه است مال شما حشتاد اوقیه است شما حشتاد اوقیه اوقی از طرف خودت بده 80 اوقیه از از طرف نوفل ابن حارسه ابن عبدالمطلب بده اون برادر زاده او چیزی نداره تو امو هستی پدرش هستی باید تو بدی 80 اوقیه از طرف او بده هشتاد اوقیه دیگر از طرف یک یک کسی که حلیف اینها بود عقبہ ابن عمر که اون با شما هم پیمان است اون نداره از طرف اون هم 80 تا بده همه اینها را بده بعدن برو عباس گفت من که چیزی ندارم گفت باید بدی تو از اون طلاحایی که اونها را مخفی کردی وقتی که آمدی به ام فضل گفتی به همسرت ام فضل گفتی که من دارم میرم امکان داره من کشته شدم اگر من کشته شدم من این قطعه دارم فلان جا مخفی هستم بعدا اونها رو برداری بین خودتون تقسیم کنید از همون طلاحا برو بیار. او تعجب کرد گفت شما از کجا خبر دارید این موجزه رسول الله بود گفت رب من به من خبر داد که تو داری نمی دی اونجا بود عباس از قبل اسلامی داشت ولی بین شک و تردید همین که رسول الله این موجزه رسول الله دید گفت اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله من الان باور کردم واقعا تو پیغمبر خدا هستی عباس رضی الله تعالیٰ عنہ داشت مالهایی مقداری تلا داشت اینها را یک جای مخفی کرده بود وقتی که به بدر داشت می آمد به همسرش ام فضل گفت که اگر من برنگشتم تلاها فلان جا هستند بردارید مال شما هستند لذا بعدا عباس اینها را داد عباس وقتی که داد هم از طرف خودش داد هم از طرف برادرزادهش داد هم از طرف حلیفش داد به پیغمبر گفت تو برای من هیچ چیزی نگو دیگه من دست خالی از این به بعد باید گدایی بکنم چیزی برای من باقی نماند الله تعالی این آیه را نازل فرمود یا ایها نبی ای نبی من قل لمن في ايديكم بگو به اونهایی که در دست شما هستند من الاسرا از اسیران بأنها بقول يعلم الله في قلوبكم خيرا اگر الله تشخیص بده ظاهر بکنه در دل شما خیرن خیری یعنی اخلاصی توبه ای واقعا اگر مؤمن بشوید یاتکم خيرا مما اخذ منكم خدا به شما میده بهتر از اون که از شما گرفته شده یعنی مالی که از شما گرفتن خدا بهتر به شما میده و یغفر لكم و خدا شما را میبخشه خدا را می بخشید. والله وفور الرحیم الله بخشای و مهربان است و همون ترواده الهی شد. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ایمان آورد بعدن که مکه رفت کردن رسول الله صلی الله علیہ وسلم به عباس همون مسئولیت گزشته بنو حاشم رداد که سقایه عبد را عبدادن به حاجیها مسئولیتش با عباس بود عباس هم کار کرد خدا مال هم به زیاد داد آخر عمری می گفت که این ای که خدا با ما کرد اونجا همه مال هم را دادم ولی بعدا خدا به من خیلی زیاد داد همه وعدهی خدا کامل شد الان منتظرم که خدا من ببخشه و به بهشتش ببره و یخفر لکم خدا میخواد شما را بعد از این که مال بده میبخشه اما اگر بخواستید که خیانت کنید و ان يريد خيانتك اگر اراده خیانت را داشته باشند ای رسول الله فقد خان الله من قبل همان انها خیانت کردن با الله قبل زین فامکن منهم فامکن منهم یعنی امکنكم علیهم خدا شما را تمکین و قدرت داد بر اونها خدا اونها رو به دست شما اسیر کرد اگر بازم خیانت بکنن بازم اسیر میشند بعضا بدان میفتن والله علیم حکیم الله از هر چیز را میدانت کارهای الله با حکمت است. خب تا اینجا این جریان این بعد تمام شد در پایان سوره که این آخرین آیات هستند الله از زواجل اهل ایمان را به چار دسته تقسیم میکنه مؤمنین چار گروه هستند. اولین گروه مهاجرین، دومین گروه انصار. از شما میخوام که شما به این آیات مقداری تدبر بکنید مقداری فکر بکنید گویا الله از تمام تمام اونچه که در, در آینده درباره اصحاب رسول الله، کسانی می خان بکنند خدا همه اونها را عالم الغیب میدوند اونها را در نظر گرفته و این آیات را نازل فرموده الله تعالی با چه کلماتی با چه تعبیری با چه تعریفی از یاران رسول الله صلی الله علیه و وسلم دفاع میکند واقعا یاران رسول الله دوست داشتنی هستند دوست داشتن اینها از ایمان هست و بدترین بدبختی اینه که کسی نسبت به اینها سوء نظر و سوء عقیده داشته باشد اینها رو و بیراه بگه اینهایی که محسن امت هستند کار پیامبر را بعد از پیامبر در مدتی کوتاهی به تمام جهان رساندند به همین خاطر ما از اینها ناراض باشیم که ایمان را به ما رساندند اسلام رب ما رسول دان این پاداششون هست لذا عزیزان صحابه را با دوست داشته باشید دوست داشتن صحابه علامت ایمان شما هست و محبت چه محبتی فرزندان خودتون را به همون نام ها نامگذاری کنید در زندگیتون سعی کنید همون گونه زندگی کنید رسول الله فرمود آخر گروهها زیاد میشند اف افراد مختلفی در دین اسلام ظهور می کنند همه بر باطل هستند همه بر زلالت هستند فقط یک گروهی ناجی است گفتن یا رسول الله اون یک گروه کدومه گفت ما انا علیه و اصحابی همون گروهی که من و اصحابم بر اون مسیر هستیم همون گروهی که از من و از اصحابم پیروی بکند پس صحابه را که الله عز وجل اینقدر تعریف کند این بر اساس یک واقعیت است الله عالم الغیب است اگر اونطوری که بعضی تاریخ نویسان میگویند اینها العیاذ بالله با هم مشکل داشتن اینها با هم بغض و حسد داشتن با هم کینه داشتن بعد از رسول الله برگشتن چقدر مردم نسبت به اینها بی انصافی میکنند مگر خدا خبر نداشت که این آیات را نازل فرمود بعضی میگن با چه که همه برگشتن به غیر از پنج شش نفر همین هم مؤمن ماندند و بعضی فقط پنج شش نفر را قبول دارم بقیه را به عنوان اصحاب قبول ندارم ببینی خدا چی تعریفی میکنه برای ما کتاب خدا ملاک است بارها گفتم که عقیده را از تاریخ نگیرید تاریخ را یه ملای مثل من نوشته کل حب و بغض داشته کل میخواست خلیفه اون زمان را در زمانهای بعدی خوش بکنه از او درهم و دیناری بگیره لذا بر اساس دیدگاه او نوشته مثل که هر حکومتی میاد حکومت قبلی بدترین حکومتی از دیدگاه اون الان بیاد کسی تاریخی در باره های گذشته بنویسد خب مسلمه که چی نویسد؟ هستم بعضی واقعیت ها, ها رو نویسند، اما بعضی مسلمه که چی هر هرچی که جرم و جنایت در دنیا باره اونها می کنند لذا بعضی ها که تاریخ نوشتند با این انگیزه بوده لذا تاریخ برای ما ملاک نیست تاریخ را به قول بعضی از بزرگان باید به زبالدان تاریخ انداخت در مقابل قرآن البته در مقابل قرآن آیات قرآن برای ما ملاک هستند الله عز و جل ببینید این آیات را دقت کنید تدبر بکنید اولا خداوند عز و جل اینها را میفرماید اینها با هم دوستن با هم دشمن نیستند برخلاف تصور بعضی که میگن با هم مشکل داشتن الله میفرماید ان الذين امنوا همانا انهای کی ایمان آوردند و هاجر و هجرت کردند و بعد از ان هجرت کردند و جاهدو بی اموالهم و فی سبیل اللہ جهاد کردند با مالشان با جانشان در راه اللہ بغیر از ابو عمر عثمان علی تلها زبير عبد الرحمن بن عوف سعد سعید ابو بكر بن جراح خالد بن ولید سعد بن ابي وقاس عمرو بن عاص هر یکی يك سپاه سالاری بود به از اين هم اگيه بودند اينها و انصار مدينه سعد بن عباده سعد بن معاذ اينها را الله عز وجل مي فرماید اينها يكي با مال و جان نه براي جان پروا داشتند وقتی که رسول اللہ می گفت کہ مال لازمه عثمان رضی اللہ تعالی نو سیصد ست شطر تقدیم می کرد با بار یا رسول اللہ اونم در چه روزهای سختی تھی بعضی رویت شطر رسول اللہ چنان شاد شد گفت عثمان برازیم بباد هر کاری می کنی آزادی تو کاری طرح کردی عبدالرحمن امن عفظت تا شطر ابو بکر صدیق هر چی تو خونه دار جمع میکنه، اومار عمر فاروق نصف مال را جمع میکنه، مگه جاهد و بیاموالهم کدوم کی آمد خرج کرد همین ها بودند و حضرت علی رضی الله تعالی چطور جانانه در مقابل کفار جنگید امر ابن عبد ود را در اون میدان خندق چطور از پایدر آورد و تکبیر مسلمانان را بلند کرد انشالله می خوانیم در سوره احزاب لذا صحابه واقعا از خود رشادت نشان دادن واقعا از خودشون از خود گذشتگی نه برای مال پروا کردن نه برای جان پروا کردن تیر می آمد همین الان عرض کردم تلح رضی اللہ تعالیٰ دست خودش را سفر رسول الله کرد ابو دجان پشت خودش را حضرت سعد بن ابو وقاص در کنار رسول الله داشت تیر می‌زد به دشمنان رسول الله گفت که ارم یا سعد فداک ابی و امی ای سعد بزن پدر و مادرم فدای تو باد این طور از رسول الله دفاع کردند اینهای که الله میفرما جهادوا و وانفسهم فی سبیل الله با مال شان با جانشان، جهاد کردن در راه الله، جهاد کردن تا دین به ما رسید ما چقدر واقعا قدر شنازیم که در مقابل این زحماتشون چی داریم میگم نسبت بینها و همچنین گروه دوم این گروه اول محاجرین و مجاهدین و الَّذِينَ آوَو و نَسَرُو آنهای که دادند انها و نسروا آنها نصرت کردند نصرت کردند دین خدا را جای دادند باغشون را تقسیم کردند خونشون را تقسیم کردند مغازشون را تقسیم کردند تجارتشون را تقسیم کردند چی داشتند با چه محبتیم با چه استقبالی استقبال کردند از مهاجرین الله می فرماید اولائک بعضهم اولیاء و بعض اینها بعضی از اینها دوستان بعضی هستند حامیان بعضی هستند اینها واقعا با هم دیگه دوست و محبت دارند این یک گروه گروه اول اینجا کردم چهار گروه را الله ذکر میکنه هنوز بحث اینها میاد هنوز صفاتی است برای اینها خدا فرماید اما گروه دوم والذین آمنوا ولم یهاجرو ان گروه دوم انهایی که ایمان آوردن اما تا حال حجرت نکردن چونکه استطاعتی نداشتن اولا ما لکم من ولایتهم من شيء. برای شما سرپرستی و مسئولیت و ولایت اونها چیزی نیست چون اگر حجرت میکردند وظیفه شما بود از اونها دفاع میکردید الان که هجرت نکردند وظیفه شما ندارید در قبال اونها البته مالک و مولایت میشه حتی رو تا اینکه هجرت کنند اگر هجرت کردند و آمدند بعد از, اون، بعد از اونها هم شما دفاع کنید اما اگر اونها ناتوانند نتونستن هجرت کنند اونجا ماندند از شما کمک میخواهند شما باید کمک کمکشون بکنید ای این وظیفه و ان استنصروکم فالدین اگر از شما یاری طلبی در امر دین فعلیکم النصر بر شما هست که نصرت کنید برید به کمکشون نجاتشون بدید الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر بر علی قومی که بین شما و بین اونها عهد بر علیه اون قوم اقدام نکن اگر با قوم جعع جن... داری سل داری جنگ نکن ولی سفارششون بکن ببینید امروز این وظیفه وظیفه‌ای که نجاء خداوند خطاب کرده به پیامبر صلی الله سلام، این وظیفه وظیفه رهبران مسلمانان است حاکمان مسلمانان است در یک گوشه از دنیا اگر مظلومی مسلمانی فریادی و اسلاما سر می میگه می اون مسلمان به کمک ما بشتابید ما را در این جر نصر کشی کنند اون اتفاقاتی که اتفاق افتاد در شرق چین ترکستان شرقی مسلمانان را قل و کردند زنان را جدا کردند اقیم کردند مردان را جدا کردند بچه ها را برو بردند هیچی که از های اسلامی به قول معروف که که هم اونها را نگزید باید بکن که اینها می مسلمانان هیچ کس به وظیفه خودش عمل نکرد اون که بر مسلمانان میانمار آوردند چه ستمی چه ظلمی صدها هزار نفر آواره نه بنگلادش می تو بنگلادش تهنوز آواره هستند دنیا فراموششون کرده نه میانمار می برند تو میان مرد تو چه زندگی میکنه کنار رودخونه ای هستند لذا این وظیفه کسانی که خودشون را مسلمان میدانه وظیفه این هاست که بیاری اونها بشتابند اول برن جهاد کنند اگر با اون کشورها عهد دارند الا علی قوم بین کم و بین هم ما دارن پیمان دارن دوستی دارن حداقل بگوین اینا رازیات نه برادران و خواهران دینی ما هستند ما در غبال این هم و مسئولیت دینی و شرعی داریم ولی متاسفانه مسلمان در این موضوع کوتاهی دارد باید وظیفه را انجام بدهند الله خودش رحم کنه به حال این مظلومین این مظلومین که اینطور مظلوم هستند به خاطر بیباکی و بیپروایی حاکمان مسلمان اگر حاکمان مسلمان دفاع می کردن این قادری مظلومین تحت ظلم و ستم نبودند لذا این گروه دوم الله می‌فرماید اگر از شما یاری خواستند یاریشون بکنید والله والله بما تعملون بصير اما در وسط در باري كفار اللهم يفرمج والذين كفروا بعضهم أولياء كفار بعض كفار بعضي از انها أولياء بعض هستن حاميانهم ديگاه هستن إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يعني هرتي كفار باردران وخاهران مسلمان شما مي كنند شما بايت دفاع كنين إلا تفعلوه اگر نکن این کار را، تکن فتنه تون در زمین فتنه ای خواهد بود و فساد کبیر فساد بزرگی خواهد بود، امروز این فتنه و فساد هست یا نیست؟ امروز بدتری ظلم ها و ستم هارا از دیر وقت، از زمان بوسنی و قبل زن در هر گوشه ای از دنیا نسبت به مسلمانان انجام میدادند. هندوستان با مسلمانان میکنه چین با مسلمانان دولت میانمار تایلند همه کشور مسلمانان مظلوم هستند بودپرست ها و غیر الله پرست ها هرچی دلشون می میخواد میکنه شما حاکمان مسلمان که دفاع نمیکنید الا تفعلوه تکن فتنه یه فتنهی خواهد بود همین فتنهی یک مصیبت بزرگی خواهد بود یک فاجعه انسانی فاجعه ها رخ داد و فساد کبیر فساد بسیار بزرگی به خاطر همین فساد است که خدا دنیا را ناامن کرده به خاطر همین است که الان خودشون گرفتار هستند الان تمام دنیا شب وقتی میخوابد با وحشت میخوابد که مباد جنگ اتمی شروع بشه جنگ اتمی که شروع بشه چکار بکنیم چون اول و آخرش همین دنیایشون است چیزی دیگر را ندارند که برای اون دل خوش باشه ما مسلمانان حضرت انصاری میگیم که این دنیا که تمام بشه زندگی اصلی ان الله شروع میشه اگر موفق باشیم لذا الله عزوجل میفرما اگر جلوی اینها را, نگیری را نگیرید جلوی ظلم را نگیرید به داد مظلومی نشتابید فتن و فساد بزرگی ایجاد می شیم خب در ادامه الله تعالی سه گروه را ذکر کردن گروه اول مهاجرین گروه دوم انصار گروه سوم اینهایی که هجرت نکردند شما کمک کمکی کمکشون بکنید اما الله عز و جل بعض اون گروه اول را که الله فرمود اولئک بعضهم اولیاء و بعض هم مهاجرین را هم انصار را انجا اللہ عز و جل ان جا الله عز اون جمله را کامل تر می‌کنه دوباره تکرار معلوم می الله اللہ تعالی خوب آینده را در نظر گرفته مستقبل را در نظر گرفته میخواد که بحث را از همه بحث جویان بگیرد الله فرماید والذین آمنوا و هاجر تکرار است والذین آمنوا آنها ایکی ایمان آوردند و و هجرت کردند و جاہدو فی سبیل اللہ و جهاد کردند در راہ اللہ والذین آوهو و نصرو آنها ایکی انها رجائد آدند و نصرت یاری کردند اولائک هم المؤمنون حقا اللہ می فرمائے مؤمنین بحق انها هستند خدا وقتی گواهی می مؤمن مومن حق استند تو کی هستی که تو قبول نمیکنی؟ میگه شاه می قبول میکنه شاهولی میگه قبول نمیکنه وقتی که شاه الله عزوجل قبول میکنه الله میگه اولای هم المهمینون حق بس همین قدر برای سهابه دیگه دفاع از این بزرگتر نیز اولایک هم المؤمنون حقا و به این خداوند بسنده نکرده درباره این هم المؤمنون حقا پاداش دنیایشون است در دنیا نامیشون چیه المؤمنون حقا در آخرت لهم مغفرت و رزق و کریم در آخرت برای آنها مغفرت و بخشش است از سوی پروردگار و رزق و کریم رزق معزز است خدا اینها را چنان اعزاز میکنه اکرام میکنه که سبحان الله الله بهتر میدانه و الذین امنوا من بعد و هاجروا و این گروه چارو است. اینایی ای که بعدن ایمان آوردند بعدن هجرت کردند یا بعدن جهاد کردند بسیار یا بعدن در مکه ایمان آوردند در جنگ ها شرکت هم کردند در جنگ ها شرکت هم کردند لذا اینها مثل خود ابو سفیان رضی الله تعالی و معاویه رضی الله تعالی و گرچه معاویه قبل از فتح مکه ایمان آورده بود مخفیانه به رسول الله ارتباط داشت وحشی که حضرت حمزه را شهید کرد اینها بعدا تو جنگ ها شرکت کردند و بالخصوص سیدنا معاویه رضی الله تعالی او بعد از اون خدمات ارزنده ای برای اسلام انجام داد خطاهای در زندگی هم داشت اما خطاهایش یک طرف این خدماتش یک طرف خدمات را که انسان نگاه میکنه اون اشتباهات و خطاهای اشتحادی را انسان فراموش میکنه در زمان سیدنا عمر و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنو 20 سال استاندار دمشق استاندار شام بود هرچی که مسلمانان در این زمان نظمی داشتند ترتیبی داشتند در همه جنگها بهترین اسلحه بهترین مجاهدان بهترین همراهان از سوی معاویه فرستاده میشد هر جایی که حضرت عمر میگفت حضرت عثمان میگفت لذا در طول این دو خلیفه راشد معاویه 20 سال حاکم بود ببخشید استاندار بود بعدن در زمان سیدنا علی به خاطر اختلاف اونم روی خون سیدنا عثمان گفت ما همه بیعت میکنیم ولی اول این قاتلان را بیرون کن قصاص کن بعد از ما به حکومت بیعت بکنیم سیدنا علی گفت اول باید حکومت استوار بشه پا جا بشه جریان کلش همین بود اما باقیها منافقان بین اینها سعی کردند که به صلح نرسند و اینها رب جان هم اندافتن درگیری هم شد متاسفانه بعضی صحابه تلحظ و شهید هم شدند ولی بعد از اونکه سیدنا علی شهید شدند سیدنا حسن با معاویه صلح کرد بعد از اون معاویه به عنوان خلیفه مسلمین همه باش بیعت کردند از مدینه و مکه گرفته تا شام همه پارچه شدند دوباره نزدیک به 20 سال 18 سال دیگه به عنوان خلیفه مسلمانان خدماتی کرد که اون خدمات را برید در تاریخ بخونید کدوم مناطق را تحت سیطره اسلام در آورد به قسطنطنیه که استانبول امروز هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اولین لشکری که به بقدستنطنی حمله بکند و حمله دریایی از طریق دریا اونها تمام اهل بهشت هستند این زمان ابو ایوب انصاری که اولین میزبان رسول الله صلی الله علیه و سلم 120 سال عمر داشت به خاطر همین مجده گفت که من با خودتون ببرید این لشکر را کی تجهیز کرد معاویه رضی الله تعالی او تجهیز کرد اونجا وقتی رفتم پشت دیوار استانبول قسطنطنیه اونجا وقتی که سفاره بستن همین روز حضرت ابو ایوب وفات کرد و گفت اگر من وفات کردم تو همین جریان مرا جلوی قدم های مجاهدین دفن بکنید دفنش کردن الان قبر ابو ایوب انصاری همونجا در استانبول هست لذا بعدن قسطنطنیه را فت کردند رسول الله صلی علیه و سلم به اینها بشارت بهش داد این لشکر توسط معاویه تجهیز شد در زمان خلافت معاویه این لشکر اسلام را و اهداف اسلامی را به پیش برد لذا انهایی که گرچه اینها از نظر فضیلت به اون بزرگواران نمی رسند به خلفای راشدی نمی رسند به سیدنا علی نمی رسن. اما اینها را هم خدا نادیده نگرفته الله چی می فرماید والذین آمنوا من بعد ان های ایمان آوردم بعد از آنها وحجرت کردم و هاجروا وجاهدوا و هجرت کردن وجihad معكم هم با شما چه هجرت کردن چه جهاد کردم کردن فؤلاء منكم انها از شما هستند این گروه هم از شما جز شما مسلمانان است و اول الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله الله می فرماید خشاوندان بعضهم اولا ببعض خیشاوندان بعضی از اونها از بعضی نزدیکتر هستند فی کتاب الله یعنی در حکم شرعی این در واقع اشاره به یک جریانی هست این را خدمت شما عرض کنم و آیه تمام بشه ان الله اصلش اینه که ابتداءا وقتی که مهاجرین هجرت کردند و انصار پذیرش کردند رسول الله صلی الله علیه و بین آنان مواخات ایجاد کرد مواخات یعنی برادری یک مهاجر و یک انصاری با هم برادر بودند یک جا زندگی میکردند یک جا کار میکردند یک جا تعلیم میگرفتند نوبتی هم کار میکردند یکی میرفت خدمت رسول الله در مسجد النبی احادیث آیات جدید اینها را حفظ می کرد یکی رفت سر باغ کار میکرد یا با شطور یا با تو بازار شب اون یکی هر چی جمع کرده بود این یکی هر چی یاد گرفته بود میآمدن با هم می‌نشستند هم با هم می‌خوردن با هم دیگه مذاکره علمی و مذاکره ایمانی می‌کردند این بود روش زندگی مهاجرین و انصار چنانی ها با هم دیگه محبت داشتن چنان دوست بودند که دوستیشون حدی نداشت آخر بین اینها میراث هم جاری بودو جاری شد یعنی اگر یکی از اینها میمرد هر داشت برادر دیگه ارث میبرد گرچه اون از مکه ای از مدینه است ولی ارث جاری بود چرا چون که مثلا این مهاجر که فوت میکنه این پدرش برادرش خیشاوند دانش همه تو مکه بودند غیر مسلمان بودند خب کافر از مسلمان ارث نمی برد لذا همین مسلمان ارث می اینکه این که برادر دینی هست است این که مواخات ایجاد شده اما بعدا وقتی که مکه فتح شد اهل مکه هم مسلمان شدن دیگه این حکم از بین رفت اینجا اشاره به از بین رفتنی همین حکم است یعنی خداوند می از این که بین اینها ارثی باشد و توارثی باشد اون خیشاوندان نزدیکتر هستند به جای این برادر دینی اون برادر حقیقی چون اون الان مسلمان شده بجای این پدر دینی اون پدر حقیقی لذا اولل ارحامه بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله اینهایی که خیشاوند هستند صاحب رحم هستند صاحب خیشاوندی هستند بعضی ها نسبت به بعضی نزدیکتر هستند فی کتاب الله یعنی در حکم شرعی. اولو الارحام یا در اصطلاح علم میراث زوی الارحام بهش میگند هر کسی که نزدیکتر است اونی که دورتر است را محروم میکند مثلا وقتی که آقا فرزند داره مرحوم فرزند داره دیگه برادرش محرومه از ارث. پدر داره دیگه امویش از ارث محرومه اگر نه پدر هم نداره فرزند هم نداره خو ارث را برادر میبره برادر نسبت به پسر و نسبت به امو نزدیکتره برادر که ارز میبره او محرومه از ارث. پس هر یکی که نزدیکتر باشه اون دورتری را چکار میکنه محروم از اسمی کنه بی؟ این خاتمی فرماند قلول ارحام یعنی زوایل الارحام بعضهم هم اوله به بعضی، بعضی ها نسبت به بعضی نزدیکترن. فی کتاب الله در حکم شرعی ان الله با کل شیء علیم بدون شک الله عزوجل به هر چیز علیم هست آگاه هست بر اساس علم آگاهی الله عزوجل آگا به شما دستور میده شما هم دستورات خدا را اجرا کنید که خیر دنیا و آخرت شما در حین السورة الله عز وجل صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا لا نحسي كما أنت كما أثنيت على نفسك ربنا أأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فرور دقارا مارا ببخش وبرادران ما كأزمات در إيمان بيشي قرفتان هناكي در دورهای گذشته بودن سلف صالح ما پروردگارون را مغفرت بفرما از اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و وسلم تا تابعین تا تبع تابعین تا ائمه مجتهدین فقها و علما اسلام اونایی که برای دین زحمت کشیدند اونایی که بر دین کار کردند اونایی که جان و مال صرف کردند که امروز دین این اینطور راحت به ما هست بلاد ما امنیت دارن، بلاد ما همه مسلمانند و در بلاد ما قرآن هست در بلاد ما کتب دینی هست تفسیر هست اونا زحمت کشیدند پروردگارا بهترین روح و ریحان را بهترین پاداش و اجر آخرت را به اونها انایت بفرما اله العالمین از سوی ما بہتری ها و سلامها را و رحمتها را بر اونها بباران روح شان را در جنات فردوس بلند و بلند تر بفرما۔ اساتی و مشایخ ما کسانی که مستقیماً بواسطه یا بلاواسطه از اونها ما درس گرفتیم همه را مغفرت بفرمان بالخصوص اصحاب و یاران رسول الله را بروردگاراً اله العالمین را پیرو راستینی برای صحابه بگردان محب صحابه بگردان دوستدار صحابه بگردان و اله العالمین به همگان احسان و لطف صحابه را بفهمان که چقدر زحمت کشیدن و با چه خون دلی اسلام عزیز را به ما را ساندن بروردگار را ما را بندگان قدردان بگردن ما ایرانی ها را ملت ایران را قدردان بگردان قدردان نعمت های خودت قدردان دین اسلام قدردان قرآن، قدردان شریعت غرر و قدردان اون انسان های پاک و مقدسی که همه این نعمت ها را برای ما به ارمغان آوردند. بر, بر ما لطف بفرما. بر ما را به فتنه گرفتار نکن. بر دنیا و آخرت ما را خراب نکن. بر, بر ما لطف بفرما مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمانان را برطرف بکن. انهایی که مشکل دارن تغازه دعا کردن یا تغازه دعا نکردن اما زندانیان مريزان بی اولادان گلائه کردن برای بی اولادان دعا نمیشه بروردگار همه مشکل دارن مشکلشون را حل کن اون برادرانی و اون خارانی که اولاد ندارن مولاد در, در خزانه تو کمبود که نیست تو به همه دادی به حیوانات حتی می دی اروردگارت تو قادری به عمی بدگان خودت اولاد بده فرزندان صالح و نیک بده به اونایی که اولاد دادی فرزندانشون را صالح بگردان با ایمان بگردان جامع ما را جامع ایمانی بگردان جوانان ما را جوانان با غیرتی بگردان با ایمان بگردان متبع و پیرو و یاران و دوستداران رسول الله بگردان بروردگار رب برما و بر جامعه ما رحم بفرما ما را از فساد از فحشا از منکر از معاصی نجات بده رمضان ما را رمضان مقبول بفرما در رمضان مارا صاحب توفیق بفرما مارا اله العالمين از اون بندگانی که براستی و بإخلاص ترا عبادت میکنند کلام ترا تلاوت میکنند ذکر ترا بجامع آورند و سجد میکن از اونها بگردان خاتم امارا با ایمان بگردان و آخرت امارا آباد بفرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين ورحمة